اثر مراکب نویسنده دارن هاردی مترجم، فروخ بافنده انتشارات پندار تابان گویندگان، کامبیز خلیلی، حوتن شاتریپور، شهره روحی متن پشت جلد شنیدن حرف های مفت در مورد راز موفقیت بس است. موفقیت هیچ معجون جادویی، فرمول سری یا راه حل خلق و سائعی ندارد. هرگز با گذراندن دو ساعت در روز روی اینترنت پولدار دار نمی شوی. در عرض یک هفته پانزده کیلو کم نمی کنی. با مالیدن کرمی روی صورتت 20 سال جوانتر نمی شوی یا زندگی زن خود را با خوردن یک قرص درست نمی کنی. برخلاف تصور، اصول اساسی موفقیت اصولی بسیار ساده هستند که همه ما آنها را می دانیم. احتیاجی به یادگیری چیز بیشتری نیست. مشکل فقط اینجاست که نمی دانیم چطور آنها را عملی کنیم. آنچه من تو نیاز داریم اطلاعات جدید یا اطلاعات بیشتر نیست. ما نیاز به برنامههای کاربردی و قابل اجرا داریم تا بتوانیم رفتارها و عادتهای جدیدی را که زمین ساز موفقیت هستند در خود ایجاد کنیم. کتاب اثر مرکب همان برنامه است. در ستایش کتاب اثر مرکب این کتاب قدرتمند و کاربردی که بر پایه تجربه های اثبات شده و سوداور به نگارش درآمده است به تو نشان می که استعدادهای خاص خود را چطور در خدمت بگیری تا از فرصتهای پیرامونت نهایت استفاده را ببری اثر مرکب گنجینه‌ای از ایده برای دستیابی به موفقیتی بزرگتر از آنچه به عمرت متصور بوده ای. برایان تریسی، سخندران و نویسنده کتاب راه ثروت فرمولی بی برای گذران یک زندگی خارقلاده این کتاب را بخوان و از آن مهمتر آموزه‌هایش را به عمل درآور. جک کنفیلد، نویسنده کتاب اصول موفقیت، چطور از جایی که هستی، به جایی برسی که می دارن هاردی انجیل جدیدی در حوزه اصلاح و پیشرفت فردی نوشته است. اگر به دنبال راهنمای واقعی هستی، یک برنامه واقعی با ابزار واقعی که می میتواند زندگیت را تغییر دهد و رؤیاهایت را به واقعیت تبدیل کنند، اثر مرکب همان است که دنبالشی. قصد دارم که با استفاده از این کتاب برگردم و به آنچه نگاه کنم که باید در زندگیم از نوع روی آن کار کنم. ده جلد از این کتاب بخر، یکی برای خودت و نه تا برای کسانی که دوستشان داری و همین الان به دستشان برسان. کسانی که آن را می‌گیرند ممنونت خواهند شد. دیوید باخ، بونیان گزارش فینیشریچ.닷کم و نویسنده 8 کتاب پرفروش نیویورک تایمز از جمله میلیونر خودکار. این کتاب تو را قادر میسازد پله های نردبان موفقیت را دو تا یکی بالا بروی. آن را بخر، دشنو و در کتابخانه تان نگهدار گیتومر، نویسنده کتاب قرمز رموز فروش موفق دارن هاردی با بهرهگیری از موقعیت منحصر به فردش به عنوان ناشر مجله موفقیت مجموعی از افکار موفقترین آدم های دنیا را گردآوری، و در قالب اصولی مهم خلاصه و ارائه کرده است اصولی ساده و سرراست که زندگی من و بقیه رهبران کسب و کاری را که می شناسم هدایت کردند این کتاب راه رسیدن به موفقیت خوشبختی و رضایتمندی بیشتر را به تو نشان می دهد. دانی دویچ مجری تلویزیون و رئیس هیئت مدیری شرکت دویچ اثر مراکب فرمولی بی برای رسیدن به زندگی رؤیاییت است. بگذار که قدم به قدم راهنمای تو باشد. آن را بخوان و بشنو و با دل و جان را بیاموز ولی از همه مهمتر آنها را عملی کن. کریس وایدنر، سخنران و نویسنده کتاب هنر تأثیر گذاری متقاعد کردن دیگران از خودت شروع می شود. و کتاب دوازده ستون. دارن هاردی با کتاب اثر مرکب خود ثابت می کند که وقتی عقل و تجربه درست به کار گرفته شود، نتایج خارقلاده و و را به بار می آورد. این قدم های ساده را دنبال کن و همانی شکه قرار بوده باشی. دنیس ویتلی، سخندران و نویسنده کتاب روانشناسی موفقیت اثر مرکب به تو کمک خواهد کرد رقیبهایت را شکست دهی. برچالش هایت قلبه کنی و آن زندگی را که لایقش هستی خلق کنی تی هارو نویسنده رازهای ذهن میلیونر کتاب پرفروش نیویورک تایمز آینشتین گفته است مرکب شدن هشتمین مورد از عجایب دنیا است برای مرکب شدن موفقیت هایت کتاب خارقلادی دوستم دارن هاردی را بشنو درک کند و آموزه هایش را به طور کامل کار ببند تا همه رؤیاهایت، امیدهایت و خواستهایت به واقعیت بپیوندند. مارک ویکتور هنسن نویسنده همکار مجموعه پرفروش نیویورک تایمز با عنوان سوپ جوجه برای روح و همچنین کتاب میلیونر یک دقیقی آدم هایی که از موفقیت حرف میزنند. ولی راههای ترجمان آن را در زندگی های شخصیشان در روابطشان، ازدواجشان و خانواده هایشان احترام یا تحسین ما را از آن خود نمی کنند. در حقیقت حرفهایشان برایمان باده هواست. از زمانی که باد دارن هاردی آشنا شدیم هرگز هیچ گفتهگویی با هم نداشتیم که در آن درباره فرزندانمان همسرانمان و حال و روز خانوادهمان صحبت نکرده باشیم. ما فکر می کنیم که دارن در مورد رسیدن به موفقیت خیلی می و حتی از این مهمتر می که دیگران به دلایل درست به موفقیت برسند ریچارد و لینده ایر نویسندگان کتاب پرفروش نیویورک تایمز ارزش‌ها را به فرزندانتان بیاموزید کتاب اثر مرکب دارن هاردی نقطه اوج اصول موفقیت است و به درد هر کسی که در طلب موفقیت است میخورد. او به عنوان رهبری متفکر سهم به در صنعت موفقیت داشته است. در یک کلام یک کتاب خاار العاده استدمن گراهام، نویسنده، سخنران و کارآفرین. هر از گاه این فرصت را میابی که از جایی که اکنون هستی به جای برسی که هموار آرزویش را داشتی. این کتاب همان فرصت است. و حالا زمان بهره بردن تو از آن است. اثری بینظیر از یک آدم مهم. رابین شارما، نویسنده کتاب پرفروش راهبی که فراریش را فروخت و کتاب رهبری که عنوانی نداشت. من عمرم را صرف کمک به دیگران برای شناختن آنچه برای موفق شدن لازم است کردم تا به موفقیت و به نتایج آنی دست یابند. و برای همین هم هست که عاشق این کتاب شدم و خواندنش و شنیدنش را به همه موکلینم هم توصیه می کنم دارن هاردی استعداد حیرت انگیزی دارد در به اشتراک گذاشتن تکنیک های قدرتمند موفقیت و بیان آنها با چنان شیوایی و اثر بخشی که تو می توانی بدون اتلاف وقت گرانبهایت مستقیم به سراغ عملی کردن فرمول موفقیت او بروی کانی پوتستا سخندران نویسنده و مربی مدیران اجرایی اگر یک نفر باشد که اصول اساسی موفقیت را بداند او کسی نیست جز دارن هاردی ناشر و دبیر تحریریه مجله موفقیت این کتاب درباره بازگشت و تمرکز روی اصولی است که شالوده کسب موفقیت هستند کتاب اثر مراکب را راهنمای عملی زندگیت کند. هر بار یک قدم ساده دکتر تونی الساندرا نویسنده های قانون نغری و کاریزما دارن هاردی با نوشتن اثر مرکب به جرگی بزرگترین نویسندگان در حوزه رشد و پیشرفت فردی پیوست است اگر برای رسیدن به موفقیت و به فعل رساندن های بالقوهت مسمم هستی خواندن این کتاب یک ضرورت است این کتاب راهنمای عملی تو برای دستیابی به موفقیت است. ویک کنند رئیس اجرایی از شرکت ناینتینگل کنند زندگی هم پرشتاب می‌گذرد و هم پر از چیزهایی است که حواس ما را از مسائل مهم پرت می کنند. اگر می‌خواهی به شیوه‌ای کارآمد پیشرفت کنی، به یک بار شنیدن این کتاب قناعت نکن. با دقت شروع به شنیدن دوباره آن کن و قسمت‌های مهمش را یادداشت کن. تونی جری مربی برخی از مدیران اجرایی برتر و تعدادی از اشخاص موفق دنیا. مجله موفقیت بیش از یک قرن پیش شروع به کار کرد و از همان روز اول همواره سرچشمه‌ای از ایده‌های قدرتمند بود است. حالا دارن هاردی مسئول این مجله در قرن 21 اصول بنیادین مورد نیاز تو برای خلق زندگی رؤیاییت را در این کتاب خلاصه و عرضه کرده است. نباید این کتاب را بشنوی، باید آن را از اول تا آخر حریسانه ببلی. ستیف فاربر، نویسنده ی کتاب های پرفروش جهش انقلابی و بزرگتر از خودت. هر کسی که در جستجوی موفقیت است، باید این کتاب را بشنود. میخواهی بدانی که برای موفق شدن چه چیزهایی لازم است؟ میخواهی بدانی که چه کاری باید انجام دهی؟ همه جوابها در کتاب اثر مرکب هست. این کتاب راهنمای عملی تو برای رسیدن به موفقیت است. کیس فرازی نویسنده کتابهای پرفروش نیویورک تایمز چه کسی پشتیبان توست و هرگز تنها قضا نخور؟ اثر مرکب راهنمای قدرتمند و جامعی برای موفقیت است. این کتاب استراتژی کاملی به تو ارائه می دهد برای رفتن از جایی که هستی به جایی که می خواهی باشی. نام دارن هاردی با موفقیت گره خورد است. توصیه من این است که این کتاب را بشنوی آموزه هایش را عملی کنی و به موفقیت برسی. جفری هیزلت، مدیر بازاریابی شرکت کدک و نویسنده کتاب آزمون آینه می توانی باقی عمرت را صرف فهمیدن این موضوع کنی که چطور می شود به موفقیت رسید یا می توانی اصول و روش های اثبات شده و امتحان پس داده این کتاب را دنبال کنی انتخاب با خودت است که این کار را به شیوه سختش انجام بدهی یا به شیوه هوشمندانه. جان آسراف نویسنده کتاب های جواب و از هر چیز زندگی لذت ببر دارن هاردی با نوشتن این کتاب بالاخره کاری را که باید انجام میشد، انجام داد این کتاب چکیده ی از اصول اساسی مورد نیاز است که برای رسیدن به زندگی که همیشه در آرزوگش به آنها احتیاج داری در استفاده از این اصول اساسی، مسلط شو، بر آیندهت مسلط خواهی شد دان هاتسون مدیرعامل شرکت یو اس لرنینگ سخنران و نویسنده همکار کتاب پرفروش نیویورک تایمز با عنوان کارآفرین یک دقیقه‌ای زندگیت نتیجه خالص هر قدمی خواهد بود که برمیداری بگذار این راهنمای قدرتمند به تو نشان دهد که چطور انتخاب‌های بهتری بکنی چطور عادت بهتری در خودت شکل دهی و چطور افکار بهتری در ذهنت پرورش دهی موفقیت حقیقتا در دستان توست در همین کتاب جیم کسکارت سخنران و نویسنده کتاب های اصل بلوط و روابط فروش در عصر جدید در زاپوس یکی از ارزش اصلی ما طلب رشد و یادگیری است در لابی دفاتر مرکزی امان هایی داریم که کتاب های مفیدی را در اختیار کارمندان و ملاقات کنندگان میگذارند. که به نظرمان به رشد شخصی و حرفی آنها کمک می نمیتوانم برای اضافه کردن کتاب اثر مرکب به کتابخانهمان صبر امان کنم. تونیسیه نویسندی کتاب عرض شادی و مدیرامل شرکت زپوس اگر کسی بوده که نبض موفقیت را در دست گرفته کسی نیست جز دارن هاربی ناشر و سردبیر تحریریه مجله موفقیت من همیشه مشتاق شنیدن و خواندن حرفهایش بودم او استادانه ایده‌های بزرگ را در هم میتند. لری بنت رئیس انجمن سخنرانان و نویسندگان و رئیس نتورکینگ گروپ این کتاب را تقدیم می به جری هاردی بهترین رفیق زندگیم. پدرم، مردی که با رفتارش اصول اثر مرکب را به من آموخت. و به استاد زندگیم جیمران، مردی که علاوه بر خیلی از آموزه‌ها به من یاد داد تا از چیزهایی حرف بزنم که برای افرادی که به خودشان و عزیزانشان اهمیت می‌دهند مهمند. قدردانی من از تیم خودم در رسانه موفقیت و مجله موفقیت تشکر و قدردانی می کنم. کسانی که مرا در این کار پر زحمت و راه پر از خون دل حمایت کردند. مخصوصا دوستان و همکاران عزیزم رید بیلبری و استوارد جانسون. و با تشکر از همکار و همراه هم لیندا سیورتسن که به انتخاب داستانها و تجربه های گذشته ام کمک کرد و به کارم نظم و انسجام خاصی بخشید. و با تشکر از ویراستارمان ارین کیسی به خاطر جادوی ویرایشش و با تشکر از لیزا آکر دیگر ویراستار نابغهمان در مجله موفقیت و همچنین ویراستار ارشدمان دبورا هایس و با تشکر از انبوهی از متخصصان برجسته حوزه رشد فردی که در طول دو دهه گذشته با آنها کار کردم و از آنها بسیار آموختم تمام مدیران ها کارآفرینان تحول و افراد فوقالعاده موفقی که این شانس را داشتم که با آنها مصاحبه کنم و بینش ها و ایده ها و تجربه های آنها را بشنوم و با تشکر از تمامی خوانندگان مجله موفقیت، وبلاگم و سایر آثارم همان کسانی که های پرشور و مثبتشان بخش من بودند تا همچنان به دنبال یافتن هایم باشم و از این طریق بهتر بتوانم به دیگران کمک کنم توانمندیهای خود را بیابند و بالاخره و از همه مهمتر به همسر زیبا و خارقلاده هم جورجیا که در مدتی که مشغول نوشتن این کتاب بودم بر بسیاری از مسائل چشم فرو است، از شب دیر رسیدنها گرفته تا از دست دادن آخر هفته هایی که می توانستیم با هم باشیم. شدار اناوین فصل های این کتاب ساده به نظر میآیند: استراتژی‌های موفقیت دیگر مدت هاست که راز نیستند ولی اکثر آدمها آنها را نادیده میگیرند. فکر می کنی که راز موفق شدن را میدانی؟ همه همین فکر را می کنند. ولی وقتی استراتژی های این کتاب را به ترتیب به کار ببندی درآمدت، زندگیت و موفقیتت دیگر هرگز مثل قبل نخواهد بود. من به عنوان ناشر مجله موفقیت تمام اینها را به چشم دیدم. هیچ چیز به پای قدرت اثر مرکب اقدام های ساده که در گذر زمان درست انجام شوند نمیرسد. این کتاب راه حلی واقعی است برای چیزهایی که برای رسیدن به موفقیت های بزرگ در زندگیت به آنها نیاز داری. رویایت، خاستت یا هدفت در زندگی هرچه که باشد برنامه رسیدن به آن در این کتابی که در دست داری یافت می شود. به شنیدن این کتاب ادامه بده و بگذار که دنیایت را زیر و رو کند. مهم نیست چه یاد می‌گیری یا از چه استراتژی و تاکتیکی استفاده می کنی. در هر حال موفقیت حاصل اثر مرکب است پیام ویژگی آنتونی رابینز در طول سدهه گذشته افتخار کمک به بیش از چهار میلیون نفر را داشتم تا به موفقیت و پیشرفت های که میخواهند در زندگیشان برسند. من با گروه های بسیار متنوعی از آدم ها کار کردم. از رئیس جمهوران کشورها گرفته تا زندانیان، ورزشکاران المپیک و هنرمندان برنده ازکار. از کارآفرینان میلیاردر گرفته تا کسانی که تازه در تلاش برای راه انداختن کسب و کارشان هستند. چه بازوجی کار کردم که برای جلوگیری از فروپاشی خانوادهشان تقلا کردند و چه فردی در زندان که دنبال راهی برای تغییر درونی و تحول در زندگیش بوده تمرکز من همیشه روی کمک به آدمها برای رسیدن به نتایج واقعی و ماندگار است. این کار با قرصی جادویی یا فرمولی اسرارآمیز انجام شدنی نیست تنها راه قلبه بر الگوهای مخرب و رسیدن به زندگی معنادار شناخت ابزارها، استراتژیها و دانش واقعی برای این کار است دارن و من هر دو از سن خیلی کم تصمیم گرفتیم که کنترل زندگی هایمان را در دست بگیریم ما برای یافتن جواب هایمان به دنبال آدم هایی گشتیم که دوست داشتیم مثل آنها زندگی کنیم بعد آنچه را که از آنها یاد گرفته بودیم در زندگی خودمان بکار بستیم اصلا عجیب نیست که هر دوی ما جیم ران را استاد خود می دانیم. جیم استاد کمک به آدمها برای شناختن حقایق، قوانین و روش بود که به موفقیت واقعی و ماندگار منجر می جیم به ما یاد داد که موفقیت و پیروزی به شانس ربطی ندارد بلکه یک علم است. قطعاً آدم ها با هم فرق دارند ولی قانون های موفقیت همه جا یکی تو آنچه را که میکاری درو میکنی. نمیتوانی از زندگی چیزی را بگیری که حاضر نیستی به آن بدهی. اگر عشق بیشتری میخواهی، عشق بیشتری بده. اگر موفقیت بیشتری میخواهی، به دیگران کمک کن به موفقیت بیشتری دستیابند. وقتی که علم موفقیت را یاد گرفتی و در آن استاد شدی، موفقیتی را که در آرزویش هستی، خواهی یافت. دارن هاردی شاهد زنده این این است. او حرف و عملش یکیست آنچه در این کتاب با تو در میان گذاشته بر شالوده آن چیزی است که در زندگیش جواب داده است و همینطور هم در زندگی من او کسی است که اصول پایهای ساده اما عمیق ضروری برای موفقیت را یافته و آنها را بکار برده است از این طریق تا 24 سالگی به درآمد سالانه بیش از یک میلیون دلار رسید و در 27 سالگی شرکتی به ارزش 50 میلیون دلار ساخت. در طول 20 سال گذشته زندگی او آزمایشگاهی شخصی برای مطالعه و تحقیق روی موضوع موفقیت بود است. او از خودش به عنوان موش آزمایشگاهی استفاده کرده و هزاران ایده، منبع و ابزار مختلف را آزمایش کرده است. و از طریق شکست و پیروزیهایش معلوم کرده که کدام ایدهها و استراتژی ارزش دارند و کدام فقط حرف مفتند. شانزده سال است که با دارن دوست هستم و بارها با او ملاقات کردم. او به عنوان یکی از رهبران صنعت رشد و موفقیت فردی با صدها نویسنده سخندران و مدیر برتر هم داشته است. او ده ها هزار کارآفرین تربیت کرده. به بسیاری از شرکت بزرگ مشاوره داده و شخصا دهها مدیرعامل و مدیر اجرایی کارآمد را تعلیم داده است و از میان این همه تجربه آنچه را واقعا اهمیت و کاربرد دارد از آنچه اهمیت و کاربرد ندارد بیرون کشیده است. دارن به عنوان ناشر مجله موفقیت در مرکز صنعت رشد فردی قرار دارد. او در مورد انبوهی از موضوعات مرتبط با موفقیت با رهبران برجستهی مانند روچارد برنسون، جنرال کالین پاول و لانس آرمسترانگ مصاحبه کرده است و بهترین ایده های آنها و حتی چند تا از ایده های من را عمیقا کند و کاف کرده و اصاری آنها را عرضه کرده است. او دایرت المعارفی جامع و کامل از موفقیت فردی است. سرشار از داده های مرتب کننده، فیلتر کننده، تحلیل کننده، خلاصه کننده و دست بندی کننده او شاخ و برگ اضافی را چیده و روی اصولی پای که مهم هستند تمرکز کرده است اصولی اساسی که می توانی فورا در زندگی خودت به کارشان ببندی تا نتایج ملموس و ماندگار برایت رقم بزنند اثر مرکب کتاب راهنمای عملیاتی است که به تو یاد میدهد چطور صاحب سیستم بشوی؟ چطور کنترلش کنی چطور در استفاده از آن خوب شوی و چطور آن را بر اساس نیازها و خواستهایت شکل دهی وقتی این کار را بکنی دیگر هیچ چیزی نیست که نتوانی به دست آوری یا بان با برسیم اثر مرکب بر پایه اصلی است که من در زندگی و آموزش‌های خودم استفاده کردم اینکه تصمیم‌های تو سرنوشتت را شکل می‌دهند آینده همان چیزی است که تو میسازی؟ تصمیم های کوچک هر روزت یا تو را به آن زندگی که در آرزویش هستی می‌رسانند یا به فاجعه در حقیقت این تصمیم های خیلی کوچک هستند که زندگی های ما را شکل می دند. اگر فقط به اندازه دو میلیمتر از مسیرت منحرف شوی خط سیر زندگیت عوض خواهد شد و آنچه که آن زمان تصمیم کوچک بی اهمیتی به نظر می‌آمد، اکنون می اشتباه خیلی بزرگی قلم داد شود هر انتخابی نحوه زندگی امروزت را شکل می‌دهد. از آنچه که میخوری و جایی که کار میکنی گرفته تا شیوه که اوقات فراغتت را سپری می‌کنی و آدمهایی که زمانت را بانها میگذرانی. ولی از همه مهمتر نحوه گذران بقیه عمرت را مشخص می کند. خبر خوبی این است که تغییر در درون توست. درست به همان شیوه که یک محاسبه اشتباه دو میلیمتری میتواند تو را از مسیر اصلی زندگیت بسیار دور کند، یک تصحیح دو متری هم میتواند تو را صاف به خانه برگرداند. راهش یافتن برنامه، راهنما یا نقشه است که به تو نشان دهد خانه کجاست، چطور با انجا برسی و چطور در طول مسیر استوار به راحت ادامه دهیم. این کتاب همان برنامه اقدام مفصل و ملموس است، بگذار که انتظاراتت را دگرگون کند، پیش‌فرض‌هایت را حذف کند، کنجکاویت را شعلهور سازد و ارزش را به زندگیت بیاورد، آن هم درست از همین الان، از این ابزار بهره بگیر. آن را عنوان راهنمایی برای خلق زندگی و موفقیت دلخواهت استفاده کن. اگر این کار را بکنی و اگر تمام کارهای درست دیگر را انجام دهید و تا مدت ها هر روز به انجام دادنشان ادامه دهی مطمئنم بهترین چیزی را که زندگی به تو عرض می میکند تجربه خواهی کرد دومید یک زندگی موفق و پر از شور و اشتیاق برای تو آنتونی روبینز کارآفرین نویسنده و استراتژیست حوزه موفقیت و کرد پیش گفتار این کتاب درباره موفقیت و هر آن چیزی است که برای دستیابی به آن واقعا نیاز است وقتش است کسی اصل ماجرا را صاف و پوست کنده به تو بگوید دیگر خیلی وقت است که فریب حرفهای این و آن را میخوری. موفقیت هیچ معجون جادویی فرمول سری یا راه حل خلق و ساءِی ندارد هرگز با گذراندن دو ساعت در روز روی اینترنت هزار دلار در سال در نمی آوری. در عرض یک هفته پانزده کیلو کم نمی کنی. با مالیدن کرمی روی صورتت بیست سال جوانتر نمیشوی زندگی زناشویی خود را با خوردن یک قرص درست نمی کنی. یا موفقیت ماندگار را با ترها و نقشه هایی که برای واقعی بودن زیادی خوبند نصیب خود نمی کنی. عالی می اگر می موفقیتت، شهرتت، اعتماد به نفست، رابطه های خوبت، سلامتیت، سعادتت و آسایش و رفاهت را یک جا در یک بسته بندی زریف و مرتب از فروشگاه محلت بخری و به خانه ببری. ولی متاسفانه راهش این نیست. ادعاهای حیجان انگیز در رابطه با پول دار شدن، خوشندام شدن، جوانتر شدن، جذاب شدن و غیره مدام ما را بمباران می کنند. همگی هم یک شبه و فقط و فقط با مثلا سه بار پرداخت سی و و 95 سنت ناقابل. این پیام های بازاریابی تکرار شونده، احساس و درک ما را در رابطه با آنچه که واقعاً برای موفق شدن لازم است، تحریف کردند. ما اصول پایه‌ای ساده ولی جرفی را که برای موفق شدن لازم است، از نظر دور داشته‌ایم. من از همه اینها خسته شدم. دیگر نمی‌خواهم بنشینم و این پیام های بی سر و ته را تماشا کنم که آدمها را از مسیر درست منحرف می کنند. من این کتاب را می نویسم تا تو را به اصول اولیه برگردانم قرار است کمکت کنم گوشهایت را روی جار و جنجال های بیهوده ببندی و تمرکزت را روی اصول اساسی که مهم هستند بگذاری می توانی فورن تمرین ها و اصل های موفقیت ذکر شده در این کتاب را که درستیشان در گذر زمان ثابت شده است در زندگی خودت به کار ببندی تا نتایج ملموس و ماندگار به دست آوری من نحوه مهار قدرت اثر مرکب را به تو یاد خواهم داد. همان سیستم عاملی که خوب یا بد زندگی تو را اداره می کند. اگر این سیستم را به نفع خودت استفاده کنی، حقیقتا قادر خواهی بود زندگیت را متحول کنی. حتما شنیده ای که می توانی به هر چیزی که ذهنت را به آن معطوف می کنی برسی. درست است؟ بله، البته به شرطی که بدانی چطور. اثر مرکب کتاب راهنمایی است که به تو میآموزم چطور در استفاده از این سیستم خبره شوی وقتی خبره شدی هیچ چیزی نیست که نتوانی به دست آوری یا در آن موفق شوی از کجا می دانم اثر مرکب تنها فرایندی است که برای رسیدن به نهایت موفقیت به آن نیاز داری اولین اینکه من این اصول را در زندگی خودم به کار بستم و موفق شدم البته خوشم نمیآید مثل بعضی از نویسنده ها موفقیت و شهرت و ثروت را جار بزنم ولی مهم است که بدانی حرفهایم برگرفته از تجربه های خودم است. من شاهدی زنده به تو عرضه می کنم، نه مشتی نظریه تقلیدی تکراری. همانطور که آنتونی رابینز اشاره کرده است، من در تلاشهای کاریم به موفقیت دست دستیافتم، چون مصمم بودم طبق اصولی که در این کتاب می شنوی زندگی کنم. در عرض 20 سال گذشته، تحقیقات جامعی درباره موفقیت و دستاوردهای فردی کردم ست هزار دلار را خرج آزمودن هزاران ایده و منبع اطلاعاتی و خط معشی ها و فلسفه های مختلف کردم تجربه شخصی من ثابت کرده است که مهم نیست چه میاموزی یا چه استراتژی یا تاکتیکی را به کار میبری موفقیت حاصل سیستم آمل اثر مرکب است دوم که در طول 16 سال گذشته من یکی از رهبران صنعت موفقیت و پیشرفت فردی بودم با رهبران فکری سخنرانان و نویسندگان معتبر کار کردم. به عنوان سخنران و مشاور دهها هزار کارآفرین را تربیت کردم. من مربی رهبران کسب و کار، مدیران شرکت ها و آدم های موفق بیشماری بودم. از هزاران مورد تحقیقاتی را که برای رسیدن به موفقیت به درد میخورد و آنچه را که به درد نمیخورد بیرون کشیدم سوم اینکه، به عنوان ناشر مجله موفقیت، هزاران مقاله دریافتی و کتاب را پیوسته زیر و رو می کنم. به انتخاب متخصصانی که در مجله با آنها مصاحبه می کنیم کمک می کنم و تمام مطالب آنها را بررسی می کنم. هر ماه با 5 شش متخصص برتر در رابطه با انبوهی از موضوعات موفقیت مصاحبه می کنم و به بهترین ایده‌هایشان دست می آبم. تمام روز در حال خواندن، مرتب کردن جدا کردن و شنا کردن در اقیانوسی از اطلاعات مربوط به پیشرفت و موفقیت فردی هستم. حرفم این است. آدمی مثل من که چون چشمانداز چشمنداز جامعی از این صنعت دارد و همینطور بینشی که حاصل مطالعه آموزه‌ها و روش ها و عادت های برخی از موفق ترین آدم های است, کم کم واقعیت برایش نمایان می شود و حقایق اساسی ناپیدا مثل روز روشن می شود. من که تقریباً کل این حقایق را دیدم، خاندم و شنیدم، دیگر گول تبلیغات دروغین یا پیامبری خودخوانده را نمی خورم که ادعای ارائه جدیدترین های علمی را دارد. هیچکس نمیتواند به من حق بفروشد. من های خیلی خیلی زیادی دارم. راه های خیلی زیادی را طی کردم و حقیقت را به شیوه سختی آموختم. همانطور که استاد من فیلسوف بزرگ حوزه کسب و کار جیمران گفته است هیچ اصول جدیدی وجود ندارد. حقیقت چیز جدیدی نیست، بلکه موضوعی قدیمی است. باید کمی با آن یارویی که میگوید بیا اینجا می‌خواهم های ساخت خودم را نشانت بدهم مشکوک باشی. نه، عتیق ساختنی نیست. آنچه در این کتاب آمده همان چیزی است که واقعا مهم است. تمام شاخ و برک های اضافی و هواشی بیهوده که ربطی به اصل موضوع ندارد حذف شدهاند اما چه چیزی واقعاً جواب میدهد؟ کدام اصول اساسی هستند که وقتی بر آنها متمرکز شوی و در آنها استاد شوی آن سیستم عاملی را به وجود میآورند که می تواند تو را به هر هدفی که در آرزویش هستی برساند و کمکت کند به شیوه مورد نظرت زندگی کنی این کتاب مشتمل بر آن شش اصل اساسی است آنها سیستم عاملی را ایجاد می کنند که اثر مرکب خوانده می شود قبل از اینکه به سراغ بررسی این اصول برویم بگذار حشداری به تو بدهم. به آوردن موفقیت سخت است. فراگندی پر زحمت، خسته کننده و گاهی حتی آور. ثروتمند شدن، با نفوذ شدن و تبدیل شدن به یکی از بهترین های حوزت در سطح جهان کاری آهسته و شاق است. البته اشتباه برداشت نکن. تو تقریباً آنی نتایج حاصل از دنبال کردن این قدمها را در زندگیت خواهی دید. ولی اگر از تلاش، انزباط و تعهد نفرت داری، همان بهتر که دوباره تلویزیون را روشن کنی و امیدت را به تبلیغات بعدی ببندی. همان وعده های مشتری پسند در مورد موفقیت یک شبه. البته اگر کارت اعتباری پروپیمانی داری. جان کلام اینکه تو همین حالا هم تمام چیزهایی را که برای موفق شدن نیاز داری میدانی. احتیاجی به یادگیری چیز بیشتری نیست. اگر تمام آنچه نیاز داشتیم اطلاعات بیشتر بود، آنگاه هر کسی که به اینترنت دسترسی داشت در امارت اعیانی زندگی می کرد، متناسب داشت و با تمام وجود خوشبخت و خوشحال بود. آنچه تو نیاز داری، اطلاعات جدید یا اطلاعات بیشتر نیست. تو نیاز به یک برنامه اقدام جدید داری. وقتش از رفتارها و عادتهای جدیدی را در خودت خلق کنی که به جای کشاندنت به مسیر شکست، تو را در جاده موفقیت بیندازند به همین سادگی در طول کتاب از منابعی نام بردم که در سایت thecompoundeffect.com در دسترس همگان قرار دادم لطفاً به این سایت سر بزن از آن منابع استفاده کن این کتاب و ابزارهایی که برای کمک به تو فراهم کردم بهترین هر را که شنیدم دیدم مطالعه کرده و امتحان کرده به تو عرضه می کند در واقع ثاره آن چیزی است که هر ماه در مجله موفقیت به تو عرضه می کنیم. همگی در یک کتاب کوچک متول کننده زندگی و صد البته کتابی که فهمش بسیار ساده است. حالا بیا شروع کنیم. فصل 1 اثر مرب در عمل شنید که میگویند هر که آهسته و پیوسته پیش برود مسابقه را میبرد؟ تا حالا داستان لاک پشت و خرگوش را شنیده ای. خانم ها و آقایان: من آن لاک پشت هستم. به من وقت کافی بدهید هر زمان در هر مسابقه تقریباً تقریبا هر کسی را میبرم. چرا؟ نه به دلیل اینکه بهترین یا باهوشترین یا سریعترین ترین هستم. میبرم چون عادت های مثبتی در خودم پرورش دادم و در بهکار بردن آن عادت ها ثابت قدم هستم. هیچ کس در دنیا به اندازه من به داشتن ثبات قدم و پایداری اعتقاد ندارد. من شاهد زندگی بر این مسئله هستم که داشتن ثبات قدم و استقامت کردن کلید اصلی موفق شدن است. در عین حال میتواند دام بزرگی هم باشد. چون بیشتر آدمهایی که برای موفق شدن تلاش می کنند، چطور ثبات قدمشان را حفظ کنند. من می‌دانم. این مسئله را مدیون پدرم هستم. در اصل، او اولین مربیم برای شعله کردن قدرت اثر مراکب در من بود. والدینم در هجده ماهگی من از هم جدا شدند و پدرم مرا تنهایی بزرگ کرد. او اصلا از آن و پدرهای ملایم ناس پرور نبود. قبلا مربی راگبی دانشگاه بود. و بود که مرا برای موفق شدن باراورد به لطف پدر زنگ بیدار باش خانه ما هر روز ساعت شش صبح بود آن هم نبا نوازش محبت ها یا حتی صدای زنگ ساعت نه من هر روز صبح با صدای تکراری برخورد وزنههای آهنی به کف سیمانی گاراژمان من که کنار اتاق خوابم بود بیدار می شدم مثل این بود که چهار متر آن طرفتر از یک منطقه ساخت و ساز از خواب بیدار شوی. پدر روی دیوار گاراژ، تابلویی با مضمون نابرد رنج گنج میسر نمی‌شود زده بود. تابلویی که وقتی حرکات مختلف ورزشی را انجام می‌داد، به آن خیره می‌شد. چه باران می‌آمد، چه برف، چه آفتابی بود، چه ابری، پدر شلوارک به پا با گرم کن رنگ رو رفته رفتهاش تمرین می‌کرد. هرگز یک روز را هم از دست نمی‌داد. می‌توانستی ساعتت را بر اساس تمرین‌های روتین روزانه او تنظیم کنی. من هر های بیشتری از کارهایی داشتم که یک خانهدار و باغبان روی هم انجام می‌دادند. از مدرسه که برمیگشتم، همیشه لیستی از کارها در انتظارم بود. کندن علف‌های هرز، جمع کردن برک ها، جارو کردن گاراژ، گردگیری کردن، جاروبرقی کشیدن، شستن زرف ها، خلاصه هر چه فکرش را بکنی. و تازه با همه این کارها باید نمره‌هایم هم, هم در مدرسه خوب می‌بود. ولی به قول پدر همین بود که بود. پدر سمبل توجیه موقوف بود. حتی اجازه نداشتیم به دلیل مریضی به مدرسه نرویم. مگر اینکه واقعا استفراغ میکردیم، از جایی از بدنمان خون می‌آمد یا استخوانمان بیرون میزد. اصطلاح استخوان بیرون زدن یادگار دوران مربیگریش بود. بازیکنانش میدانستند تعویض نمیشوند مگر اینکه آسیب جدی ببینند. یک بار یکی از بازیکنان تیمش از او خواسته بود از بازی بیرون کشیده شود. پدر گفته بود: "محال است مگر اینکه هایت بیرون زده باشد." آن بازیکن شانه بندش را کنار زده بود و بله، استخوان ترقوه‌اش معلوم بود. فقط آن وقت اجازه یافت که از زمین بیرون بیاید. یکی از فلسفه های اصلی پدر این بود: "مهم نیست که چقدر باهوش هستی یا نیستی. باید نداشتن تجربه، مهارت هوش یا توانایی ذاتی خودت را با سخت کوشی و تلاش زیاد جبران کنی. اگر رقیبت از تو باهوشتر، با استعدادتر یا با تجربه تر است، فقط باید سه یا چهار برابر سختتر از او کار کنی. آن وقت میتوانی به راحتی شکستش بدهی. مهم نبود که چالش چیست. او به من یاد داد که هر کمبودی را با کار و تلاش زیاد جبران بکنم. آیا پرتابهای آزاد را در بازی از دست میدهی؟ یک ماه هر روز هزار پرتاب آزاد تمرین کن در دیریب زدن با پای چپت عالی نیستی روزی سه ساعت دیریب زدن تمرین کن نمره هایت در ریاضی پایین است بنشین و شب و روز ریاضی بخوان معلم خصوصی بگیر و تمام تابستان جان بکن تا نمره خوب بگیری خلاصه بهانه بی بهانه اگر در چیزی خوب نیستی سخت تر کار کن هوشمندان تر کار کن پدر حرف و عملش یکی بود برای همین هم از مربی راگبی به مقام فروشنده‌ای حرفه‌ای رسید. اول رئیس شد و در نهایت شرکت خودش را راه انداخت. البته پدر اهل بکن نکن نبود. از همان اول به ما اجازه میداد خودمان راهمان را پیدا کنیم. او طرفدار سرسخت مسئولیت پذیری فردی بود. اینطور نبود که با توپ و مجبورمان کند درس بخوانی. فقط باید کارنامهمان را نشانش میدادیم. اگر نمره های خوب گرفته بودیم، تشویق می شدیم. پدر ما را به بستنی فروشی پرینگز می برد و بستنی مخصوصش را که با تکه های بزرگ موز و کلی مخلفات دیگر بود برای میخرید. می خرید. خیلی اوقات خواهرها و برادرهایم نمره های خوب نمی گرفتند. برای همین خبری از بستنی هم نبود. خریدن بستنی کار بزرگی بود، بنابراین برای به دست آوردنش باید خودت را حلاک می کردی. انضبات و رویه پدر سرمشقی برای من بود او بوت من بود و میخواستم که به من افتخار کند همیشه میترسیدم که نکند از خودم ناامیدش کنم یکی از فلسفه های او این بود کسی باش که نمیگوید هم رنگ جماعت شدن افتخاری ندارد آن آدم متفاوت باش آن آدم استثنایی برای همین هم بود که من هیچ وقت به مواد مخدر لب نزدم نه چون پدرم مدام در مورد مزراتش به من گوش زد می کرد. نه، خودم نمی خواستم آن آدمی باشم که صرفاً به خاطر دنبال روی از دیگران مواد مصرف می کند. جدا از این، نمی خواستم پدر را از خودم ناامید کنم. به لطف پدر در دوازده سالگی در برنامه خبره شدم که به اندازه برنامه کارآمدترین مدیرامل ها مفید بود. البته گاهی قر می زدم و ناله می کردم. خب بچه بودم. ولی حتی آن موقع هم در دل خوشحال بودم که بر هم کلاسی هایم برتری داشتم. پدر به من یک امتیاز جدی و زود هنگام در رابطه با انضباط و ذهنیت داده بود که برای متعهد و مسئول بودن برای رسیدن به هر آنچه مسمم بودم به دست آورم لازم بود. تصادفی نیست که شعار مجله موفقیت این است: آنچه جویندگان موفقیت می‌خوانند. امروز من و پدرم در این مورد شوخی می‌کنیم که مرا چه فرد معتاد به موفقیتی باور است. در هجده سالگی درآمدی شش رقمی از کسب و کارم داشتم. در 20 سالگی در بالای شهر برای خودم خانه خریدم. در 24 سالگی درآمدم به بیش از یک میلیون دلار در سال رسید و در 27 سالگی رسما یک میلیونر خود ساخته بودم که کسب و کاری با درآمد بیش از پنجاه میلیون دلار داشت. همه اینها در نهایت به این منجر شده که امروزه هنوز به چهل سالگی نرسیده آنقدر پول و دارایی دارم که تا آخر عمر خودم و خانواده هم کافی باشد. پدرم میگوید: برای بدبار ووردن بچه کلی راه وجود داره. حداقل راه من راه خوبی بود. ظاهرا متاد خوبی از آب در اومدی. من واقعا مدیون مهارت های موفقیتی هستم که از پدرم و سایر استادان در طول مسیر زندگیم یاد گرفتم. هرچند که باید اعتراف کنم، مجبور شدم بیکار نشستن و زندگی کردن در لحظه یا استراحت کردن در ساحل بدون یک کپ کتاب کسب و کار یا سیدی های رشد فردی در کنارم را تمرین کنم چون انجام دادن این کارها برایم خیلی سخت است. این کتاب راز موفقیت مرا آشکار می سازد. من یک معتقد واقعی به اثر مرکب هستم چون پدرم مرا طوری بارا ورد. آن را همیشه و در همه حال زندگی کنم تا وقتی که نتوانم به هیچ شیوه ی دیگری زندگی کنم حتی اگر بخواهم ولی اگر تو مثل بیشتر آدمها باشی معتقد واقعی به اثر مرکب نیستی البته برای این عدم باور دلیل های کاملا قابل درکی وجود دارد تو مربی و سرمشق مرا نداشته ای که نشانت دهد چه بکنی تو نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده ای ما به عنوان جامعه فریب خورده ایم. ما توسط تبلیغات شرکت هیپنوتیزم هپنوتیزم شده ایم که به داشتن مشکلات نداشته ای متقاعدمان می کنند که راه های علاج در دستان آنهاست. ما همرنگ جامعه شده ایم در باور به پایان های ای که در فیلم ها می بینیم یا در رمان ها میخوانیم. ما ارزش کار سخت و مداوم را که ارزشی قدیمی و خوب است فراموش کرده ایم. بیا این مانه ها را یکی یکی بررسی کنیم تو نتیجه نهایی اثر مرکب را تجربه نکرده ای اثر مرکب، اصل درو کردن پاداش‌های های عظیم از مجموعی از انتخاب های کوچک حوشمندان است جالبترین جنبه اش برای من این است که هرچند نتایج عظیم هستند اما قدم های لازم برای رسیدن به آن نتایج در لحظه برداشته شدن آنقدرها مهم به نظر نمی رسند چه این استراتژی را برای بهبود سلامتیت استفاده کنی چه رابطه هایت چه امور مالیت و چه هر چیز دیگری که برایت مهم است تغییرات چنان ظریف است که تقریبا اصلا متوجهشان نمی شوی این تغییرات کوچک، نتیجه های آنی خیلی کمی در پی دارند یا اصلا هیچ نتیجه‌ای به بار نمی‌آورند نه پیروزی بزرگی نه پیامد آشکاری شاید بپرسی خب اگر اینطور است چرا به خودم زحمت دنبال کردن این استراتژی را بدهم در جواب باید بگویم که بیشتر مردم از سادگی اثر مرکب به اشتباه می‌افتند برای مثال بعد از هشت روز دست از دویدن می‌کشند چون هنوز اضافه وزن دارند یا بعد از شش ماه تمرین پیانو دیگر دست به آن نمیزنند، چون به جز اجرای چند ساده در نواختن هیچ آهنگی مهارت پیدا نکردند. یا بعد از چندین سال دیگر سهم بیمه بازنشستگیشان را پرداخت نمی کنند چون هیچ افزایشی در داراییشان مشاهده نمی کنند و بهتر میبینند که از آن پول نقدن استفاده کنند. آنچه متوجهش نیستند این است که، این قدم‌های کوچک به ظاهر کم اهمیتی که به طور پیوسته در گذر زمان برداشته می‌شوند تفاوت بنیادینی در زندگیشان ایجاد خواهند کرد. بگذار چند مثال دقیق‌تر برایت بزنم. انتخاب‌های کوچک هوشمندانه به اضافه ثبات قدم به اضافه زمان مساوی است با تفاوت بنیادین. سکه یک سنتی جادویی. اگر حق انتخاب بین این دو پیشنهاد را به تو بدهند، کدام را انتخاب می گرفتن سه میلیون دلار نقد همین الان یا یک تک سنتی که به مدت سی و یک روز هر روز ارزشش دو برابر می اگر این مثال را قبلا شنیده ای، می‌دانی که انتخاب درست گزینه یک سنت است، چون منجر به ثروت عظیمتری می‌شود. ولی چرا باورش اینقدر سخت است که انتخاب یک سنت منجر به پول بیشتری در پایان راه می شود. چون دیدن نتیجه نهایی خیلی بیشتر طول می کشد. بیا نگاه دقیقتری بیاندازیم؟ فرض کنیم که تو آن سه میلیون پول نقد را برمیداری و دوستت مسیر سنت را در پیش می گیرد. در روز پنجم، او فقط شانزده سنت دارد ولی تو 3 میلیون دلار داری. در روز دهم، ده پولش پنج دلار و دوازده سنت است در برابر پول کلانه تو. فکر میکنی دوستت در مورد تصمیمش چه حالی دارد؟ تو داری با سه میلیونت کلی اشقه می میکنی و از انتخابت هم کاملا راضی هستی. بعد از گذشت بیست روز در حالی که فقط یازده روز مانده، حاصل انتخاب گذینگ یک سنتی فقط پنج هزار و دویست و چهل و سه است. در این مقطع دوستت چه احساسی در مورد خودش دارد علیرغم تمام از ها و رفتارهای مثبتش به زور بیش از پنج هزار دلار دارد ولی تو سه میلیون دلار داری از اینجا به بعد است که جادوی نامری اثر مراکب شروع به نمایان شدن می کند. در روز س ویکم آن رشد اندک روزانه سکه یک سنتی مراکب شده را به ارزش ده میلیون و هفت صد و, و هفت هزار و چهار سد و هجده دلار و بیست و چهار سنت میرساند یعنی بیش از سه برابر سه میلیون دلار تو. در این مثال می بینم که چرا داشتن سبات قدم و پایداری در گذر زمان اینقدر مهم است. در روز و نهم تو سه میلیون دلار داری، اما مسیر یک سنتی به حدود دو و هفت دهم میلیون دلار ختم شده است. تازه روز سیم این مسابقه سی و یک روزه است که دوستت با پنج و سه دهم میلیون دلار از تو جلو می افتد. و فقط در آخرین روز این فوق ماراتون یک ماه است که دوستت پشتت را به خاک می‌رساند. او دست آخر در برابر سه میلیون دلار تو مبلغ ده میلیون و هفت صد و سی و هفت هزار و چهارصد و هجده دلار و بیست و چهار سنت دارد چیزهای خیلی کمی به اندازه جادوی اثر مرکب تأثیر گذارند شگفتاور اینکه این نیرو در هر حوضه از زندگیت به همین اندازه اثر گذار و قدرتمند است این هم یک مثال دیگر. سه دوست. بیا سه رفیق را در نظر بگیریم که همگی با هم بزرگ شدند. آنها در یک محله زندگی می کنند و عقاید دو احساس ها و, و حساسیت های شبیه به هم دارند. هر کدام حدود پنجاه هزار دلار در سال درآمد دارند. همگی ازدواج کردند، تندرست هستند و وزن طبیعی دارند. فقط مثل اکثر آدم ها بعد از ازدواج کمیشه کم آوردند. دوست شماره یک، بیا لری صدایش بزنیم. زندگیش مثل همیشه پیش می رود. او خوشبخت است یا فکر می کند که خوشبخت است. ولی هر از گاهی از این شکوه می کند که هرگز هیچ تغییری در روند معمول زندگیش رخ نمی دهد. دوست شماره دو، اسکات شروع به ایجاد چند تغییر کوچک می کند. تغییرهای مثبتی که ظاهرا کم اهمیت هستند. او شروع به خواندن روزانه ده صفحه از یک کتاب خوب می کند و در راه رفتن به سر کار سی دقیقه به مطلبی آموزشی یا الهام بخش گوش می دهد. اسکات می خواهد تغییرات را در زندگیاش ببیند. ولی نمیخواد عالم و آدم را خبردار کند. او اخیرا مصاحبه ای از دکتر مهمت آز در مجله موفقیت خوانده و ایده ای را از آن گرفته که قصد دارد در زندگیش اجرا کند. او میخواهد 125 کالری از رژیم روزانه خود کم کند. کار بزرگی نیست. احتمالا در مورد یک ظرف برشتو که کمتر حرف میزنیم یا عوض کردن آن قوطی نوشابه با یک بطری آب گاز دار. یا استفاده از سس مایونز به جای سس خردل برای ساندویچش در یک کلام کاری انجام شدنی و علاوه مقدار پیاده روی روزانهش را رو می میدهد و با برداشتن دو سه هزار قدم اضافی آن را به بیش از یک کیلومتر می رساند. هیچ کدام از این کارها اقدام های بزرگی نیستند که به شجاعت یا تلاش زیاد نیاز داشته باشند. صرفا کارهایی هستند که همه می توانند انجام دهند و البته انجام نمی دهند. ولی اسکات مصمم است که هر طور شده این تصمیم ها را عملی کند چون خوب میداند که علارقم آسانیشان میتوان خیلی راحت به دست کشیدن از آنها وسوسه شد دوست شماره 3 براد چند تصمیم بد میگیرد او اخیرا تلویزیونی با صفحه نمایش بزرگ خریده است تا بتواند برنامه‌های مورد علاقه بیشتری را ببیند او شروع به درست کردن غذاهایی کرده که روش پختشان را از شبکه آشپزی یاد گرفته است. لازنیا و دسر خوراکی‌های مورد علاقه اش هستند. به علاوه در اتاق نشیمن جای مخصوصی برای نوشیدنی‌ها تعبیه کرده و در هفته یک نوشیدنی الکلی به برنامه غذایش اضافه کرده است. البته اینها ظاهرا چیزهای خیلی زیادی نیستند. براد فقط می‌خواهد کمی بیشتر خوش بگذراند. بعد از پنج ماه هیچ تفاوت محسوسی بین لری اسکات یا براد دیده نمی‌شود. اسکات به خواندن هر شب چند صفحه کتاب و گوش دادن به سیدی های آموزشی و بخش هینه آمد و شد به کارش ادامه می‌دهد. براد از زندگی لذت می‌برد و کمتر کار می‌کند. لری هم به روال همیشه گیش ادامه می‌دهد. هرچند که هر کدام از این سه نفر الگوی رفتاری خاص خودش را دارد، اما پنج ماه زمان زیادی برای دیدن هر نوافت یا پیشرفت واقعی در زندگیشان نیست. آنها دقیقاً عین هم هستند. در انتهای ماه دهم ده هنوز نمی توانیم تغییرهای چشمگیری در زندگی هیچ کدام از آنها ببینیم. تازه به پایان ماه هجدهم که میرسیم اندک تفاوت هایی در ظاهر این سه دوست قابل رؤیت می شود. ولی در حدود ماه بیست و پنجم کم کم تفاوت های واقعا آشکار قابل اندازه را مشاهده می کنیم. در ماه بیست و هفتم دیگر تفاوت هایشان مثل روز روشن است. و با فرارسیدن ماه 31 تغییر حیرت انگیز است. براد الان مردی چاق است در حالی که اسکات ترک ای و خوشندام است. او صرفا با کم کردن 125 کالری از برنامه غذایی روزانهش در عرض 31 ماه 33 پوند یا 15 کیلو کم کرده است. سی و یک ماه مساوی است با 940 روز. 940 روز ضرب در 125 کالری در روز مساویست با 117500 کالری 117500 کالری تقسیم بر 3500 کالری در هر پوند مساویست با 33.5 پوند یا 15 کیلو برد در همان چارچوب زمانی فقط 125 کالری بیشتر در روز خورده و 15 کیلو اضافه کرده است او حالا 3 کیلو بیشتر از اسکات است البته تفاوت بین این دو نفر خیلی بیشتر از این هاست اسکات تقریباً هزار ساعت را صرف خواندن کتابهای مفید و گوش دادن به نوارهای پیشرفت فردی کرده و با بکارگیری دانش به تازگی آموختهش به ترفیع و افزایش حقوق دست یافته است. از همه بهتر، زندگی زناشوییش روز به روز شکوفاتر شده است. اما برادچی سر کار ناراضی است و زندگی زناشوییش در معرض خطر فروپاشی است و لری تقریباً همان جایی است که دو سال و نیم پیش بوده. با این تفاوت که اکنون اش بیشتر به آسمان بلند است. قدرت العاده اثر مرکب به همین سادگی است. تفاوت بین افرادی که اثر مرکب را در خدمت خود می گیرند در مقایسه با همتایانشان که اجازه می دهند همین اثر علیه آنها عمل کند تقریبا غیرقابل تصور است. اثر مرکب معجزه می کند. مثل پرشهای جادویی یا کوانتومی است. بعد از و یک ماه یا سی و یک سال، فردی که اثر مرکب را درست در خدمت خود گرفته، در نظر دیگران مثل کسی به نظر می آید که یک شبه به موفقیت رسیده است. اما در واقعیت، موفقیت عظیم او حاصل انتخابهای کوچک ای بوده که در گذر زمان به طور پیوسته کرده است. اثر موجی میدانم نتایج در مثالی که شنیدید به نظر چشم گیر می آیند. ولی قضیه امیختر از این حرف است. واقعیت این است که حتی یک تغییر کوچک می تواند تأثیر قابل توجهی داشته باشد که منجر به اثر موجی غیر منتظره و ناخواسته ای شود. بیا یکی از عادتهای بد برد مثلا خوردن غذاهای سنگین و چرب به دفعات مکرر را زیر زربین بگذاریم تا بهتر بفهمیم اثر مرکب، چطور میتواند به شیوه منفی هم عمل کند و اثری موجی را خلق کند که بر کل زندگیت تحصیر میگذارد. برد مقداری کیک فنجانی از طرز ای که از شبکه آشپزی یاد گرفته است میپزد؟ او به کارش افتخار میکند و خانوادهش هم عاشق این کیک ها هستند. به نظر میرسد این کارش تحسین همه را برانگیخته است. او حالا دیگر مدام از این کیک ها و دیگر شیرینی ها درست میکند. فرد آشق آشپزی خودش است و بیشتر از آنچه که باید میخورد. البته نه آنقدر زیاد که کسی متوجهش شود. با این حال، غذای اضافی موجب می شود که شبها بدخواب شود و صبحها گیج و منگ از خواب بیدار شود و در طول روز بدخلق باشد. بدخلقی و کمخابیش شروع به تأثیر گذاشتن روی عمل کرده کاریش می کند. وریش کمتر می شود و در نتیجه از رئیسش بازخوردهای منفی معیوز میگیرد. در پایان روز از شغلش است و اصلاً حال و حسله ندارد. مسیر رفت و برگشت به خانه و محل کار به نظرش طولانی تر و پرتنشتر از همیشه می‌آید. تمام اینها باعث می شود که بیشتر غذا بخورد. استرس این بلا را سر آدم می آورد. و کچخلقی برد موجب می شود که دیگر کمتر مثل قدیمها با همسرش قدم بزند. دیگر حال و حسله گذشته را ندارد. همسرش دلش برای آن لحظه های دو نفریشان تنگ می شود و کنارگیری برادر را به خودش می گیرد. با کم شدن فعالیت های مشترک با همسرش و استشمام نکردن هوای تازه و انجام ندادن ورزش، اندورفین هم در بدنش آزاد نمی شود. همان هورمونی که باعث می شود آدم احساس سرزندگی و شروع و نشاط کند. از آنجایی که دیگر مثل قبل خوشحال نیست، شروع به ایراد گرفتن از خودش و دیگران می و دیگر از همسرش تعریف نمی کند. به مرور که هیکلش در نظرش چاق و شلوول میآید، اعتماد به نفسش و حس جذاب بودنش کمتر می شود و دیگر مثل قبل ماگل به رابطه با همسرش نیست. برد متوجه نیست که فقدان انرژی و عدم ابراز محبت به همسرش چطور روی زندگی زناشوییش تأثیر گذاشته است. فقط میداند که حال و حوصله قبل را ندارد. او خودش را بیشتر در برنامه‌های آخر شب تلویزیون غرق می‌کند. شون تفریحی بی درد سر و حواظ پرد کنست. همسر براد که کنارگیری او از خودش را حس می کند، شروع به گل و شکایت می کند. احساس کمبود آتفیش باعث می شود خودش را به براد نزدیک تر کند. اما وقتی که با سردی او مواجه می شود، برای محافظت از خودش به لحاظ عاطفی از براد کنار گیری می کند. او احساس تنهایی و بی کسی می کند. حالا دیگر همه انرژیاش انرژیش را صرف کارش می کند. و برای ارزای نیازش به همراه و همصحبت ساعتهای بیشتری را با دوستان همجنس خود می‌گذراند. مردها هم کم کم با او بیشتر گرم می گیرند و همین باعث می شود دوباره احساس خاستنی بودن بکند. البته او هرگز به برد خیانت نمی کند ولی برد احساس می که یک جای کار میلنگد. متاسفانه او به جای اینکه ببیند انتخابها و رفتارهای بد خودش ریشه مشکلاتش هستند تخصیر را گردن همسرش میاندازد. یکی از اولین مواردی که در علم روانشناسی با آن مواجه میشویم همین مسئله است اینکه فرد به جای نگاه کردن به درون خودش و انجام دادن کار لازم برای رفع اشتباههایش طرف مقابل را مقصر میکند. مثلا در مورد برد او نمیداند که باید به خودش و کارهایش نگاه کند. در برنامه های آشپزی یا سریال جنایی محبوبش، نکاتی در مورد رشد فردی یا توصیه در مورد بهبود رابطه با همسر بیان نمی شود. ولی اگر او همان کتاب های رشد فردی را خوانده بود که دوستش اسکات می ممکن بود راه را برای تغییر عادت های یاد بگیرد. متاسفانه، انتخاب های کوچک روزانگ برد موجی را خلق کرد که در همه جنبه آورد. در مورد اسکات هم ما قضیه عکس این است. تمام آن مطالعه ها و کنترل کالری های مصرفی سلامتی تن و شادی روان را برایش به ارمغان آورده است و او حالا پاداش های مثبت خود را درو می کند. در کتاب برتری خفیف جف اولسون یک دست پرورده دیگر جیمران این روند را تکرار کارهای ساده معمولی توصیف می کند. با زمان و ثبات قدم کافی نتیجه مثبت نمایان می شود. از این بهتر، این نتایج کاملا پیشبینی پذیرند. اثر مرکب پیشبینی پذیر و قابل گیری است. این خبری عالی است. آیا واقعاً آرامش بخش نیست که بدانی فقط کافی است مجموعه‌ای از قدمهای کوچک را به طور پیوسته در گذر زمان برداری تا زندگیت را زیر و رو کنی؟ این کار سادهتر است یا اینکه همه قدرتت را در خود جمع کنی تا کارهای شجاعانه و قهرمانانه انجام دهی؟ و تازه نتیجه هم فقط خسته کردن خودت و اجبار به جمع کردن دوباره تمام آن انرژی تلف شده برای شروع تلاش دیگری باشد. تلاشی که احتمالاً باز هم ناموفق خواهد بود. من حتی از فکر کردن به آن هم خسته و دلزده میشوم ولی این کاری است که آدم ها مدام انجام می دهند. جامعه طوری ما را شرطی کرده است که فقط به اثر بخشی تلاش های خارقلاده و قهرمانانه باور داریم. زیبایی اثر مرکب سادگیش است. در ابتدا نتایج ناملموس و نادیدنی هستند ولی بعدا تفاوت عظیمی با هم پیدا می کنند. رفتارها در تمام طول مسیر دقیقا یکسانند، ولی جادوی اثر مرکب در نهایت به کار می و تفاوتهای عظیم در نتایج نهایی به بار می آورد. موفقیت مکتبی قدیمی مشکل ترین جنبه اثر مرکب این است که باید تا مدتی بی و موثر به کار و تلاشمان ادامه دهیم تا بعد کم کم شروع به دیدن نتیجه کنیم پدربزرگ ها و مادربزرگ های ما این را میدانستند. آنها شبهایشان را به چسبیدن به تلویزیون و تماشای تبلیغات در مورد این نمیگذراندند که چطور در عرض سی روز اندامی متناسب پیدا کنند یا در عرض شش ماه قلم روی از املاک و مستقلات برای خود بسازند. شرط می پدر بزرگ و مادر بزرگ تو تمام عمرشان شش روز در هفته از کله سهر تا غروب آفتاب کار می‌کردند و پیوسته مهارتهایی را که در جوانیشان یاد گرفته بودند به کار می‌بستند. آنها میدانستند که راز موفق شدن سخت کوشی، و عادتهای درست است. جالب است که ثروت خاندانها معمولاً بعد از یک یا دو نسل از بین می روید. دلیلش این است که فراوانی زیاد از حد اغلب به نوعی بی و بی در فرزندان افراد ثروتمند منجر می شود و آن هم به نوبه خود سبک زندگی کم را به دنبال دارد. نسل بعدی برخلاف نسل اول برای خلق این ثروت و حفظ آن زحمتی نکشیدند و منطقی است که ارزش آن را درست درک نکنند یا بلد نباشند چطور حفظش کنند. این ذهنیت استحقاقی را اغلب در فرزندان خانواده های سلطنتی، ستارگان سینما و مدیران شرکت میبینیم و تا حد کمتری در همه بچه ها و بزرگسالان. سالان. ملت ما ارزش کار و تلاش را از یاد بردند. ما دو یا سه نسل از امریکایی را داشته که رفاه، ثروت و راحتی عظیم را تجربه کردند. به همین دلیل، نگاه جامعه ما به آنچه که واقعاً برای ایجاد موفقیت ماندگار لازم است، یعنی به چیزهایی از قبیل داشتن دل و جرأت انجام دادن کار سخت و صبور بودن، چندان واقعی نیست. بنابراین، این فاکتور عمدتا به فراموشی سپرده شدند. ما دیگر برای زحمت‌ها و جانکندن‌های نیاکانمان احترامی قائل نیستیم تلاش عظیمی که آنها در کارشان می‌گذاشتند اهمیت داشتن نظم و انضباط را ملکه ذهنشان می‌کرد شخصیتشان را شکل می‌داد و روحیه‌ی رویارویی با افقهای جدید را در آنها می‌پروراند حقیقت این است که حس منفی از خود خودرازی بودن به تمام امپراتوری‌های بزرگ ضربه زده است از جمله مصری‌ها یونانی‌ها رومی‌ها اسپانیایی ها، پرتغالی و انگلیسی ها. چرا؟ چون هیچ چیز مثل موفقیت شکست نمی‌خورد. امپراتوری هایی که زمانی دنیا را زیر چکمه های خود داشتند به همین دلیل فرو پاشیدند. معمولاً معمولا آدمها وقتی به سطح چشمگیری از موفقیت میرسند زیادی خیالشان راحت می شود. وقتی که دوره‌های طولانی از رفاه و رونق و سلامتی و ثروت را تجربه میکنیم، به خود مغرور می شویم و از کارهایی که برای رسیدن به آنها انجام میدادیم دست بر می داریم. ما مثل قرباقهی در آب در حال جوش آمدن می شویم که برای آزادیش از آب بیرون نمیپرد. چون گرم شدن آب چنان نر نرمک و موزیانه است که قورباغه متوجه نمی شود دارد میپزد. اگر می خواهیم موفق شویم باید اخلاق کاری اجدادمان را از نو زنده کنیم. وقتش است که شخصیتمان را از نوع احیا کنیم و به اصل خود برگردیم اگر نه برای نجات مملکتمان حداقل برای موفقیت و پیشرفت بیشتر خودمان به امید قول چراغ جادو نباش، می توانی روی کاناپت لم بدهی و منتظر جذب چک های پول به صندوق پستیت بمانی. می توانی کریستال های بلوری را به هم بمالی می توانی روی آتش راه بروی می توانی متوسل به عرفانی با قدمت دو هزار سال شوی؟ یا وردهای جادوی بخوانی ولی بدان که قسمت اعظم اینها صداگری گمراه کننده است که با متوسل شدن به نقاط زعفت تو را فریب میدهد. موفقیت واقعی و ماندگار نیازمند کار کردن است، و البته کار زیاد. بگذار برای توضیح این مفهوم که هیچ چیز مثل موفقیت شکست نمیخورد، داستان واقعی کوتاهی برای تعریف کنم. رستوران درجه یکی در نزدیکی منزلم در ساحل سندیگو افتتاح شد اوایل رستوران همیشه تمیز و مرتب بود میزبان برای خوشامدگویی به مشتریها همیشه لبخند گشادهای بر لب داشت خدمات بی نقص بود مدیر رستوران شخصا میآمد تا از این موضوع مطمئن شود و غذا محشر بود خیلی زود مشتریها برای غذا خوردن در آنجا مجبور به ایستادن در صف شدند و معمولا بیش از یک ساعت برای گرفتن میز منتظر میماندند بعد متاسفانه کم کم کارکنان رستوران و داشت که این موفقیت و رونق قطعی و همیشه گیست. میزبان قیافه مغرور به خودش گرفت. کارکنان بخش خدمات رستوران وضع ژولیده و نامرتبی پیدا کردند و کیفیت غذا هم خراب شد و یک روز خوب بود و روز دیگر بد. نتیجه در عرض 18 ماه رستوران ورشکست شد. آنها به دلیل موفقیتشان شکست خوردند. یا بهتر است بگویم به دلیل انجام ندادن کاری که موجب موفقیتشان شده بود موفقیتشان باعث شد که واقعیت موجود را درست نبینند و از تلاش و کار سخت دست بکشند. طرز فکر ماکروویوی. درک اثر مركب تو را از شر انتظار کسب نتایج آنی خلاص می کند. یعنی این باور که موفقیت باید به سرعت فستفودی باشد که ده دقیقه ای آماده می شود، مطالعه ای که یک ساعته ساخته می شود و اکسی که سی دقیقه ای چاپ می شود. یعنی باور به پست پیشتاز، تخم مرخای ماکرو آب جوش دو دقیقه ای، و ارسال و دریافت چند ثانیه یه پیامک بس از دیگر این طرز فکر را کنار بگذار به خودت قول بده که همین الان و برای همیشه طرز فکرت را در رابطه با رسیدن به نتاگ جهانی مثل آنچه برای برندگان لاتاری اتفاق می افتد رها کنی و واقعیت زندگی را ببینی و واقعیت این است که تو فقط داستان آن یک برنده را می شنوی نه میلیون ها بازنده را آن یارویی که می‌بینی جلوی دستگاه باخت‌آزمایی بالا و پایین میپرد یا به دلیل برنده شدن در شرطبندی مسابقات اسب از شادی در پوست خود نمی‌گنجد صد بار هم باخته است ولی تو از آن صد بار خبر نداری اگر با استفاده از ریاضی احتمال برنده شدن و کسب نتیجه مثبت را محاسبه کنیم عدد خیلی خیلی کوچکی به دست می‌آید که به صفر گرد می‌شود و نشان این است که احتمال برنده شدن تو در حد صفر است روانشناس دانشگاه هاروارد دنیل گیلبرت نویسنده کتاب شیرجه در خوشبختی میگوید اگر به هر کدام از بازندگان لاتاری سی ثانیه در تلویزیون وقت بدهیم تا در عوض گفتن من بردم، بگوید من باختم، تقریبا نه سال برای نشان دادن کل بازندگان یک قرعه کشی وقت لازم است. وقتی بفهمی اثر مرکب چطور عمل می کند، دیگر دلت برای راه حل فوری یا قطعی پر نمیزند سعی نکن خود را به باور این مسئله گول بزنی که یک قهرمان المپیک هزاران ساعت تمرین استخوان خورد کن منظم را پشت سر نگذاشته است. نه خیر جانم. چون این ورزشکاری صبح زود برای تمرین کردن بیدار شده و ساعتها بعد از اینکه دیگران دست کشیدند به تمرین خود ادامه داده است. او سخترین عذابها را کشیده. بارها با احساس ناامیدی، سرخوردگی و تنهایی روبرو شده. و تا میتوانسته جان کنده تا در نهایت قهرمان شمارهیه که دنیا شود. دوست دارم به پایان این کتاب که میرسی یا حتی زودتر از آن با تمام وجود فهمیده باشی که تنها راه رسیدن تو به موفقیت از یک سلسله کارهای روزمره معمولی غیر جذاب، بیروح و گاهی سخت میگذرد. کارهایی که در گذر زمان مرکب میشوند. این را هم بدان که وقتی اثر مرکب را در خدمت خود بگیری، به نتایج مورد نظرت، زندگی دل خواهد و سبک زندگی رویاییت میرسی. اگر اصول بیان شده در این کتاب را استفاده کنی، پایانی خوش و افثانهی برای خود رقم خواهی زد. اثر مرکب همیشه عمل میکند. میتوانی انتخاب کنی که به نفع تو عمل کند یا میتوانی نادیدهش بگیری و تأثیرهای منفی این اصل قدرتمند را تجربه کنی. مهم نیست که کجا استاده ای؟ از همین امروز میتوانی تصمیم بگیری که تغییرهای کوچک مثبتی در زندگیت بدهی و بگذاری اثر مراکب تو را به جایی که میخواهی ببرد. منظورم را خوب رساندم، حالا پیشنهاد میکنم که در فصل بعد با من همراه شوی. قرار است مشخصاً به چیزی بپردازیم که زندگی تو را کنترل میکند. هر پیروزی یا شکست، موفقیت یا باخت تو با آن شروع میشود. هر چیزی که اکنون در زندگیت داری یا نداری به دلیل همین عامل است. اگر یاد بگیری که آن را تغییر دهی، می توانی زندگیت را هم تغییر بدهی. بیا ببینیم که چیست. اثر مرکب را به نفع خودت بکار بگیر خلاصه ی گام های عملی چند تا از هایی را که ممکن است برای توجیه به آنها متوسل شوی بنویس. برای مثال، به قدر کافی باهوش نبودن، تجربه نداشتن، تربیت غلط، نداشتن تحصیلات کافی و غیره. تصمیم بگیر که این کمبودها را با کار سخت و تلاش برای رشد فردی جبران کنی تا از همه از جمله خود قدیمیت جلو بزنی. اسکات باش. چند قدم کوچک به ظاهر کم اهمیت را که می توانی هر روز برداری بنویس قدم هایی که می توانند زندگیت را به مسیر جدید و مثبتی بکشانند نباش. اقدام های کوچک به ظاهر کم اهمیتی را که می توانی انجام دادنشان را متوقف کنی بنویس همان اقدام هایی که می نتایج منفی تو را تشدید کنند لیستی از چند حوزه، مهارت یا دستاورد را که در گذشته در آنها بسیار موفق بوده ای تیگه کن ببین آیا موفقیت آنها را مسلم فرض کرده ای و دیگر تلاشی برای بهتر شدن نمی کنی؟ اگر اینطور است، به دلیل این قرور و از خود رازی بودنت به زودی شکست خواهی خورد فصل دو انتخاب ها همه ما یکسان به این دنیا می بهرهنه، برهنه، زده و ناآگاه بعد از آن ورود با شکوه، زندگی که نصیب ما می شود صرفاً حاصل جمع انتخاب است که می کنیم انتخاب های ما می توانند بهترین دوست یا بدترین دشمن ما باشند می توانند ما را به هدف هایمان برسانند یا به فرسنگ دورتر از جایی که می‌خواستیم برسیم، بکشانند. به این فکر کن. در زندگیت هر چیزی به این دلیل وجود دارد که تو ابتدا انتخابی در مورد چیزی کرده ای. انتخاب تمام دستاورت تو هستند. هر انتخابی رفتاری را آغاز می کند که در گذر زمان تبدیل به عادت می شود. اگر انتخاب ضعیف بکنی، ممکن است مجبور شوی دوباره از سر خط شروع کنی، آن هم با انتخاب جدید و اغلب سخت تر. اگر هم هیچ انتخاب نکنی یعنی انتخاب کرد ای که دریافت کننده هر آنچه باشی که سر راحت قرار می گیرد. تو انتخابهایی را می کنی که به خیال خودت بر آنها کنترل داری ولی در اصل انتخاب هستند که سرنوشت تو را در دست دارند. هر تصمیمی هر چقدر هم کوچک و بیاهمیت، می تواند مسیر زندگی تو را تغییر دهد رفتن یا نرفتن به دانشگاه کسی که با او ازدواج می‌کنی خوردن آخرین نوشیدنی قبل از رانندگی همراه شدن با دیگران موقع غیبت از کسی یا ساکت ماندن گرفتن تماس دیگری با مشتری یا بیخیال شدن و گفتن یا نگفتن دوستت دارم خلاصه هر انتخابی تأثیری روی اثر مرکب زندگی تو دارد این فصل درباره آگاه شدن از انتخابهایت و دست زدن به است که در خدمت شکوفایی زندگیت هستند. به نظر پیچیده میآید ولی مطمئن باش از سادگیش شگفت زده خواهی شد. بعد از آن دیگر 99 درصد از انتخابهایت ناخداگاه نخواهد بود و دیگر قسمت اعظم روالهای معمول زندگیت و عادتهایت ناشی از واکنشی غیر ارادی به برنامه ریزیت به نظر نخواهد رسید. تو از خودت خواهی پرسید و قادر خواهی بود جواب بدهی که چه تعداد از رفتارهایم را آگاهانه انتخاب کردم؟ چه کاری را انجام می دهم که آگاهانه نمی خواهم انجام دهم ولی هر روز ادامهش می دهم؟ با بکارگیری همان استراتژیهای های آگاهی بخشی که من برای پیشرفت زندگی شخصی و حرفیم از آنها استفاده کردم و تقویت آنها با اثر مرکب میتوانی توانی های اصرا را باز کنی که زندگیت را در چنگال خود گرفتند و تو را به مسیر نادرست کشندند. می میتوانی قبل از افتادن به ورطه حماقت جلوی خودت را بگیری. می توانی به آسانی تصمیمهایت را بگیری. تصمیمهایی که منجر به رفتارها و عادتهایی میشوند که تو را همیشه و هر زمان پشتیبانی میکنند. بزرگترین مشکل تو این نیست که آگاهانه انتخابهای بد کرده ای. از غذا، حل این مسئله کار راحتی است. بزرگترین مشکل تو این است که در میان انتخابهایت خوابگردی کرده ای. منظورم از خوابگردی چیست؟ اینکه نیمی از اوقات حتی نمی‌دانی که داری انتخاب می‌کنی. انتخاب‌های ما اغلب دست پرورده فرهنگمان و نوع تربیتمان هستند. می‌توانند چنان در رفتارها و عادتهای معمولمان تنیده شده باشند که خارج از کنترل ما به نظر بیایند. برای مثال، تا حالا شده سرت به کار خودت گرم بوده و در حال لذت بردن از زندگیت بوده ای که ناگهان با یک یا چند انتخاب کوچک احمقانه، همه ی تلاش ها، و شتاب زندگیت را برباد داده باشی، آن هم بی هیچ دلیل روشنی. تو قصد نداشتی زندگیت را خراب کنی، ولی با فکر نکردن به تصمیمهایت، با سبک و سنگین نکردن خطرها و عواقب بلغوهشان خود را در مقابل نتایج ناخواسته هیچ کس خودش آمدانه نمیخواهد چاق شود و شود یا طلاق بگیرد ولی اغلب اگر نگویم همیشه این عواقب نتیجه مجموعه از انتخاب های کوچک نادرست هستند فیل‌ها کسیران نمیگزند تا حالا فیلی تو گزیده است پشه چطور واقعیت این است که در زندگی این چیزهای کوچک هستند که تو را نیش میزنند البته هر از چندی اشتباههای بزرگی را هم میبینیم که در چشم برهم زدنی حرفه یا اعتبار کسی را نابود می کنند مثلا کمدین مشهوری که در یکی از استندابهای های معمول خود با شور و حرارت حرفهای تبعیض نژادی میزند یا فردی معروف به صلح دوستی که رفتار عجیب و غریب جنگ ای از خودش بروز می دهد. یا سناتور مخالف حقوق اقلیت‌های جنسی که در دستشویی مچش را هنگام رابطهی نامتعارف می گیرند. یا تنیس باز زن محبوبی که خیلی غیرمنتظره مقامی رسمی را با نطقی آتشین تهدید می کند و به باد انتقاد می گیرد. شکی نیست که این نوع انتخاب های بد عواقب منفی بزرگی به دنبال دارند. خود تو هم ممکن است در گذشته مشابه چنین اشتباه های بزرگی را مرتکب شده باشی. ولی موضوع بحث ما این قدمهای بزرگ روبه عقب یا لحظه های اتفاقی نیست ما از قدم های کوچک حرف میزنیم اکثر ما باید نگران انتخاب های مکرر، کوچک و به ظاهر کم اهمیت خود باشیم دارم از تصمیم های حرف میزنم که فکر نمی اصلاً اصلا تفاوتی در زندگیت ایجاد کنند. ولی از غذا همین چیزهای کوچک هستند که به طور اجتناب ناپذیر و قابل پیش پیشبینی زندگیت را برباد می دهند. این تصمیمهای به کم اهمیت، خواه تمهیدهای احمقانه باشند، خواه رفتارهای پایه و اساس و خواه اشتباهاتی در لباس انتخابهای مثبت می توانند تو را کاملا از مسیر موفقیت منحرف کنند. چون حواست به آنها نیست. این مورد آخر مخصوصا خیلی موزیانه کارش را پیش میبرد. تو قرق در دنیایت هستی، بیخبر و قافل از اقدامهای کوچکی که تو را از مسیر اصلیت دور می کنند. یادت می آید گفتم اثر مرکب همیشه عمل می کند؟ بله همیشه عمل می کند، ولی در اینجا دارد علیه تو عمل می کند، چون تو داری خوابگردی می کنی و نمی دور و برد چه خبر است. برای مثال تو قوطی نوشابه ای سر میکشی و ظرفی پر از چیپس را تند تند میخوری و ناگهان درست بعد از خوردن آخرین خلال سیب زمینی یادت میآید که یک روز کامل تغذیه سالم را بر باد داده دادی و تازه حتی گرسنه هم نبوده ای. یا مثلا غرق در تماشای تلویزیون میشوی و دو ساعتت را بابت تماشای سریال های آبکی تلویزیون از دست می دهی. اصلا سریال های آبکی را فراموش کن یا برایت قدری کلاس بگذاریم و به جای آن سریال‌های آبکی فرض کنیم که غرق در تماشای مستندی آموزشی میشوی و تازه بعد از تماشای آن یادت می‌آید که قرار بوده روی پروسگ معرفی محصولت برای تور کردن مشتری با ارزشی کار کنی یا برای مثال بی هیچ دلیل قانع قانع‌کننده‌ای خود به خود دروغی به یکی از عزیزانت می‌گویی در حالی که گفتن حقیقت هیچ مشکلی پیش نمی‌آورد واقعا قضیه چیست قضیه این است که تو به خودت مجال داده ای که انتخابی بکنی، بیان که قبلش به آن انتخاب فکر کنی، و تا زمانی که نا آگاهانه انتخاب می کنی، نمی توانی آگاهانه انتخاب کنی که آن رفتار بی سمر را عوض کنی و آن را به عادتی سمر بخش و سازنده تبدیل کنی. وقتش است که بیدار شوی و انتخابهای قدرت بخش بکنی. هر روز سال روز شکر گذاری است. خیلی راحت می شود انگوشت را به سوی دیگران نشانه رفت. مگر نه، من به خاطر رئیس عوضیم در کارم پیشرفت رفت نمی کنم. اگر به خاطر آن همکاری نبود که از پشت به من خنجر زد، آن ترفی را گرفته بودم. من همیشه حالم خراب است، چون بچه هایم دیوانه می کنند. مخصوصاً وقتی پای رابطه های عاشقانه ایمان به میان بیاید، مثل آب خوردن طرف مقابل را متهم می کنیم. از نظر ما طرف مقابل آن کسی است که باید تغییر کند. چند سال قبل یکی از دوستانم داشت پیش من از زنش می نالید. البته از نگاه من همسرش بانوی ای بود و به نظرم شانس به او رو کرده بود که چنین این زنی نصیبش شده بود. همین حرف را به خود او هم زدم ولی او همچنان معتقد بود که همسرش باعث و بانی بدبختی های اوست. بلاخره تسمیم تصمیم گرفتم تجربهای را با او در میان بگذارم که به معنای واقعی کلمه زندگی زناشویی خودم را تغییر داده بود. یک ایده شکرگزاری تصمیم گرفتم برای همسرم دفتر سپاسی درست کنم. یک سال تمام هر روز حداقل یک ویژگی یا رفتار تحسین برانگیزش را در این دفتر ثبت کردم. مثلا شیوهی که با دوستانش تعامل می کرد. نحوه مراقبتش از حیوانات خانگی‌مان توجهش به مرتب بودن خانه. غذاهای های خوشمزه که فوراً آماده میکرد یا مدلی که به موهایش میداد. خلاصه هر چیزی من به دنبال کارهایی بودم که همسرم با انجام دادنشان مرا تحت تأثیر قرار میداد یا به دنبال ویژگی ها،, ها، یا سفت هایی او بودم که از نظر من قابل ستایش بودند. یک سال تمام مخفیانه همه آنها را یادداشت داشت کردم. در پایان سال کل آن دفتر پر شد. اید شکرگزاری بعدی وقتی آن دفتر را به همسرم دادم از خوشحالی گریه کرد و آن را بهترین حدیه ای خواند که در عمرش گرفته بود. حتی بهتر از آن اتومبیل BMWیی که به مناسبت تولدش به او داده بودم. جالب اینکه آن کسی که بیشتر از همه تحت تاثیر این هدیه قرار گرفت خودم بودم. تمام آن یادداشت کردن های روزانه مرا مجبور کرد که روی جنبه های مثبت همسرم تمرکز کنم. من آگاهانه، به دنبال تمام چیزهایی بودم که او داشت درست انجام میداد این تمرکز صادقانه تمام چیزهایی را که در حالت عادی ممکن بود در موردشان شک کنم در نظرم محف کرد من یک بار دیگر با تمام وجود عاشق همسرم شدم و شاید حتی بیشتر از قبل چون حالا به جای دیدن ویژگیهای بارزترش زرافتهایی را که در سرشت و رفتارش بود میدیدم حقشناسیم، سپاس گذاریم و از من به یافتن ویژگی عالی در وجود او آن چیزی بود که هر روز در قلبم و در چشمانم قرار می‌دادم. این کار موجب شد که خودم هم در زندگی متفاوت رفتار کنم و همین متعاقبن باعث شد واکنش های همسرم هم متفاوت شود. خیلی زود چیزهای به مراتب بیشتری برای نوشتن در دفتر سپاس خود داشتم. در نتیجه اختصاص روزانه فقط پنج دقیقه یا کمی بیشتر برای ثبت تمام دلایلی که به خاطرش از همسرم سپاسگزار بودم، یکی از بهترین سال‌های زندگی مشترکمان را تجربه کردیم و رابطهمان از آن زمان تا حالا بهتر هم شده است. بعد از اینکه تجربه ام را با دوستم در میان گذاشتم، او هم تصمیم گرفت که دفتر سپاسی برای همسرش درست کند. در همان چند ماه اول زندگی مشترکش کاملاً متحول شد. انتخاب آگاهانه او به جستجوی ویژگی مثبت همسرش و تمرکز روی آنها دیدگاهش را نسبت به همسرش تغییر داد و به دنبالش نحوه تعاملش با او را. نتیجه آن شد که همسرش هم در نحوه واکنش به او انتخاب های متفاوتی در پیش گرفت. این چرخه ادامه یافت. یا شاید بهتر است بگوییم. مرکب شد. پذیرفتن تمام کمال مسئولیت همه ما زنان و مردان خودساختهی هستیم ولی افتخارش فقط به پای آدمهای موفق نوشته می شود من 18 سالم بود که با سمیناری با مفهوم مسئولیت پذیری فردی آشنا شدم و این مفهوم کاملا زندگی مرا عوض کرد اگر بقیه ایده های این کتاب را دور بریزی و فقط همین یک مفهوم را درست به کار ببندی دو سه سال نشده زندگیت چنان تغییر می کند که دوستان و خانوادت به سختی توی قدیمیت را به یاد خواهند آورد. در آن سمیناری که در هجده سالگی در آن شرکت کردم، سخنران پرسید برای اینکه رابطه ی ای درست پیش برود، مسئولیت هر کدام از طرفها چقدر است. من جوانی خام بودم و به خیال خودم در عشق و عاشقی علامه دهر. برای همین ناگهان و بدون هیچ فکری گفتم، پنجاه. پنجاه. از نظر من جواب مثل روز روشن بود. هر دو طرف باید حاضر باشند به میزان مساوی مسئولیت را به عهده بگیرند وگر نه یکی این وسط به قول معروف دوشیده می شود. یکی دیگر فریاد زد پنجاه و یک چهل و نه و اینطور استدلال کرد که تو باید حاضر باشی کاری بیشتر از طرف مقابلت انجام دهی. مگر نه اینکه رابطه عاشقانه بر شارودگی از خودگذشتگی و بخشش استوار است. دیگری بلند گفت: هشتاد بیست. سخنران سمت سپایه چرخید و روی برگ کاغذی با حروف سیاه بزرگ نوشت صد درصد. او گفت تو باید حاضر باشی صد درصد بدهی. بدون صف درصد انتظار دریافت چیزی در ازایش. فقط وقتی که حاضر باشی صد درصد مسئولیت رابطه عاشقانت را به این رابطه جواب می دهد. در غیر این صورت رابطه ای که به امید شانس و احتمال گذاشته شود همیشه در معرض خطر است. عجب، اصلا انتظارش را نداشتم، ولی فورا فهمیدم که چطور این مفهوم میتواند تک تک حوزه های زندگیم را دگرگون کند، اگر همیشه صد درصد مسئولیت هر چیزی را که تجربه میکردم بر می گرفتم، یعنی مسئولیت کامل تمام انتخاب ها و رفتارها و واک هایم را، در این صورت صاحب قدرت میشدم، همه چیز بستگی به خودم داشت، من مسئول همه کارهایی بودم که انجام میدادم یا انجام نمیدادم. دادم. همینطور هم مسئول این که چطور به آنچه بر سرم می واکنش نشان بدهم. میدانم که فکر می کنی مسئولیت زندگیت را بر عهده داری. از هرکس که به پرسی می گوید البته که من مسئولیت زندگیم را بر عهده دارم. ولی وقتی به رفتار و کردار خیلی از آدم ها نگاه می کنی تنها چیزی که می بینی این هاست. متهم کردن دیگران. قربانی دانستن خود، سرزنش کردن دیگران و انتظار اینکه دولت یا فردی دیگر مشکلات را حل کند. اگر تا حالا شده که ترافیک را برای تأخیرت مقصر بدانی یا به این نتیجه رسیده ای که به دلیل رفتار فرزندت همسرت یا همکارت دل و دماغ نداری تو هم یکی از میلیون نفری هستی که صد درصد مسئولیت فردی خود را بر عهده نمیگیرند. میگویی دیر رسیدی چون مغازه شلوغ بود، شاید نباید تا دقیقه نوود صبر می کردی. هم به پروسه معرفی محصولت به مشتری گند زد؟ شاید باید قبل از شروع کار خودت از نو همه چیز را بررسی می با نوجوان جوان سرکش خود کنار نمیایی؟ بی کتاب و کلاس مفید هست که به تو کمک می بفهمی چطور با او رفتار کنی. تو خودت به تنهایی مسئول آنچه انجام می یا انجام نمی هستی همینطور هم مسئول این که چطور به آنچه بر سرت می آید واکنش دهی. این ذهنیت قدرت بخش زندگی مرازی رو رو کرد من فهمیدم که شانس، شرایط و موقعیت مناسب مهم نیستند مهم من و نگاه من است من تعیین می کردم که آیا این عوامل مهم هستند یا نه من آزاد بودم تا هر کاری را که می خواستم انجام دهم مهم نبود که چه کسی رئیس جمهور می شود چقدر اقتصاد خراب است. یا دیگران چه میگویند چه میکنند یا چه نمیکنند من هنوز هم صد در صد در کنترل خودم بودم با انتخاب اینکه خودم را رسما از احساس قربانی بودن در گذشته حال یا آینده رها کنم به موفقیت و ثروت ای دست یافتم من قدرت نامحدودی برای کنترل سرنوشت خودم پیدا کردم خوش شانسی شاید معتقدی که از اساس آدم بد شانسی هستی ولی این هم فقط یک بهانه دیگر است و بس انتخاب هایی که در طول زندگی می‌کنی تنها عامل هایی هستند که می توانند باعث شوند ثروتمندی افسانه‌ای، آدمی خوشحال و خوشبخت و فردی سالم و تندرست باشی یا اینکه ورشکسته، افسرده یا ناخوش باشی هیچ عامل دیگری دخیل نیست قضیه شانس هم این است همه ما خوششانس هستیم. اگر زنده هستی، تن سالم داری، کمی غذا در یخچال آشپزخانه هست، پس فوقلاد خوششانسی. همه فرصت خوششانس بودن را دارند. چون سوای داشتن سلامتی و توانایی امرار معاش، شانس صرفاً حاصل مجموعی از انتخاب هاست. وقتی از ریچارد برانسون سوال کردم آیا فکر می کند شانس نقشی در موفقیتش داشته یا نه؟ جواب داد، معلوم است که داشته. گیه ما خوششانس هستیم. اگر تو در جامعه آزادی زندگی می کنی خوش هستی. شانس همیشه و همه جا هست. مدام خوش اقبالی هایی به ما رو میکن چه متوجهشان بشویم و چه نشویم؟ من در زندگیم خوششانستر یا بدشانستر تر از دیگران نبودم. فقط فرقم با بقیه این بوده که وقتی شانس سر را هم قرار گرفته از آن به نفع خودم استفاده کردم. واقعا که دور و گوهر از دهانش می ریزد. حال که داریم از شانس حرف میزنیم، باید بگویم این گفته قدیمی که شانس حاصل تلاقی فرصت با آمادگی است، به نظرم کامل نیست. به باور من، شانس دو بخش حیاتی دیگر هم دارد. فرمول کامل خوش آمادگی یعنی رشد فردی به اضافه نگرش یعنی باور یا ذهنیت به اضافه فرصت یعنی چیز خوبی که سر راحت قرار میگیرد. به اضافه اقدام، یعنی انجام دادن کاری در موردش، مساوی است با شانس. آمادگی با بهتر کردن و آماده کردن مداوم خودت، یعنی تقویت هایت، دانشت، تخصصت، رابطه هایت و منابعت، امکانات لازم را خواهی داشت تا از فرصتهایی که سر راحت قرار می گیرند، یعنی همان وقتی که شانس به تو رو می کند، بهره بگیری. آن وقت می توانی مثل آرنولد پالمر باشی که در فوریه 2009 در مصاحبهاش با مجله موفقیت گفت: جالب است. هرچه بیشتر تمرین می کردم خوششانس تر می شدم. نگرش. این همان جایی است که شانس از اکثر مردم می و همان جایی است که سر ریچارد برانسون بر وجود شانس در کل پیرامون ما تاکید می کند. مسئله صرفاً به سادگی دیدن موقعیت ها، گفتگوها و شرایط به عنوان اموری اتفاقی است که باید به دنبالشان باشی. تو نمیتوانی آنچه را ببینی که به دنبالش نمیگردی و نمیتوانی به دنبال چیزی بگردی که به آن اعتقاد نداری. فرصت امکان پذیر است که شانس خودت را با برنامه خلق کنی. ولی شانسی که در اینجا دارم در موردش حرف میزنم، شانس ریزی نشده است. یا شانسی که سریتر یا متفاوتتر از آنچه انتظارش می رفته، اتفاق افتاده است این بخش از فرمول شانس در اختیار تو نیست. یک رخداد است و اغلب هم ظاهرن به میل خودش آشکار می شود اقدام اینجاست که تو به میدان می به هر طریقی که این شانس به تو داده شده از جانب کائنات، خدا، قضا و قدر یا هر چیز و هر کسی که به آن اعتقاد داری حالا دیگر وظیفه توست که بر اساس آن دست به عمل بزنی. این همان چیزی است که ریچارد برانسون ها را از جوزف والینگتون ها متمایز می کند. جوزف کی؟ دقیقاً. تو هرگز اسم این آدم را ای، چون موفق نشده بر پایه تمام اتفاقهای خوشیمنی که برایش رخ دادهاند دست به عمل بزند. پس دیگر ناله و شکوه از اوضاع و احوال فعلیت شکست های بزرگی که متحمل شده ای یا هر وضعیت نامطلوب دیگری بس است. خیلی از آدمها موقعیتی نامساعدتر و مشکلاتی بزرگتر از تو دارند و با این حال ثروتمندتر و موفقتر از تو هستند. شانس به همه به یک اندازه فرصت می دهد. شانس محبتش را به همه ارزانی می کند. پس به جای اینکه زیر سقف بروی صورتت را به سوی آسمان برگردان. وقتی نازل می شود همه اش برای توست عزیزم. راه دیگری هم برای خوششانسی وجود ندارد. شهریه بالای دزسه یا دانشگاه زربه های سخت حدود یک دهه قبل از من خواسته شد که در کسب و کار نوپایی شریک شوم من مقدار قابل توجهی پول در آن کار گذاشتم و به مدت تقریبا دو سال به طور خسته‌گی ناپذیر رویش کار کردم تا اینکه دست آخر فهمیدم شریکم کار را بد مدیریت کرده و تمام سرمایه‌مان را بر باد داده است در این ماجرا بیش از سی, سد و سی هزار دلار از دست دادم البته از او شکایت نکردم راستش بعدها ها برای یک مورد شخصی حتا پول بیشتری به او قرض دادم. واقعیت این بود که آن ضرر تقصیر خودم بود. من موافقت کرده بودم که با او شریک شوم، بیان که تحقیق لازم و کافی در مورد پیشینش و شخصیت فردیش بکنم. در طول دوران همکاری من آنچه را که باید بررسی می کردم نکردم. و توجیهم هم این بود که به او اعتماد دارم. در واقع گناه هم تنبال کاریم بود، چون جدیتر مراقب امور مالی نبودم. من نه تنها انتخاب کرده بودم که این رابطه تجاری و کسب و کار را شروع کنم، بلکه در مورد نادیده گرفتن اختارها و علائم هشدار دهنده آشکار، انتخاب های بسیار دیگری هم کرده بودم. از آنجایی که انتخاب کرده بودم مسئولیت آن کسب و کار را به طور کامل به عهده نگیرم، دست آخر خودم مسئول همه نتایجش شدم. وقتی که بالاخره متوجه اشتباهات و عملکرد نادرستم شدم، آگاهانه انتخاب کردم که زمان بیشتری را برای جنگیدن با آن هدر ندهم در عوض در پی التیام زخم‌هایم بر درسم را آموختم و به راه هم ادامه دادم حالا که به آن روزها فکر می‌کنم می‌بینم امروز هم اگر بود باز انتخاب میکردم که دوباره بلند شوم و راه هم را در مسیر جدیدی ادامه دهم اکنون از تو می‌خواهم که همین کار را انجام دهی مهم نیست که چه اتفاقی برایت افتاده است مسئولیت کامل آن را بر عهده بگیر. خوب یا بد پیروزی یا شکست مسئولیت آن را بپذیر. استادم جیمران می گفت روزی که مسئولیت کامل زندگیت را بر عهده بگیری روزی است که از بچگی به بزرگسالی سالی فارغ و تحصیل میشوی. امروز روز فارغ و تحصیلی است. از امروز به بعد انتخاب کن که صد درصد مسئول زندگی خودت باشی تمام عضر و آن را دور بریز. این واقعیت را بپذیر که تا وقتی خودت را در قبال انتخابهایت مسئول بدانی، آن انتخابها هیچ قید و بندی برتون تو اکنون وقتش است انتخاب کنی که کنترل زندگیت را در دست بگیری. دفترچه کوچکی که سلاح سری توست اکنون می خواهم یکی از عالی ترین را به تو معرفی کنم که سالهاست در رشد شخصیم از آن استفاده می کنم. این استراتژی به من کمک می کنترل انتخاب‌های را که در طول روز می کنم به دست بگیرم همچنین موجب می شود هر چیز سر جای خودش قرار بگیرد و منجر به رفتار و اقدام هایی که عادتهای مرا همچون پادوهایی وظیفه شناس و وفادار به صف می کنند. درست در همین لحظه، حوزه ی از زندگیت را که بیشتر از همه می خواهی در آن موفق شوی انتخاب کن. پول بیشتری در حساب بانکیت می خواهی؟ کمری باریکتر؟ زور و بازوی بیشتر برای شرکت در مسابقه مردان آهنی؟ رابطهای بهتر با همسرت یا فرزندانت؟ در ذهنت مجسم کن که در این حوزه از حوزه زندگیت در حال حاضر کجا استاده ای؟ حالا جایی را که میخواهی باشی در ذهنت تصور کن. پولدارتر، لاغرتر، شادتر و خوشبختتر. خلاصه هرچه دلت بخواهد. اولین قدم به سوی تغییر آگاه بودن است. اگر می خواهی از جایی که هستی به جایی که میخواهی برسی باید با آگاه شدن از انتخابهایی شروع کنی که تو را از مقصد مورد نظرت دور میکنند. در مورد تک تک انتخاب که امروز می کاملاً کاملا آگاه باش تا بتوانی در ادامه مسیرت انتخاب های بکنی. برای آگاه شدن از انتخاب هایت، رد تک تک اقدام را بگیری که مرتبطند با حوضه از زندگیت که می‌خواهی بهترش کنی. اگر تصمیم گرفته ای که دیگر به نداشته باشی، باید حساب تک تک پول خورت را که از جیبت بیرون داشته باشی. اگر تصمیم گرفته ای وزن کم کنی باید رد هر چیزی را که در دهانت میگذاری بگیری اگر تصمیم گرفته ای برای مسابقه ای ورزشی خود را آماده کنی باید تک تک قدم هایی را که برمیداری تک تک تمرین هایی را که انجام می ثبت کنی فقط کافی است دفترچه یا داشته کوچکی با خود به همراه داشته باشی. دفترچه ای که به همراه یک قلم همیشه در جیبت یا کیفت نگهداری قرار است همه چیز را بنویسی. هر روز بدون وقفه. نه بهانه ای قابل قبول است و نه استثنایی در کار. گویی که برادر بزرگ دارد تو را تماشا می کند. گویی من و پدرم آییم و تو را مجبور می کنیم بابت هر کاری که از دست دادی 100 تا شنا بروی. بیگ برادر. برادر بزرگ یا ناظر کبیر شخصیتی از رمان 1984 نوشته جورج اورول است. این کتاب بیانیه سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت‌خواه شمرده می‌شود. جورج اورول در این کتاب جامعه‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن خصوصیاتی همچون تنفر نسبت به دشمن و سرسپردگی شدید به برادر بزرگ یا ناظر کبیر که همه چیز و همه کس را کنترل کند وجود دارد. به نظر کار زیادی نمی‌آید. می‌دانم. نوشتن چند جمله روی یک برگ کاغذ کوچک که بیشتر نیست. ولی بدان که همین کار کوچک، همین ردگیری پیش رفتنم و قدم های اشتباه یکی از دلایل موفقیت فعلی است. این فراگن تو را مجبور می کند از تصمیمهایت آگاه باشی. البته همانطور که جیمران گفته است آنچه انجام دادنش آسان است، انجام ندادنش هم آسان است. جادوی این کار در پیچیدگیش نیست. جادویش در انجام دادن مکرر و کافی کارهای است که معجزه گر اثر مرکب را به کار میاندازند. بنابراین، از چیزهای ساده ای غافل نشو که چیزهای بزرگ در زندگیت را ممکن می سازند بزرگترین تفاوت بین آدم های موفق و ناموفق این است که آدم های موفق حاضر به انجام دادن کارهایی هستند که آدم های ناموفق حاضر به انجام دادنش نیستند این نکته بسیار مهمی است که باید همیشه در خاطر داشته باشی چون در بسیاری از مواقع زمانی که در زندگیت با انتخابی سخت خسته کننده و شاق روبرو میشوی به کارت میآید پول من به شیوه سختش قدرت ردگیری و ثبت امور را آموختم. بعد از اینکه مثل احمقی تمام ایار در امور مالیام رفتار کردم. اوایل دوران بیست سالگیم وقتی که با فروش املاک و مستقلات پول زیادی در میآوردم، روزی با حسابدارم ملاقات کردم. او گفت، بیشتر از ست هزار با بابت مالیات بدهکاری. گفتم، چی؟ من که الان این مقدار پول تو دست و بالا ندارم. او پرسید، چرا نداری؟ تو که چند برابرشو در حتما مالیاتش مالیاتشو هم کنار گذاشتی؟ گفتم، ظاهرا که نذاشتم. او پرسید، پس اون همه پول کجا رفتن؟ گفتم، نمیدونم. این جواب قطعا اعترافی هوشیار کننده بود. پول مثل آب روان از دستهایم ریخته بود و من حتی متوجه این قضیه نشده بودم. بعد حسابدارم لطف بزرگی در حقم کرد. صاف توی چشمهایم نگاه کرد و گفت پسر جون باید خودتو جمع جور کنی من قبلا صد بار عین این قضیه رو دیدم مثل یه مست لایقل داری تو خرج میکنی یا حتی نمیدونی که چطور و کجا خرجشون کردی این دیوونگیه دست از این کار بردار در حال حاضر بد جور تو مخمسه افتادی باید پول بیشتری در بیاری که البته مالیات اونا هم باید به مالیاتهای قبلی اضافه کنی حواست باشه. اینطوری که تو داری مثل ریگ پول خرج میکنی، با دستای خودت گور مالی تو میکنی. من فورا منظورش را گرفتم. این کاری بود که حساب دارم مرا وادار به انجامش کرد. داشتن دفترچه یادداشت کوچکی در جیبم و نوشتن هر مقدار پولی که در عرض سی روز خرج میکردم. چه هزار دلار برای و شلوار جدیدم، چه پنجاه سنت برای پنچرگیری تایر اوتوموبیلم، همگی در آن دفترچه ثبت شدند. وای خدای من، این کار آگاهی آنی از انتخاب های ناخداگاه را برایم به ارمغان آورد، انتخاب که باعث دور ریختن پول شده بود. از آنجایی که مجبور بودم همه چیز را ثبت کنم، در مقابل خرید بعضی چیزها مقاومت می کردم، تا صرفاً مجبور نشوم آن دفترچه کوفتی را در بیاورم و در آن بنویسم. ثبت مخارجم به مدت سی روز کامل آگاهی جدیدی به من بخشید. و مجموعه کاملا جدیدی از انتخاب و روش های خرج کردن پول در من به وجود آورد. و از آنجایی که آگاهی و عادتهای های مثبتم بیشتر شده بودند، میدیدم که دیگر مثل سابق نسبت به پول منفعل نیستم. حالا داشتم پول بیشتری را برای دوران بازنشستگی کنار میگذاشتم. به علاوه با شناسایی و اجتناب از حوزه هایی که در آنها پولم را بربات میدادم پول بیشتری پسنداز میکردم. مخصوصاً وقتی که می‌خواستم برای تفریح و سرگرمی سر کیسه را شل کنم این کار را فقط بعد از مکس و بررسی طولانی انجام میدادم. این تمرین ردگیری آگاهی مرا از نحوه ارتباط با پول تغییر داد در حقیقت چنان عالی جواب داد که آن را بارها و بارها برای تغییر دیگر رفتارهایم هم استفاده کردم ردگیری شیوه رفتن من به سراغ تغییر هر چیزی است که مرا رنج می‌دهد سالهای سال است آنچرا که میخورم و مینوشم میزانی که ورزش میکنم زمانی که صرف تقویت مهارتی میکنم تعداد تماسهای فروشی که میگیرم حتی کارهایی که برای بهبود رابطم با خانوادم دوستانم و همسرم انجام میدهم ردگیری و ثبت میکنم نتایجی که از این روند به دست آوردم مثل تجربه ردگیری پولم بزرگ و دهنده بودند با خریدن این کتاب در واقع برای ایده‌ها و های من پول دادی. برای همین میخواهم به تو سخت بگیرم و اصرار کنم که حداقل یک هفته کامل رفتارهایت را ردگیری و ثبت کنی. این کتاب برای سرگرمی تو نوشته نشده است. نوشته شده تا به تو کمک کند نتیجه بگیری. برای نتیجه گرفتن هم باید کاری انجام دهی. ممکن است قبلا در مورد ردگیری و ثبت امور چیزهایی شنیده باشی. احتمالا حتی شیوه مخصوص خودت را برای انجام دادن این کار داشته ای. ولی شرط میبندم که در حال حاضر انجامش نمی دهی. درست است؟ از کجا میدانم؟ چون زندگیت به اندازه که دل خواهد نیست تو از مسیر موفقیت منحرف شده ای. ردگیری و ثبت امور راهی است برای اینکه دوباره به جاده اصلی برگردی. می دای کازیو چطور اینقدر پول در می آنها هر میزی هر برنده هر ساعتی را ردگیری می کنند میدانید چرا مربیان المپیک دست بالایی دارند؟ چون هر تمرینی هر کالری و هر ذره مواد غذایی ورزشکارانشان را ردگیری و ثبت می کنند. تمام برنده ها به نوعی ردیاب هستند اکنون از تو میخواه که تو هم با همین قصد یعنی برای قرار دادن هدفهایت در معرض دیدت زندگیت را ردگیری و ثبت کنی ردگیری و ثبت کردن کار ساده است، اما جواب می دهد. چرا؟ چون در مورد قدم هایی که برای بهبود حوزه مورد نظر زندگیت بر می داری، آگاهی لحظه به لحظه به تو می دهد. مطمئن باش از آنچه در مورد رفتارت می فهمی، شگفت زده می شوی. تو نمی توانی چیزی را کنترل کنی یا بهبود ببخشی، مگر اینکه بتوانی آن را بسنجی. به همین صورت، نمی توانی نهایت بهره را از آن کسی که هستی ببری. از استعدادها و توانمندیها و دارایی هایت مگر اینکه از اقدامهایت آگاه باشی و خود را مسئول آنها بدانی. ورزشکاران هرفهی و مربیانشان هر عملی را تا ریزترین جزئیات ردگیری و ثبت می کنند. پرتاب کننده های بیسبال از آمار پرتاب هایشان کاملا باخبرند. گلفبازها ها حتی آمار دقیقتری از ضربه هایشان دارند. ورزشکاران حرفه‌ای می‌دانند میدانند که چطور عملکردشان را بر پایی آنچه که ردگیری و ثبت کرده تنظیم کنند و تغییر دهند آنها به آنچه ثبت کرده توجه می کنند و بر اساسش تغییرهای لازم را می دهند. چون میدانند که وقتی آمارشان بهتر شود مسابقه های بیشتری را میبرند و قراردادهایی با مبالغ بالاتر میبندند میخواهم که در هر لحظهی دقیقاً دقیقا کجا هستی و چطور داری پیش می‌روی. از تو میخواهم خودت را ردگیری کنی، گویی که کالای با ارزشی هستی، چون واقعا هم با ارزشی. آن سیستم آگاهی بخشی را که قبلا در موردش حرف زدیم می خواهی. این همان است. بنابراین، صرف نظر از اینکه آیا فکر می کنی از عادتهایت آگاه هستی یا نه، باور کن آگاه نیستی. از تو میخواهم که شروع به ردگیری و ثبت امورت کنی. انجام دادن این کار زندگیت، و در نهایت شیوه گذران آن را زیر و رو خواهد کرد. آرام و آهسته پیش برو. وحشت نکن. ما با زربا هنگی آرام و آهسته شروع کنیم. به مدت یک هفته فقط یک عادتت را ردگیری و ثبت کن. عادتی را انتخاب کن که بیشترین کنترل را روی تو دارد. این همان جایی است که باید شروع کنی. به محض اینکه شروع به برداشت پاداش های اثر مرکب کنی به طور طبیعی مایل میشوی که این روند را وارد حوزه های دیگر زندگیت هم بکنی. به عبارت دیگر تو انتخاب میکنی که ردگیری را انتخاب کنی. بیا فرض کنیم مقوله‌ای که انتخاب میکنی تحت کنترل بگیری عادت غذا خوردنت است. چون قصد داری وزن کم کنی. وظیفه تو این است که هر چیزی را که در دهانت میگذاری روی کاغذ بیاوری. از استیک و سیب زمینی و سالادی که شام میخوری گرفته تا تنقلات و چیزهای ریزه که در طول روز میخوری. مثلاً مثلا آن چندتا چوب شور در موقع استراحت آن تکه دوم پنیر توی ساندویچت. آن آبنبات نقلی و آن نمونه غذا در فروشگاه زنجیره ای. راستی نوشیدنی ها را فراموش نکن مثلا آن جره اضافی بعد از پذیرایی مفصل از جانب میزباند. نوشیدنی ها هم همگی به حساب می آیند. ولی تا زمانی که ردگیری و ثبت نشوند به راحتی میتوان نادیدهشان گرفت یا فراموششان کرد چون در نظرت چندان مهم نمیآیند باز هم تاکید میکنم که صرف به روی کاغذ آوردن این موارد به نظر ساده میآید و ساده هم هست البته به شرطی که انجامش دهی برای همین است که از تو میخواهم خود را متعهد به انتخاب یک مقوله و تعیین تاریخ شروعش کنی همین الان قبل از اینکه به سراغ ادامه مطلب بروی من شروع به ردگیری و ثبت جای خالی در جای خالی خواهم کرد روز ماه سال ردگیری و ثبت کردن چگونه باید باشد؟ جامع و کامل، منظم و دائمی باید هر روز با نوشتن تاریخ در بالای صفحه جدیدی شروع به ردگیری کنی بعد از اولین هفته ردگیری چه اتفاقی میافتد؟ احتمالا شوکه خواهی شد و متحیر از اینکه چطور آن کالری ها آن پول خوردها ها و آن دقیقه ها از دستت رفتند تو حتی نمیدانستی که آنها اصلا وجود دارند چه برسد به اینکه برباد رفته باشند. حالا ادامه بده. قرار است این یک حوزه زندگیت را به مدت سه هفته ردگیری و ثبت کنی. شاید همین حالا به ناله افتاده باشی شاید دلت نمیخواهد دیگر انجامش دهی ولی به من اعتماد کن، بعد از یک هفته، چنان از نتایج حیرت زده می شوی که خودت برای دو هفته دیگر کار را تمدید می کنی. می توانم این مسئله را صد درصد تضمین کنم. چرا سه هفته؟ حتما شنیده ای که روانشناسان می گویند چیزی تبدیل به عادت نمی شود مگر اینکه آن را سه هفته مکرر انجام دهید. این حرف صد درصد علمی نیست ولی معیار است و برای من جواب داده است. پس مطلوب این است که به ردگیری بیست و یک روزه رفتارت پای بند بمانی. اگر نمانی من چیزی از دست نمی دهم. اصلا به من چه؟ چربی دورش کم من، سلامت قلب من، موجودی بانکی من یا رابطه مشکل من که نیست. به خودت مربوط است. ولی از شوخی گذشته تو داری این کتاب را میشنوی چون میخواهی زندگیت را عوض کنی. درست است؟ من هم که به تو قول دادم کار آهسته و آرام پیش برود. مگر نه؟ البته کار بی زحمتی نیست ولی ساده و انجام شده نیست پس دل سرد نشو و انجامش بده به خودت قول بده که همین امروز شروع کنی. تصمیم بگیر به مدت سه هفته دفترچه یادداشتی کوچک یا بزرگ اگر براکت اقوا کننده تر است با خود به همراه داشته باشی و تک تک موارد مربوط به مقوله انتخابیت را یادداشت داشت کنی. در طول این سه هفته چه اتفاقی میافتد؟ تو از شک حاصل از هفته اول به این شگفتی شادی بخش در انتهای هفته سوم و که چطور صرف آگاه شدن از اقدامهایت شروع به شکل دادنشان می کند. می بینی که داری از خودت می پرسی آیا واقعا آن تکه شکلات را می خواهم؟ اگر بخواهم بخورمش باید دفترچه یادداشتم را بیرون بکشم و آن را بنویسم. باعث خجالت است خب، این خودش دویست کالریست که در جا سرف جویی می شود. اگر آن تکه شکلات را هر روز رد کنی، دو هفته نشده نیم کیلو کم کرده ای. شروع به جمع بستن آن چهار دولار هایی می کنی که در مسیر کارت صرف خریدن قهوه می کنی و ناگهان متوجه میشوی که پناه بر خدا، من در عرض سه هفته شست دلار بابت قهوه دادم. وای، این یعنی هزار دلار در سال. یا مرکب شده آن در عرض بیست سال، 51,823 دلار و 79 سنت. واقعا چند دلار دیگر باید از دست بدهی تا دست از این عادت قهوه خوردنات برداری. دوباره تکرار کنم، آیا همین الان گفتم عادت قهوه 4 دلاری روزانت در ارزی 20 سال 51,823 دلار و 79 سنت برایت آب میخورد؟ بله همین را گفتم. آیا میدانستی که هر دلاری که امروز خرج میکنی مهم هم نیست که بابت چه چیزی نزدیک به پنج دلار در عرض بیست سال یا ده دلار در عرض سی سال برایت آب میخورد دلیلش این است که اگر تو یک دلار را با سود هشت درصد سرمایه گذاری کنی، در عرض بیست سال ارزش آن یک دلار تقریباً پنج دلار میشود امروز هر بار که یک دلار خرج میکنی مثل این است که پنج دلار از جیب فردایت برمیداری من قبلا به برچسب قیمت ها نگاه میکردم و به اشتباه گمان میکردم اگر جنسی 50 دلار قیمت خورده پس حتما همان 50 دلار هم برایم آب می خورد خب بله امروز ولی اگر ارزش بالقوه همان 50 دلار را بعد از یک سرمایه گذاری 20 ساله محاسبه کنی یعنی آنچه با خرج کردن آن به جای سرمایه گذاری کردنش از دست می دهی، چهار یا 5 برابر بیشتر است به عبارت دیگر، هر بار که به کالایی نگاه می کنی که 50 دلار قیمت خورده، باید بپرسی، آیا این کالا دویست و پنجاه می ارزد؟ اگر امروز در نظرت دویست و پنجاه می ارزد، پس ارزش خریدن دارد. دفعه بعد که به فروشگاه زنجیره یه بزرگی می روی که است از انواع و اقسام چیزهای شگفتانگیزی که خبر نداشتی نیازداری این موضوع یادت باشد. تو به آنجا می تا به خیال خودت به قدر 25 دلار کالاهای های مورد نیازت را بخری، ولی در عوض با اجناسی به ارزش 400 دلار بیرون می آیی. گاراج خانه من شبیه قبرستان اجناس فروشگاه بزرگ کاستکو است. دفعه بعدی که به یکی از فروشکاه های بزرگ هراجی رفتی، اجناس را از منظر ارزششان در آینده ارزیابی کن. آنگاه به احتمال فراوان آن یک پز پنجاه دلاری را سر جایش میگذاری تا در آینده دویست و پنجاه دلار بیشتر در بانک داشته باشی اگر هر روز هر هفته برای سالهای متمادی انتخاب درست بکنی خیلی زود میبینی که چطور میتوانی ثروتمند شوی وقتی که کارهایت را با این آگاهی ردگیری و ثبت کنی خواهی دید که در زندگی بسیار متفاوت از انتظارت ظاهر می‌شوی قادر خواهی بود از خودت بپرسی آیا عادت روزانه خوردن قهوه سر کار به قیمت نهایی مرسدس بنز میارزد چون این قیمتی است که آن فنجانهای قهوه واقعا برایت آب میخورند حتی بهتر از آن دیگر خوابگردی نمیکنی تو آگاه و هوشیار هستی و انتخابهای بهتری می کنی. همگی هم حاصل یک دفترچه یادداشت کوچک و یک قلم حقیقتا حیرت انگیز است نه دهرمانان گمنام و ناپیدا همین که شروع به ردگیری و ثبت وقایع زندگیت کردی، توجهت روی کوچکترین چیزهای متمرکز خواهد شد، که داری درست انجام می دهی همینطور روی کوچکترین چیزهایی که درست انجامشان نمی دهی و وقتی انتخاب می کنی که به طور پیوسته حتی کوچکترین اصلاحات را در مسیرت انجام دهی در گذر زمان کم کم نتایج ای ظاهر می شوند البته انتظار کف و سوت نداشته باش وقتی که می گویم اصلاحات کوچک دارم از تغییرهای حقیقتا ناپیدا حرف میزنم به احتمال فراوان، هیچ کس به این زودی ها متوجه این تغییر ها نمی شود. هیچ کف و سوتی در کار نخواهد بود. کسی قرار نیست به خاطر تلاش یاد کارت تبریک یا جام قهرمانی برایت بفرستد. ولی در نهایت، اثر مرکب آن تلاش ها منجر به پاداشی استثنایی خواهد شد. اقدام های کوچک هستند که در گذر زمان جواب می دهند. یعنی همان تلاش ها و آماده سازی های کوچک و قدم به قدم، براگ رسیدن به موفقیت های بزرگ. آن هم درست وقتی که هیچ کس حواسش به آن تلاش ها و اقدام ها نبوده است. در مسابقات است دوانی اسب برنده ممکن است با اختلاف یک وجب از اسب دوم از خط پایان رد شود. ولی جایزه نقدی ده برابری را از آن خود می کند. آیا آن اسب ده برابر سریعتر است؟ نه، فقط کمی بهتر از بقیه است. در واقع دویدن های اضافی دور پیست، نظم و دقت فوقالعاده در تغذیه اسب و تمرین های اضافی حرفه حرفهای موجب آن نتایج کمی بهتر با پاداشهای مرکب شده است فرق بین گلفباز رتبه اول و گلفباز رتبه دهم ده بعد از شرکت در صدها مسابقه و زدن هزاران ضربه به طور متوسط فقط یک و نه ضربه است ولی تفاوت در جایزه پنج برابر است بیش از ده میلیون دلار در برابر دو میلیون دلار گولفباز رتبه اول پنج برابر بهتر نیست، حتی پنجاه درصد یا حتی ده درصد هم بهتر نیست. در حقیقت اختلاف بین میانگین امتیازات او فقط دو هفته دهمه درصد بهتر است. با این حال، نتایجش جش پنج برابر بیشترند. این است قدرت چیزهای کوچکی که کم کم جمع می شوند. این چیزهای بزرگ نیستند که دست آخر تاثیر چشمگیر می گذارند. بلکه صدها. هزارها یا میلیونها عامل کوچک هستند که عادی را از خارق العاده جدا می‌کنند. برای اینکه یک ضربه بهتر از بقیه باشی، نیاز به انجام کارهای کوچک بیشماری داری که اصلا به چشم نمی‌آیند. بگذار چند مثال دیگر از ردگیری و ثبت تغییرات کوچکی که می‌توانند منجر به نتایج بزرگی شوند، برایت بزنم. قدم زدن. زمانی به مدیرعامل شرکت نسبتاً بزرگی که بیش از صد میلیون دلار در سال فروش داشت مشاوره می‌دادم. فیل کارافرین و مؤسس آن شرکت بود. شرکتش رونق خوبی داشت، ولی من نوعی فقدان تعهد، اعتماد و اشتیاق را در فرهنگ سازمانی او می‌دیدم. البته چندان هم عجیب نبود. چون آنطور که من فهمیدم، بیش از پنج سال بود فیل پایش را در قسمتهای مختلف شرکت خودش نگذاشته بود. و هرگز شخصاً با بیش از هشتاد درصد کارکنانش رو در رو صحبت نکرده بود. او عملاً با تیم مدیریتیش در حبابی زندگی میکرد. من از فیل خواستم که فقط یک تغییر را دنبال کند. سه بار در هفته از دفتر کارش قدم بیرون بگذارد و در شرکتش بچرخد. هدف این بود که حداقل سه نفر از کارمندانش را پیدا کند که از نظر او داشتند کارشان را درست انجام میدادند یا دیگران از خوبی های آنها تعریف می کردند و بعد شخصا از آنها قدردانی کند. این تک تغییر کوچک در رفتارش کمتر از یک ساعت از وقتش را در هفته گرفت ولی در گذر زمان تأثیرهای بزرگی گذاشت. کارکنان مورد تقدیر فیل شروع به تلاش بیشتر و کار سختتر تر کردند. تا تحسین بیشتر او را از آن خود کنند کم کم سایر کارکنان هم عملکردشان بهتر شد چون میدیدند که تلاش بیشتر دیده می شود و مورد تقدیر قرار می گیرد موجی ناشی از نگرش جدیدشان به تعامل هایشان با مشتریها هم سرایت کرد و باعث شد که مشتریها از کار با شرکت احساس رضایت بیشتری بکنند و طبیعتاً معاملات مجدد و ارجاعات هم افزایش پیدا کرد همه اینها موجب دوچندان شدن غرور کارکنان شد آن تغییر کوچک در یک دوره 18 ماهه فرهنگ شرکت را 180 درجه تغییر داد در طول آن دوره سود خالص به بیش از سی درصد رسید بیان که کارمند جدید استخدام شود یا سرمایهگذاری اضافی در بازار صورت بگیرد همه این نتایج مثبت به دلیل این بود که فیل خود را متعهد به برداشتن مداوم یک قدم کوچک به ظاهر کم اهمیت در گذر زمان کرد. درخت پول دوازده سال قبل، دستیار یار به نام کاتلین داشتم. در آن زمان سالانه چهل هزار دلار حقوق می‌گرفت. در یکی از سخنرانی هایم در مورد کارآفرینی و خلق ثروت، از او خواستم که بیرون سالن سخنرانی میز پذیرش را اداره کند. هفته بعد به دفترم آمد و گفت: شنیدم که داشتید در مورد پسنداز کردن ده درصد از هر چیزی که به دست می‌آوریم حرف می‌زدید. ایده جالبی به نظر می‌آید، ولی محال است که من بتوانم این کار را انجام دهم. کاملاً با واقعیت زندگی من در تضاد دست. و بعد از تمام صورت حسابها و تعهدات مالیش برایم گفت. وقتی که همه آنها را روی کاغذ آورد، معلوم شد که آخر ماه واقعا پولی برایش باقی نمی ماند. او گفت، اگر بخواهم توصیه شما را عملی کنم، باید حقوقم را زیاد کنید. من به او گفتم، کار بهتری می کنم. یادت می دهم چطوری پول دار شوید. کاتلین انتظار شنیدن این جواب را نداشت ولی دست آخر موافقت کرد. من به کاتلین یاد دادم که چطور رد خرج کردنش را بگیرد و مخارجش را ثبت کند. او هم فوراً دفترچه‌ای یادداشتی برای این کار فراهم کرد. از او خواستم که حساب پس جداگانه ای با تنها سی 33 دلار باز کند. یعنی فقط یک درصد از درآمد ماهانه فعلیش. بعد به او نشان دادم که ماه بعد چطور با سی 33 دلار کمتر زندگی کند فقط کافی بود یک بار در هفته نهار خود را از خانه بیاورد به جای اینکه از بوفه محله کارش ساندویچ چیپس و نوشیدنی سفارش بدهد ماه بعد او را واداشتم فقط دو درصد یعنی هفت دلار پس انداز بکند او آن 32 دلار اضافی را با تغییر دادن سرویس اشتراک تلویزیون کابلیش ذخیره کرد ماه بعد سه درصدش کردیم برای این کار اشتراک مجله پیپل او را لغو کردیم. اکنون وقتش بود که کاتلین زندگی خودش را مطالعه کند. در ضمن به جای دوبار در هفته رفتن به استارباکس از او خواستم که دانه های قهوه و سایر مخلفاتش را بخرد و قهوهش را در دفتر کار خودش درست کند. او کم کم از قهوه دستساز بیشتر خوشش آمد. من هم همینطور. در پایان آن سال، کاتلین داشت ده درصد از هر دلاری که در میآورد پس انداز می کرد بدون اینکه تأثیر محسوسی روی شیوک زندگیش بگذارد. او شگفت زده شده بود. آن تک اقدام اثری موجی روی خیلی از حوزه های دیگر زندگیش هم داشت. او پولی را که معمولاً خرج تفریحات و سرگرمی های بیهوده می شد محاسبه کرد و بعد در عوض آن را روی رشد و پیشرفت فردیش سرمایه گذاری کرد. بعد از تغذیه ذهنش با چند صد ساعت مطالب الهام بخش و آموزشی، خلاقیتش کم کم شکوفا شد. او چندین ایده در مورد کسب درآمد بیشتر و صرف جویی در منابع شرکت به من ارائه کرد. برای مثال، امتیاز طراحی را که در اوقات فراغتش روی آن کار کرده بود به من پیشنهاد کرد، به شرطی که به او قول میدادم در صورت اثبات سوددهی هایش ده درصد از کل حزینه های کاهش یافته و پانزده درصد از کل درامت های تازه را به او بدهم در پایان سال دوم، علاوه بر آن پایه حقوق چهل هزار دلاریش بیش از صد هزار دلار در سال در آورد. کاتلین دست آخر کسب و کار خودش را راه انداخت که حسابی هم رونق گرفت دو سال قبل اتفاقی در فرودگاهی او را دیدم معلوم شد که او اکنون سالانه بیش از پنجاه هزار دلار در میآورد و با گذاری و پسنداز بیش از یک میلیون دلار دارایی جمع کرده. او حالا یک میلیونر است. و فقط و فقط هم به خاطر انتخاب برداشتن یک قدم کوچک و پسنداز کردن سی دلار در ماه. زمان اصل موضوع است چه زودتر شروع به ایجاد تغییرهای کوچک کنی اثر مرکب با قدرت بیشتری به نفع تو عمل می کند فرض کن دوستت به توصیه دیو رمزی گوش داده است و وقتی که بعد از فارغ و تحصیلی از دانشگاه در 23 سالگی اولین شغلش را به دست آورده شروع به پسنداز 250 دلار در ماه در یک حساب بیمه بازنشستگی کرده است از سوی دیگر تو تا چهل سالگی شروع به پسانداز نمی کنی یا شاید هم کمی زودتر شروع به پسانداز کنی ولی چون بهره چندانی در این کار نمی بینی، حساب بازنشستگیت را خالی می کنی زمانی که دوستت چهل ساله بشود هرگز لازم نیست یک دلار دیگر پسنداز کند و در سن 67 سالگی بیش از یک میلیون دلار دارد که با بهره مرکب 8 درصدی بیشتر می شود. تو از چهل سالگی تا شست و هفت سالگی که سن معمول بازنشستگی تامین اجتماعی است، هر ماه دویست و پنجاه دلار سرمایه گذاری می کنی. منایش این است که به مدت بیست و هفت سال در مقابل هفده سال او پسنداز می کنی. وقتی که بازنشسته می شوی، کمتر از سیصد هزار دلار داری. در حالی که بیست و هفت هزار دلار بیشتر از دوستت سرمایه گذاری ای. هرچند که تو سالهای خیلی بیشتری پس انداز کرده ای و پول نقد به مراتب بیشتری سرمایه گذاری کرده ای، اما دست آخر کمتر از یک سوم پولی که میتوانستی داشته باشی نصیبت می شود. وقتی که تعلل می کنیم و رفتارها، آدتها و انجام کارهای ضروری را نادیده می گیریم، لاجرم به این سرنوشت دوچار می شویم. این، برای شروع کارهای کوچکی که تو را در مسیر رسیدن به هدفهایت پیش میبرند یک روز هم تعلل نکن. شاید فکر کنی که این حرفها از تو گذشته و برای این جور کارها دیگر خیلی دیر شده. اصلاً اینطور نیست. این فقط یک ضبط صوت ذهنی است که مدام افکار منفی و ناامید کننده را در سرت تکرار می کند. وقتش است که برای همیشه خاموشش کنی. هرگز برای درو کردن مزایای اثر مرکب دیر نیست. فرض کن که همیشه دلت میخواسته پیانو بزنی، ولی احساس میکنی خیلی دیر شده است، چون به زودی 40 ساله میشوی. اما اگر از همین حالا شروع کنی، تا زمان بازنشستگیت میتوانی استاد شوی، چون بیست و پنج سال پیانو زده ای. کلید کار این است که همین حالا شروع کنی. هر اقدام بزرگی، هر ماجراجوی خار با قدم های کوچک شروع می شود. قدم اول همیشه سخت تر از آنچه واقعا هست به نظر می‌آید. حالا فرض کنیم که 25 سال برای تو واقعا زمان خیلی طولانی باشد فرض کنیم که فرصت یا قدرت تحمل تو در حد ده سال است آن وقت چه؟ برویانت ریسی در کتاب کانون تمرکز روشی را برای بهتر کردن هر حوزه از زندگی تا هزار درصد معرفی کرده است نه ده درصد یا حتی صد درصد بلکه هزار درصد بگذار خلاصه آن را برایت بگویم تنها کاری که باید بکنی این است که خودت، عمل کردت، بازدهت و درآمدت را هر روز کاری یک دهم ده درصد بهتر کنی حتی میتوانی تعطیلات آخر هفته را هم به حساب نیاوری همین، فقط یک هزارم فکر میکنی از احدهش برمیایی؟ صد درصد از عهده همه برمیآید. ساده است. اگر هر روز کاریت این روند را دنبال کنی، هر هفته نیم درصد بهتر می شوی. و هر ماه دو درصد که مرکب می شود و به 26 درصد در هر سال می رسد. با این روش، درآمد تو هر دو و نه دهم ده سال دو برابر می شود. با فرارسیدن سال دهم، ده می توانی هزار درصد آن اکنون انجام می دهی و درآمد داری به دست آوری. حیرت انگیز نیست؟ لازم نیست که یک مرتبه تلاشت را هزار درصد بیشتر کنی یا زمان کاریات را هزار درصد افزایش دهی. فقط روزی یک دهم ده درصد یا یک هزارم بهتر شد. همین. موفقیت دوی نیمه ماراتون است بیورلی فروشنده یک شرکت نرمافزارهای آموزشی بود که من برای ایجاد تغییر اساسی و بهتر شدن اوضاعش به او مشاوره می دادم. روزی در مورد دوستش گفت که قرار بود آخر هفته بعد در یک مسابقه دوی نیمه ماراتون شرکت کند بورلی که اضافه وزن زیادی داشت با اطمینان گفت من یکی که محال است بتوانم همچین کاری بکنم یک ردیف پله بالا نرفته نفسم می گیرد. به او گفتم، اگر بخواهی می توانی انتخاب کنی کاری را انجام دهی که دوستت انجام می دهد. او با تردید گفت، محال است بتوانم بدوم. قدم اول من این بود که به بورلی کمک کنم انگیزش را بیابد. ببینم بورلی، اصلا چرا میخوای اون نیمه ماراتون شرکت کنی؟ راستش تابستون سال آینده قرار من و دوستایی دوران دبیرستانم بعد از 20 سال همدیگه رو ببینیم. دلم میخواد تو نظر همه فوق بیام. ولی از پنج سال پیش که بچه که دوممو به دنیا آوردم کلی اضافه وزن پیدا کردم. نمیدونم چطور میتونم این کارو انجام بدم. عالی شد: حالا یک هدف انگیز بخش داشتیم. ولی باید با احتیاط پیش میرفتم. اگر تا حالا سعی کرده باشی وزن کم کنی احتمالا روندش را میدانی. سبتنام نام در یک باشگاه ورزشی گران قیمت خرج پول هنگفتی بابت مربیهای خصوصی خریدن تجهیزات ورزشی جدید گامکن درست و حسابی و کفش ورزشی مناسب تو به مدت یک هفته یا بیشتر با شدت و اشتیاق تمام ورزش می ولی بعد دستگاه ورزشیت را به رختا تبدیل می باشگاه را ول می و کفش های ورزشیت را هم گوشه میاندازی تا خاک بخورند من میخواستم راه بهتری را در مورد بورلی امتحان کنم. میدانستم که اگر وادارش میکردم فقط یک عادت جدید را انتخاب کند روی قلتک می افتاد و بعد از آن دیگر بقیه رفتارها به طور طبیعی به دنبالش میآد. من از بورلی خواستم که با اتومبیلش در اطراف محلش دوری بزند و یک مسیر دایره یک مایلی یا یک کیم در خیابان‌های اطراف آنجا پیدا کند. بعد به او گفتم که در دو هفته آینده سه بار این مسیر را پیاده طی کند دقت کن که از او نخواستم با دویدن شروع کند در عوض کار ساده و راحتی از او خواستم که به تلاش زیادی نیاز نداشت بعد از آن وادارش کردم که هفته سه بار آن مسیر را پیاده طی کند و این کار را به مدت دو هفته دیگر انجام دهد او هر روز انتخاب می کرد که ادامه دهد بعد به بورلی گفتم که آهسته شروع به دویدن کند البته فقط تا جایی که می کشید به مح اینکه نفسش به شماره میافتاد باید میستاد و بقیه راه را قدم میزد من از او خواستم که به این کارش ادامه دهد تا زمانی که توانست یک چهارم، سپس یک دوم و بعد سه چهارم آن یک مایل را بدود سه هفته و نه دور تمرین طول کشید تا بالاخره توانست کل یک مایل را آهسته بدود. بعد از هفت هفته کامل تمام آن مسیر را می دوید احتمالا برای چون این موفقیت کوچکی زمانی طولانی به نظر می رسد، مگر نه؟ از هر چیز گذشته، نیم یک دوی ماراتون، سیزده و یک دهم مایل است. و خب، یک مایل در برابرش چیزی نیست. با این حال، آنچه چیزی بود، این بود که بورلی داشت کم کم می‌دید که چطور انتخابش در مورد خوشی کل شدن برای مراسم تجدید دیدار، آنچه نیروی چرایش میخوانم و به زودی توضیحش خواهم داد. سوخت های سالمه جدید او شده بود. حالا دیگر اثر مرکب به جریان افتاده بود و داشت فراگند معجزه آسای خود را آغاز می کرد. سپس از بورلی خواستم که در هر دور تمرین مسیرش را به یک هشتم یک مایل افزایش دهد. افزایشی تقریبا نامحسوس. شاید فقط سیصد قدم بیشتر. در عرض شش ماه داشت نه مایل می دوید. آن هم بدون هیچ زحمت و تقلایی و نه ماه نشده به طور مرتب سیزده نیم مایل یعنی بیشتر از مسیر دوگه نیم ماراتون میدوید. ولی از این محیجتر آنچه بود که در سایر حوزه های زندگیش رخ داد. بیورلی میلش به خوردن شکلات یک وسوسه تمام عمری و غذاهای سنگین و چرب را از دست داد. آن هم به طور کامل. انجام ورزش های قلبی و و انتخاب عادت های غذایی بهتر موجب افزایش انرژیش شد و به او کمک کرد با شور و شوق بیشتری سر کارش حاضر شود در همان دوره عملکرد فروشش دو برابر شد که البته برای من هم عالی بود همونطور که در فصل قبل هم دیدیم اثرات موجی این همه تحرک منجر به افزایش اعتماد به نفس او شد و همین امر او را نسبت به همسرش با محبتتر تر کرد رابطهشان حتی پرشورتر از دوران نامزدیشان شد از آنجایی که انرژیش مضاعف شده و روحیه تازهی گرفته بود، تعاملش با فرزندانش هم فعالتر و شادمانه تر شد. او می دید که دیگر وقتی برای گشتن با دوستانی ندارد که بعد از کار دور هم جمع می شدند تا پیش غذاهای چرب و چیلی و نوشیدنی بخورند. حالا در انجامن دو میدانی عضو شده و دوستان سالم جدیدی پیدا کرده بود. این امر به نوبه خود، منجر به انتخاب رفتارها و عادت مثبت خیلی بیشتری در او شده بود. به دنبال آن گفتگوی اول در دفتر کارم و تصمیم بورلی به پیدا کردن نیروی چرایش و همچنین تعهدش به برداشتن مجموعی از قدم های کوچک بیش از 18 کیلو کم کرد و تبدیل به بیل تبلیغاتی متحرکی برای زنهایی شد که در تلاش برای یافتن اعتماد به نفس و اندامی متناسب بودند. امروز بورلی ماراتون های کامل را میدود. زندگی تو محصول انتخاب های لحظه به لحظه توست. جیلیان مایکلز مربی بدنسازی مشهور در سیدی موفقیت می 2010 خود داستان الهام بخشی از دوران کودکیش را برایم تعریف کرد. وقتی بچه بودم مادرم بازی پیدا کردن تخم مرغ های رنگی عید پاک بر برام ترتیب میداد. من دور خونه میدویدم و وقتی که به تخم مرغ مخفی شده نزدیک می شدم مادرم می گفت وای گرمت شده و وقتی خیلی نزدیکش می شدم می گفت، وای داری میسوزی. سوزی وقتی هم که از تخم مرغ دور می شدم می گفت وای سردته داری یخ میزنی من هم به شرکت کننده ها تو مسابقه یاد میدم لحظه به لحظه به خوشبختیشون و به هدف نهاییشون فکر کنن به اینکه چطور هر انتخابی و هر تصمیمی که در لحظه می گیرن اونا رو به هدف نهاییشو نزدیکتر یا دورتر میکنه از آنجایی که دستاورتای تو حاصل انتخابهای لحظه به لحظه هستند با تغییر دادن آن انتخابها قدرتی باور نکردنی برای تغییر دادن زندگیت پیدا میکنی انتخابهایت قدم به قدم و روز به روز اقدامهای تو را شکل خواهند داد تا زمانی که تبدیل به عادت شوند آدتهایی که تمرین و تکرار آنها را مندگار و همیشگی باختن یک عادت هست همینطور هم بردن بیا روی ایجاد دائمی عادت بردن در زندگیت کار کنیم عادت های مخرب را حذف کن و عادت های مثبت مورد نیازت را در خودت ایجاد کن آنگاه می توانی زندگیت را به هر مسیری که آرزوگش را داری هدایت کنی و به نهایت آنچه در تصورت هست دست یابی بگذار نشانت دهم چگونه؟ اثر مرکب را به نفع خودت به کار بگیر. خلاصه گام های عملی با چه حوزه چه شخصی یا چه وضعیتی در زندگیت بیشتر از همه مشکل داری. شروع به یادداشت داشت کردن تمام جنبه های آن موقعیتی کن که بابتش سپاس گذاری. حساب هر چیزی را نگهدار دار که حقشناسی تو را در آن حوزه تقویت کرده و گسترش می دهد. هر چیزی که حس قدردانی تو نسبت به آن موقعیت را تقویت می کند و افزایش میدهد ثبت کن کجای زندگیت صد درصد مسئولیت موفقیت یا شکست وضع کنونیت را بر عهده نمیگیری سه کاری را بنویس که در گذشته انجام داده ای و به اوضاع گند زدند سه کار را لیست کن که باید انجام میدادی ولی ندادی سه اتفاق را روی کاغذ بیاور که برایت رخ دادند ولی تو به آنها بد واکنش نشان داده ای. سه کار را بنویس که می توانی همین الان شروع به انجام دادنشان کنی و با انجامشان مسئولیت نتایج زندگیت را دوباره به عهده بگیری. شروع به ردگیری و سبت حداقل یک رفتار در حوزه ای از زندگیت کن که می خواهی در آن تغییر بدهی و بهترش کنی. برای مثال، درآمد، تغذیه، تناسب اندام، قدردانی از دیگران، تربیت فرزند و غیره. فصل 3. عادت‌ها. معلم ای داشت به همراه شاگرد نوجوانش در جنگلی قدم میزد. بعد از مدتی جلو نهال درختی ایستاد او به نهال جوان که به تازگی رویده بود اشاره کرد و به شاگردش دستور داد که آن را بیرون بکش نوجوان به راحتی با انگشتانش آن را از زمین بیرون کشید معلم گفت حالا آن یکی را در بیاور و به نهال بزرگتری اشاره کرد که تقریبا تا زانوهای پسرک می رسید. با کمی تلاش پسرک نهال را یکجا از ریشه درآورد بعد معلم به درخچه که همیشه بهاری اشاره کرد که همقدر شاگردش بود و گفت و حالا این یکی. پسرک با زور و تلاش زیاد و با کمک چند قلوه سنگ و تکه چوب برای اهرم کردن زیر ریشه های آن درخچه بالاخره موفق شد آن را هم از ریشه درآورد. معلم فرزانه گفت حالا میخواهم این یکی را بیرون بکشی. پسرک نگاه معلم را دنبال کرد و چشمش به بلوط تنومندی افتاد که چنان بلند بود که پسرک به سختی نوکش را می دید. او که دیده بود همین چند لحظه پیش برای درختی به مراتب کوچکتر از این چقدر عرق ریخته خیلی راحت به معلمش گفت ببخشید ولی این یکی دیگر از من بر نمی آید.» معلم با هیجان گفت پسرم تو همین الان قدرتی را که عادتها بر زندگیت دارند نشان دادی. هرچه عادتها قدیمی تر باشند بزرگتر می شوند ریشه هاگشان و ریشه کن کردنشان سختر بعضی چنان بزرگ و چنان ریشه دار که ممکن است اصلاً حاضر به امتحان کردنش هم نشوید مخلوقات عادت تو نوشته است ما همانی هستیم که مکرر انجام می دهیم فرهنگ لغت مریام وبستر واجه عادت را این گونه تعریف می کند رفتاری اکتصابی که تقریبا یا کاملا غیر ارادی شده است نقل است که مردی سوار بر اسب داشت چار میتاخت می تاخت. به نظر می رسید دارد به سمت مقصد خیلی مهمی می رود. مردی از کنار جاده فریاد زد. کجا می روی؟ سوارکار جواب داد. نمیدانم، از اسب بپرس. این داستان زندگی اکثر آدم هاست. آنها سوار بر اسب عادتهایشان می تازند. بیان که اصلا بدانند دارند به کجا می روند. وقتش رسیده که انان اسب عادتهایت را به دست بگیری و زندگیت را در مسیری پیش ببری که واقعا می خواهی. اگر با هدایتگر خودکار زندگی کرده ای و مجال داده ای که عادتهایت تو را برانند، میخواهم که دلیلش را بفهمی و میخواهم که خود را از این مخمه نجات بدهی. به هر حال تو هم مثل خیلی از آدم های دیگر هستی. مطالعات روانشناختی نشان دادهاند 95 درصد از آنچه که احساس می کنیم، فکر میکنیم انجام می دهیم یا به دست میآوریم نتیجه عادتی اقتصاابی است که آن را یاد گرفته البته ما با غرای زمان به دنیا آمده ایم و موقع تولد خبری از هیچ عادتی نبوده است، ولی در گذر زمان عادتهایمان را در خودمان پرورش داده ایم. ما از کودکی یک سری پاسخهای شرطی شده یاد گرفته که منجر به اکسل عمل غیر ارادی ما به اکثر موقعیتها میشوند. البته گذران زندگی روزمرت به طور خودکار و غیر ارادی خوبی های مسلم خودش را دارد. چون اگر مجبور بودی در مورد هر قدمی از هر کار معمولی، مثلا درست کردن صبحانه، رساندن بچه ها با اتومبیل به مدرسه، رفتن به سر کار و غیره، مدام فکر کنی، زندگیت به تدریج متوقف می شد. احتمالا دندانهایت را به طور خودکار روزی دوبار بار می زنی. هیچ مجادله فلسفی بزرگی هم در کار نیست. صرفا انجامش می دهی. تا توی اتومبیل اوتوموبیل نشینی، کمربند نشینی، را میبندی. هیچ بازندیشی و تأملی هم در کار نیست. عادت و روال های معمول ما موجب می شوند کمترین انرژی آگاهانه را برای کارهای روزمرهمان استفاده کنیم. آنها کمکمان می کنند عاقل بمانیم و ما را قادر می سازند اکثر موقعیت ها را در چارچوب عقل و منطق به خوبی پیش ببریم. و از آنجایی که لازم نیست به کارهای پیش پا افتاده و معمولی فکر کنیم میتوانیم انرژی ذهنیمان را روی افکار غنیتر، خلاقانهتر تر و مفید تر متمرکز کنیم. عادت ها می توانند مفید باشند به شرطی که عادت های خوبی باشند به همین سادگی. اگر تغذیه درست و سالمی داری احتمالاً به دلیل عادت های سالمی است که در مورد مواد غذایی که می خری و آنچه در رستوران سفارش می دهی در خود پرورش دادی. اگر اندام خوبی داری احتمالاً به دلیل این است که مرتب ورزش می میکنی. اگر فروشنده موفقی هستی، احتمالاً به دلیل این است که های مربوط به آمادهسازی ذهنی و تلقین مثبت، امیدوار و خوشبین نگهت داشتند و باعث شدند که به راحتی جواب نعه مشتری را نپذیری. من با آدمهای بسیار موفق، های سرشناس و سوپرستارهای بزرگی ملاقات و کار کردم و می توانم با اطمینان بگویم همگی یک ویژگی مشترک دارند. داشتن عادتهای خوب منظورم این نیست که عادتهای بد ندارند، دارند، ولی تعدادشان زیاد نیست. رویه های که بر شالوده عادتهای خوب بنا شده اند، همان مرز تمایزی هستند که موفقترین افراد را از بقیه مردم جدا می کند. به نظرت منطقی نمیآید تا اینجا حتما فهمیده ای که آدمهای موفق لزوماً باهوشتر یا با استعدادتر از بقیه نیستند. بلکه عادتهایشان آنها را به مسیری کشانده است که آگاهتر، باسوادتر، تواناتر، ماهرتر و آماده تر از دیگران بشوند. وقتی بچه بودم، پدرم برای آموزش در مورد عادتها لری برد را برایم مثال میزد لری استوره را یکی از بزرگترین بسکتبالیست‌های تاریخ می‌دانند، ولی دلیل شهرتش استعداد ورزشی خارقلادهش نبود. هیچ کس لری را در زمین بسکتبال استثنایی توصیف نمی کرد. با این حال، علا رغم استعداد ورزشی محدودش، تیم بستون سلتیکس را سه بار به مقام قهرمانی رساند و یکی از بهترین بازیکنان در تاریخ ورزش بسکتبال باقی ماند. چطور به چنین موفقیتی رسید؟ عادتهای لری این افتخارات را برایش رقم زدند. تعهد بیوقفهش به تمرین و بهتر کردن بازیش. برد یکی از بهترین پرتاب کنندگان زربی آزاد در تاریخ NBA بود. در دوران کودکی عادتش این بود که هر روز صبح قبل از رفتن به مدرسه 500 پرتاب آزاد تمرین کند. لری با چنین انزبات و پشتکاری، اکثر استعدادهای خدا داده خود را آفرید. و پوزه برخی از با استعدادترین بازیکنان را در زمین مسابقه به خاک مالید. تو هم مثل لری میتوانی می توانی واکنش های ناخداگاه و غیر ارادی خود را شرطی کنی تا مثل واکنش های قهرمانان هرفهی شوند. این فصل در مورد جبران کردن چیزهایی است که ذاتن در آنها استعداد نداری. آن هم از طریق انضباط کار سخت و عادتهای خوب. این فصل درباره تبدیل شدن به مخلوقی از های قهرمان پرور است. با تمرین و تکرار کافی، هر رفتاری خوب یا بد در گذر زمان غیر ارادی می شود. معنایش این است که می توانیم آگاهانه تصمیم به تغییر عادت هایمان بگیریم هرچند که اکثر آنها را ناخودآگاه از طریق سرمشق قرار دادن والدینمان واکنش به پیوندهای محیطی و فرهنگیمان یا خلق مکانیسم های تقلیدی کسب کرده ایم. تو تک تک عادت را یاد گرفته ای بنابر این قطعاً می توانی آن آدتهایی را که در خدمتت نیستند، از ذهنت بزودایی و فراموششان کنی. برای این کار آماده ای؟ بیا شروع کنیم. با رهایی از دامه کردن آنی خاسته شروع کن. ما می دانیم که با شیرینی خوردن لاغر نمی شویم. می دانیم که صرف سه ساعت از شب به تماشای برنامه های سرگرم کننده و سریال های پلیسی سه ساعت از وقت خواندن یک کتاب خوب یا گوش دادن به یک فایل صوتی مفید را از ما می گیرد. ما به خوبی آگاهیم که صرف خریدن یک جفت کفش ورزشی عالی ما را دونده مارات ما گونهی منطقی و اهل استدلال از موجودات روی زمین هستیم، حداقل این این چیزیست که به خودمان میگوییم. پس چرا اینقدر غیر منطقی در چنگال این همه عادت بد اسیریم؟ چون نیازمان به برآورده شدن آنی خواسته هایمان میتواند ما را به بیفکر ترین موجود جهان تبدیل کند. اگر تو ساندویچ بزرگی را گاز بزنی و فوراً به خاطر همان یک لغمه دوچار حمله قلبی شوی. و در حالی که به سینه چنگ میزنی بر زمین بیفتی، محال است به سراغ لغمه دوم بروی. اگر پک بعدی سیگارت آنن صورتت را از شکل بیاندازد و عین پیر مردهای هشتاد ساله شوی، به احتمال زیاد از خیر آن میگذری. اگر موفق نشوی، آن تماس دهمی ده را با مشتری بگیری، و بدانی که به دلیلش فوراً اخراج یا ورشکسته میشوی، دیگر برای برداشتن دوباره گوشی تلفن تردید به دل راه نمیدهی. و اگر اولین چنگال پر از کیک فوراً 20 کیلو به وزنت اضافه کند، دیگر گفتن جمله نرم ممنونم برات عین آب خوردن میشود. مشکل اینجاست که پیامد یا خوشنودی آنی ناشی از عادتهای بد اغلب به آنچه در ذهن معقول تو در مورد پیامت های بلند مدت می گذارد، می به نظر نمی رسد که میدان دادن به عادتهای بد اثر منفی آنی داشته باشد. تو در جا سکته نمی کنی، صورتت چروک نمی شود، به جمع بیکاران ملحق نمی شوی و هیكلت چاغ نمی شود. ولی معنایش این نیست که اثر مرکب را فعال نکرده ای. وقتش است که بیدار شوی و ببینی عادتهایی که با آنها میدان میدهی، میتوانند زندگیت را به کابوسی مکرر تبدیل کنند. کوچکترین تغییرات و اصلاحات در روال روزمره میتوانند نتایج را در زندگیت به طرز چشمگیری تغییر دهند. در اینجا هم باز منظورم تغییرهای فوقلاد بزرگ یا زیر و رو شدن ناگهانی شخصیتت، منشت و روش زندگیت نیست. صحبت از ها و ها و اصلاحات بسیار کوچک و به ظاهر کم اهمیتی است که قطعاً می توانند هر چیزی را به طور کلی متحول کنند. بهترین مثالی که برای تاکید بر قدرت تغییرهای کوچک میتوانم بزنم، مثال هواپیمایی است که از لس‌آنجلس آزم نیویورک است. اگر نوک هواپیما فقط یک درصد از مسیر اصلی منحرف شود، یک تغییر تقریباً نامحسوس بعد از بلند شدن از باند پرواز فرودگاه آنجلس، هواپیما در نهایت یا سر از آلبانی در می آورد یا دو چون به خاطر همان یک درصد دویست و چهل کیلومتر از مسیر اصلیش منحرف شده است. در مورد عادتهای تو هم همینطور است. یک عادت بد ساده که در لحظه حال چندان مهم به نظر نمی آید می تواند در نهایت تو را کیلومترها از مسیری که برای رسیدن به هدفها و زندگی مطلوبت باید تیمی کردی دور کند. اکثر آدم ها بی هدف در زندگی پیش می روند. بیان که انرژی آگاهانه چندانی را صرف فهمیدن دقیق این مسئله کنند که چه مقصدی دارند و برای رساندن خود به آنجا چه کارهایی باید انجام دهند. می خواهم نشانت دهم که چطور شور و شوقت را شعله ور کنی و کمکت کنم قدرت خلاقانه توقف ناپذیرت را در مسیر خواسته‌ها و آرزوهای قلبیت به کار بگیری. ریشکن کردن عادتهای بدی که بلوتهای تنومند شدهاند شاق و پرزحمت خواهد بود. برای ماندن تا آخر این راه دشوار چیزی به مراتب بزرگتر از مسممترین اراده ها لازم است. چون نیروی اراده نمی‌تواند به تنهایی آنها را ریشکن کند. تلسم جادویی خود را پیدا کن، همان که نیروی چرای تو خانده می شود. تلاش برای تغییر عادتهایت تنها با کمک نیروی ارادهت مثل این است که با پوشاندن سبد پیکنیکت با دستمال بخواهی خرس گرسنه ای را از آن دور نگه داری. برای مبارزه با خرس عادتهای بدت به چیز قدرتمندتری احتیاج داری. وقتی در انجام دادن کار سختی که برای رسیدن به هدفهایت ضروری است به مشکل برمیخوری، معمولاً فکر می‌کنی که پای ضعف اراده‌ات در میان است. من قبول ندارم. صرف اینکه انتخاب کنی موفق باشی کافی نیست. چه چیزی تو را در رابطه با انتخاب‌های مثبت جدیدی که باید بکنی، ثابت قدم و استوار نگه می‌دارد؟ چه چیزی مانع از افتادن دوباره تو در دام های بد مقانه و بدون فکرت می‌شود؟ چه چیزی این دفعه را از همه دفعات قبلی که تلاش کرده و شکست خورده ای متفاوت می کند؟ اگر جواب این سؤالها را ندانی، به محض اینکه ذره احساس ناراحتی کنی، وسوسه می شوی که به همان روال قدیمی و راحت خود برگردی. تو بارها نیروی ارادت را امتحان کرده ای و دست آخر هم ناکامت گذاشته است. بارها تصمیمهای قاطعی گرفته ای ولی بعد از مدتی رهایشان کرده ای. دفعه آخر فکر میکردی قرار است تمام آن کیلوهای اضافی را کم کنی. پارسال فکر میکردی تمام تماسهای فروشی را که لازم است خواهی گرفت. دیوانگی دیگر بس است. بیا کاری متفاوت انجام بده تا این بار نتایج متفاوتتر و بهتری به دست آوری. نیروی ارادت را فراموش کن. اکنون وقت نیروی چرای توست. انتخابهای تو فقط زمانی معنا پیدا میکنند. آنها را با خواسته‌ها و آرزوهایت پیوند بزنی. آقلانه ترین و انگیزه بخشترین انتخاب ها آنهایی که همسو با آنچه هستند که به عنوان هدفت، خود اصلیت و بالاترین ارزشهایت می شناسی. باید چیزی را بخواهی و باید بدانی که چرا آن را می خواهی نه دست آخر خیلی راحت تسلیم میشوی. خب، چراگ تو چیست؟ اگر بخواهی اصلاحات مهمی در زندگیت ایجاد کنی، باید دلیلی داشته باشی. و برای اینکه بخواهی تغییرات ضروری را در زندگیت بدهی، چراغت باید در نظرت انگیزه بخش باشد و تو را برای دست زدن به هر اقدام لازمی به هیجان آورد. تو باید بخواهی که بلند شوی و برای سالهای متمادی بروی و بروی و بروی و بروی. بروی. خب، چه چیزی است که تو را بیشتر از همه به حرکت وامی دارد؟ چرای تو مشخص کردن چراگت بسیار مهم و است. یعنی آنچه به تو انگیزه می و شعل ورکننده اشتیاقت سرچشمه شور و حیجانت و سوخت استادگیت است این مسئله چنان مهم است که من آن را موضوع یکی دیگر از کتابهایم کردم به نام بهترین سال عمر خود را رقم بزن فرمولی ثابت شده برای رسیدن به هدفهای بزرگ باید چرای خود را بشناسی؟ چرا هر کاری شدنیست؟ نیروی چرای تو همان چیزیست که موجب می شود هنگام انجام دادن کارهای طاقت فرسا، خست کننده، بی و پرزحمت، ناامید نشوی و به راحت ادامه دهی. تا زمانی که چراهای تو به قدر کافی قدرتمند باشند، تمام چطورها بی معنا خواهند بود. اما اگر میل و انگیزه و اشتیاق مشخصی برای پیشرفتن نداشته باشی هر مسیر جدیدی را هم که برای زندگی بهتر دنبال کنی در نهایت رها خواهی کرد اگر نیروی چرای تو یعنی خواسته و آرزویت به قدر کافی قوی نباشد اگر قدرت تعهدت به قدر کافی پرزور نباشد دست آخر مثل هزاران آدم دیگری می شوی که اول سال تصمیمی جدی می گیرند ولی خیلی زود دست می کشند و به خواب گردی در میان انتخاب های بدشان بر می گردند. بگذار مثالی برایت بزنم تا کمکت کند اهمیت این مسئله را بهتر درک کنی. اگر من تخت چوبی به عرض 25 سانتیمتر و طول 10 متر را روی زمین بگذارم و بگویم اگر از این سر تخته به آن سرش بروی 20 دلار به تو میدهم، آیا این کار را می کنی؟ البته که می کنی 20 دلار مفت به چنگت می آید. ولی اگر همین تخته را بردارم و آن را پلی بین بام دو آسمان خراش صد طبقه ای بکنم چه دیگر آن 20 دلار برای رد شدن از روی تخته کافی یا حتی قابل تصور هم نیست مگر نه تو به من نگاه می کنی و می گویی جانت را هم در ازایش به من بدهی این کار را نمی کنم. با این حال اگر یکی از این آسمان آتش گرفته و فرزندت در آن باشد، آیا برای نجات او از روی تخت رد می شوی؟ درصد در تو بی هیچ درنگ و تردیدی این کار را انجام می دهی. چه 20 دلار در کار باشد و چه نباشد. چرا بار اول که از تو خواستم از تخته بین دو آسمان خراش رد شوی گفتی محال است، ولی بار دوم یک لحظه هم تعلل نکردی؟ ویز و خطرهای هر دو که یکی بودند پس چه چیزی تغییر کرده بود چراغ تو یعنی دلیلت برای اینکه بخواهی از روی تخت رد شوی می‌بینی وقتی که چرایت به قدر کافی بزرگ و مهم باشد حاضری تقریبا هر چطوری را به عمل درآوری برای اینکه حقیقتا خلاقیت و نیروی محرکه درونیت را فعال کنی انگیزه هایت باید فراتر از هدف های پولی و مادی باشند. البته منظورم این نیست که این انگیزه ها بد هستند. نه، خیلی هم آلی هند. من خبره چیزهای خوب هستم، ولی مادیات نمی توانند حقیقتن قلب، روح و شهامتت را برای نبرد به خدمت بگیرند. آن شروع اشتیاق باید از جایی عمیق تر بیاید. حتی اگر آن اهداف مالی پرزرگ و برق را به دست بیاوری، باز هم به هدف واقعیت یعنی احساس خوشبختی و رضایتمندی نمیرسی. در مصاحبهام با متخصص درجه که موفقیت آنتونی رابینز او گفت من قولهای کسب و کار زیادی را دیدهام که به هدفهای نهایی خود دست یافتند ولی باز هم در سرخوردگی نگرانی و ترس زندگی می کنند چه چیزی مانع می شود که این آدمهای موفق خوشبخت و شاد باشند دلیلش این است که آنها فقط روی رسیدن به موفقیت تمرکز کردند و نه احساس رضایتمندی و خوشبختی موفقیت های خارقلاده تزمین کننده شادی، خوشبختی، احساس معنا و عشق نیستند این دو یکدیگر را تقویت می کنند. لذا به باور من موفقیت بدون احساس رضایتمندی و خوشبختی شکستی بیش نیست گل گفتی رابین برای همین هم کافی نیست که انتخاب کنی موفق باشی باید امیغتر کاوش کنی تا انگیزه اصلیت را پیدا کنی تا ابرقدرت خود را پیدا کنی یعنی نیروی چرایت را انگیزه اصلی برای دسترسی به نیروی چرایت باید ارزش های اصلیت را بشناسی، ارزش هایی که هم تعیین می کنند کی هستی و هم اینکه چه میخواهی؟ خواهی. ارزش های اصلیت، قطب نمای درونی، برج مراقبت و جی پی اس شخصی تو هستند. آنها مثل فیلتری عمل می کنند که تمام نیازها، خواستهها و وسوسه های زندگیت را از میانش عبور می دهی تا اطمینان حاصل کنی که تو را به مقصد مورد نظرت میرسانند یا نه مشخص کردن ارزش ها گسلیت و همسو کردن هدف ها و خواسته هایت با آنها یکی از مهمترین قدمها قدم ها برای هدایت زندگیت به سوی تحقق رویاهای بزرگت است اگر تا حالا ارزش هایت را به طور دقیق و روشن مشخص نکرده باشی احتمالا خود را در حال انتخاب هایی میبینی که با آنچه واقعا میخواهی در تضاد هستند برای مثال اگر صداقت برایت مهم است ولی دروبرت پر از آدمهای دروغگوست این یعنی که تزادی وجود دارد. وقتی کارهایت با ارزشهایت در تزاد باشند، دست آخر آدمی ناشاد، سرخورده و دلمرده مرده در حقیقت، روانشناسان به ما می‌گویند هیچ چیز به اندازه وقتی که کارها و رفتارهای ما با ارزشهایمان ما همخانی ندارد، استرس و پریشانی ایجاد نمی کند. به علاوه تعیین ارزش های اصلیت کمک می کند آسانتر و کار زندگی کنی. وقتی ارزش های اصلیت را به خوبی بشناسی، تصمیم گیری هم آسان تر موقع روبرو شدن با یک انتخاب، از خودت بپرس آیا این انتخاب همسو با ارزش های است؟ اگر هست، آن را انجام بده. اگر نیست، انجامش نده. برو و پشت سرت را هم نگاه نکن. با این روش، تمام استراب ها و دودلی هایت از بین می میدان نوردت را پیدا کن آدم‌ها یا با چیزهایی که می‌خواهند انگیزه می‌یابند یا با چیزهایی که نمی‌خواهند. عشق یک نیروی انگیزه بخش قوی است، ولی نفرت هم همین طور است. برخلاف تصور عموم مردم، نفرت داشتن از چیزی می‌تواند خوب باشد. نفرت از بیماری، نفرت از بی‌عدالتی، نفرت از جهل، نفرت از خود خودبرتربینی و غیره. گاهی وقتها شناسایی کردن دشمنت آتش درونت را شعله ور می می‌کند. برخی از بزرگترین انگیزه ها، تصمیم گیری ها و پایداری های سرسختانه من ناشی از این بودند که دشمنی برای مبارزه داشتم. در تاریخ، بیشتر رویدادهای دگرگون کننده و انقلاب های سیاسی در نتیجه مبارزه با یک دشمن بودند. داوود دشمنی به نام جالوت داشت، آمریکا و بریتانیا، لوک و دارت ویدر، راکی و آپلوکرید، راش لیمبو و لیبرال ها، لانس آرمسترانگ و سرطان اپل و مایکروسافت مایکروسافت و اپل میتوانیم این لیست را همینطور ادامه بدهیم ولی به گمانم متوجه منظورم شدی دشمنها به ما دلیلی برای شجاعان سینه تبر کردن میدهند اجبار به جنگیدن، مهارتهایت، شخصیتت و از و را به چالش میکشد را مجبور میکند استعدادها و توانمندیهایت را بشناسی و به کار ببندی بدون یک مبارزه برانگیزاننده، ممکن است چاق و تنبل شویم و قدرت و هدفمان را از دست بدهیم. برخی از مراجعین من از این نگرانند که نیروی چرای آنها از هدفهایی سرچشمه میگیرد که چندان شرافتمندانه و والا نیستند. آنها دوچار عذاب وجدان میشوند از اینکه میخواهند ثابت کنند آدمهای منفی بافی که مدام ساز مخالف میزنند اشتباه میکنند. یا از اینکه میخواهند روی کسی را کم کنند که گفته آنها هیچی نمیشوند. یا اینکه میخواهند از رقیب یا از خواهر و برادری جلو بزنند که همیشه بر آنها مسلط بوده است. ولی واقعا مهم نیست که انگیزت چیست البته تا زمانی که قانونی و اخلاقی باشد لازم نیست حتما انگیزه های بشر بزرگی داشته باشی مهم این است که انگیزه بسیار قوی در خودت بیابی گاهی آن انگیزه می تواند به تو کمک کند احساس یا تجربه منفی قدرتمندی را استفاده کنی تا فرجامی به مراتب قدرتمندتر و موفقتر خلق کنی. این مسئله قطعا در مورد پیتر کارول یکی از نامدارترین مربیهای تاریخ راگبی صدق می کند. وقتی ما در مجله موفقیت سپتامبر 2008 با کارول مصاحبه کردیم او انگیزه اولیهش را اینطور توصیف کرد. در کودکی خیلی ریزه میزه بودم، به دلیل جسه کوچکم خیلی از کارها را نمیتوانستم انجام دهم، چند سالی طول کشید تا بالاخره توانستم با دیگران رقابت کنم، تنها چیزی که در تمام آن سالها باعث شد دوام بیاورم، این بود که میدانستم خیلی بهتر از اینها هستم و باید برای ثابت کردن این قضیه بجنگم من ناراحت بودم چون میدانستم میتوانم آدم خاصی باشم، نیاز کارول به جنگیدن در نهایت بزرگی و قدرت او را آشکار کرد در شماره مارس 2010 مجله موفقیت با هنر پیشگ بزرگ آنتونی هاپکینز مصاحبه کردیم وقتی که فهمیدم استعداد و از معراده خاار او از خشم شکوفا شده واقعاً حیرت زده شدم. هاپکینز اعتراف کرد که در دوران کودکی دانش آموز وحشتناکی بوده و از اختلالهایی رنج میبرده که بعدها علم روانشناسی نام خانش پریشی و اختلال کم توجهی بیش بر آنها گذاشت ولی در آن روزها کسی این اختلال ها را شناخت و برای همین هم بود که همه او را به چشم کودکی دردسرساز میدیدند هابکینز از این موضوع پرده برداشت که من عامل نگرانی و پریشانی والدینم بودم. از نظر آنها هیچ آینده روشنی نداشتم چون با وجود اهمیت زیاد سواد و آموزش به نظر نمی که توانایی درک آنچه را که به من آموزش داده می داشتم. بچه های فامیل همگی بچه های درسخان و خوبی بودند. احساس می کردم کل جامعه مرا از خودش می راند و وجودم مالا مال از خشم بود و بسیار غمگین و افسرده بودم. اما هابکینز خشمش را مهار کرد. آن عصبانیت در ابتدا او را به سوی جنگیدن برای رسیدن به موفقیت در عرصه‌های خارج از آموزش یا ورزش سوق داد. او متوجه شد که اندک استعدادی در بازیگری دارد. بنابراین، از خشم ناشی از خوردن برچسب پای به عنوان سوختی برای حفظ تعهدش به حرفه بازیگری استفاده کرد. امروز هاپکینز را یکی از بزرگترین بازیگران زنده دنیا میدانند. در نتیجه شهرت و ثروتی که به دست آورده، توانسته است به آدم های بیشماری در نبرد براگ بهبودی از اعتیاد به مواد مخدر و الکل کمک کند همینطور حامی فعالیت های محیط زیستی مهمی بوده است درست است که نبردش در آغاز ریشه در علتی چندان والا و شرافتمندانه نداشت ولی بی تردید نتایج با ارزشی را رقم زد همه ما می توانیم انتخاب های قدرتمندانه ای داشته باشیم همه ما می توانیم با مقصر قلمداد نکردن بخت و اقبال، قضا و قدر یا هر کس و هر چیز دیگری، کنترل زندگیمان را دوباره به دست بگیریم. در توانایی ما هست که باعث شویم هر چیزی تغییر کند. به جای اینکه بگذاریم تجربه های آزاردهنده گذشته انرژیمان را بخوش کنند و موفقیتمان را نابود کنند، می توانیم از آنها به عنوان سوختی برای ایجاد تغییرهای مثبت و سازنده بهره بگیریم. هدف ها همانطور که قبلا گفتم اثر مرکب همیشه در حال عمل کردن است و همیشه تو را به جایی میرساند. سوال اما این است که به کجا؟ می توانی این نیروی بیامان را انان بزنی و بگذاری که تو را به سوی موفقیت‌های بیشتر سوق دهد ولی باید بدانی که می‌خواهی کجا بروی در طلب چه هدف‌ها چه ها و چه هایی هستی وقتی که در مراسم خاکسپاری پل جیمر یکی دیگر از استادهایم شرکت کردم به یاد قنا و تنوع زندگیاش افتادم به اندازه 10 تا 12 نفر به موفقیت رسیده بود تجربه های مختلف را پشت سر گذاشته بود و به دیگران کمک کرده بود. خبر درگذشت او باعث شد تعداد و اندازه هدفهایی را که برای خودم در نظر گرفته بودم، از نوع بررسی کنم. اگر پل اینجا بود، به ما می گفت: اگر به آن پیشرفتی دست پیدا نمی کنید که هم میخواهید و هم تواناییش را دارید، صرفاً به دلیل این است که هدفهایتان درست مشخص نشدهاند. نقل قولی به یادماندنی از پل اهمیت هدفها را به ما یادآوری می هر آنچه که به وضوح در ذهنتان مجسم کنید مشتاقانه در آرزو باشید صادقانه به آن باور داشته باشید و با شور و شوق برای دستیابی به آن اقدام کنید به طور قطع تحقق میابد آن مهارتی که بیشترین سهم را در ایجاد فراوانی در زندگی هم داشته است یادگیری این مسئله بوده که چطور به صورتی اثر بخش هدفهای خودم را تعیین کنم و به آنها دست بیابم وقتی که قدرت خلاقیت خود را ساماندهی می کنی و آن را روی هدف مشخصی متمرکز می کنی اتفاقی تقریبا جادویی می افتد. من این مسئله را بارها و بارها دیدم موفق ترین آدمهای دنیا همگی موفق شدند چون حتی ریزترین جزئیات چشمندازهایشان را هم تعیین کردند کسی که یک چرای روشن، قانع کننده و آتشین داشته باشد، همیشه حتی بهترین چطوری را هم شکست می فرایند تعیین هدف واقعاً چطور عمل می کند؟ پرد برداری از معمای راز تو فقط آنچه را که به دنبالش هستی میبینی، تجربه میکنی و به دست میآوری. اگر ندانی که دنبال چه چیزی هستی، قطعا به آن دست نخواهی یافت ما ذاتا موجوداتی جستجو کنندگی هدف هستیم مغز ما همیشه سعی میکند دنیای بیرون ما را با آنچه که در دنیای درونیمان ما میبینیم و انتظارش را داریم همسو کند بنابراین وقتی به مغزت دستور می دهی به دنبال چیزهایی بگردد که میخواهی شروع به دیدن آنها می کنی. در حقیقت آنچه به دنبالش هستی همیشه در اطراف تو وجود داشته ولی ذهنت و چشمهایت برای دیدن آن باز نبودند. در واقعیت این همان روشی است که قانون جذب بر اساسش عمل می کند. قانون جذب برخلاف آنچه به نظر می‌رسد جادویی مرموز نیست. بلکه روشی بسیار ساده و عملی است. ما هر روز با بیلیون ها خورده اطلاعات حسی، بسری، سمعی و فیزیکی بمباران میشویم. برای جلوگیری از جنونمان نه دهم دفصد از آنها را نادیده میگیریم و فقط آنهایی را واقعا میبینیم می شنویم یا تجربه می کنیم که ذهنمان روی آنها متمرکز است. برای همین است که وقتی به چیزی فکر می کنی به نظر میرسد رسد که به طرز موجز آسایی آن را به درون زندگی خودت میکشانی. اما واقعیت این است که صرفا همان چیزی را می بینی که قبلن هم آنجا بوده است البته شاید بتوان گفت که حقیقتا آن را به درون زندگیت جذب می کنی چون با آن که چیز مورد نظرت قبلا آنجا و در دسترس تو بوده اما تا زمانی که افکارت را روی آن متمرکز نکردی و ذهنت را برای دیدنش هدایت نکردی آن را ندیدی به نظر منطقی می آید؟ بله اصلاً امر اسرارآمیزی نیست در واقع کاملاً هم منطقی است. حالا دیگر میدانی دانی که هر آنچه ذهنت به آن فکر می کند همان است که روی آن تمرکز خواهد کرد و ناگهان در آن 99.9 درصد فضای باقی مانده می بیندش در اینجا به مثالی کلیشه ای اشاره می کنم چون واقعاً درست است موقع خرید یک اتومبیل جدید ناگهان آن مدل را همه جا میبینی. درست است؟ به نظرت میرسد که یک عالم از آن مدل اتومبیل ناگهان سر و وکلهشان در خیابان‌ها پیدا شده در حالی که تا دیروز خبری از آنها نبود. ولی آیا واقعا اینطور است؟ البته که نه؟ آن اتومبیل‌ها در تمام مدت آنجا بودند ولی تو توجهی بهشان نمیکردی. بنابراین؟ آنها واقعاً برایت وجود نداشتند تا زمانی که تو آگاهانه توجهت را به آنها معطوف کردی وقتی هدفهایت را تعیین کنی چیز جدیدی برای جستجو کردن و تمرکز کردن به مغزت میدهی به این میماند که یک جفت چشم جدید به ذهنت میدهی تا با آن تمام آدمها شرایط، گفتگوها منابع ایده‌ها و نیروی خلاقه حول تو را ببیند با این دید جدید یا برنامه درونی ذهنت در دنیای بیرون شروع به پیدا کردن آنچه می کندند که در درون در طلبش بوده ای، یعنی هدفت به همین سادگی بعد از اینکه هدفهایت را دقیقا مشخص کردی تفاوت عمیقی در نحوه که دنیا را تجربه می کنی و ایدهها آدمها و فرصت ها را به درون زندگیت جذب می ک به وجود میآید. در یکی از مصاحبه هایم با برایان تریسی، او این مسئله را چنین بیان کرد. افراد موفق، هدفهای خیلی روشنی دارند. آنها می دانند که کی هستند و می دانند که چه می خواهند. آنها هدفشان را روی کاغذ می نویسند و برای رسیدن به آن برنامه می ریزند. آدم های ناموفق، هدفهایشان را مثل تکه های مرمری که در قوطی حلبی به هم می خورند، در سرشان این طرف و آن طرف می برند. از نظر ما هدفی که نوشته نشده فقط خیال است و بس. البته هر کسی خیال هایی در سرش دارد ولی آن خیالها مثل فشنگ های بدون باروتند. آدمهایی که هدف را روی کاغذ نمی آورند مثل شکارچی هایی هستند که بی هوا شلیک می کنند و طبیعتا هیچ شکاری نصیبشان نمی شود. بنابراین نقطه شروع رسیدن به هدف ها نوشتن آنهاست. پیشنهاد می کنم همین امروز مقداری زمان برای نوشتن لیستی از مهمترین هدفهایت اختصاص دهی. توصیه می کنم هدفهای تمام حوضه زندگیت را مد نظر قرار دهی. نه فقط هدفهای و کارت یا امور مالیت. تمرکز بیش از حد روی یک حوزه از زندگیت به قیمت کنار گذاشتن حوضه های دیگر حزینه گذافی در پی دارد. پس از این مسئله غافل نشد. به دنبال موفقیت در تمام جنبه های مهم زندگیت باش جنبه هایی از قبیل کسب و کار امور مالی سلامتی و رفاه معنویت روابط خانوادگی دوستی و سبک زندگی و بینشان تعادل برقرار کن شیوهی که من استفاده کردم اکنون در کتاب بهترین سال عمر خود را رقم بزن فرمولی ثابت شده برای رسیدن به هدفهای بزرگ در دسترس همگان است باید چه کسی بشوی؟ اکثر آدمها وقتی در صدد رسیدن به هدف‌های جدید برمی‌آیند می‌پرسند، بسیار خوب، من هدفم را مشخص کردم. حالا برای رسیدن به آن باید چه کاری انجام دهم؟ سؤال بدی نیست، ولی اولین سؤالی نیست که باید به آن پرداخت. سؤال اولی که باید از خودمان بپرسیم این است: باید چه کسی بشوم؟ حتما را می شناسی که به ظاهر همه کارهای درست را انجام می‌دهند، ولی باز هم به آن نتایجی که می‌خواهند نمیرسند. درست است؟ چرا نمیرسند؟ یکی از درس‌هایی که جیمران به من آموخت، این بود که اگر می‌خواهی به چیزهای بزرگتری برسی، باید آدم بزرگتری بشوی. موفقیت چیزی نیست که دنبالش کنی. آنچه دنبالش کنی، از تو فرار می‌کند. درست مثل دنبال کردن پروانه ها. موفقیت است که تو با تبدیل شدن به فردی موفق آن را جذب می کنی. وقتی که این فلسفه را فهمیدم، وای، زندگیم و رشد و پیشرفت فردیم زیر و رو شد. وقتی مجرد بودم و در فکر یافتن همسر دلخواهم، لیست بلند بالایی از ویژگی های زن اید آلم را تهیه کرده بودم. بیش از چهل صفحه پشت و رو از یک دفتر را به توصیف دقیق جزئیات او اختصاص داده بودم. شخصیتش، منشش، ویژگی‌های اصلیش، دیدگاه‌هایش، فلسفه زندگی‌اش، اینکه از چه خانواده و فرهنگی باشد، اندام و سر و وضع ظاهریش چطور باشد، حتی نوع موهایش را مشخص کرده بودم. با جزئیات نوشته بودم که زندگی مشترکمان چگونه چگونه خواهد بود و چه کارهایی با هم انجام خواهیم داد. اگر بعدش از خودم می‌پرسیدم برای یافتن این دختر و ازدواج با او چه کاری باید انجام دهم؟ معلوم میشد که هنوز در حال شکار پروانه بودم اما به جای پرسیدن این سوال نگاه دوباره ای به آن لیست انداختم و به این فکر کردم که آیا خودم صاحب همان ویژگی هایی که در او انتظار داشتم بودم از خودم پرسیدم چون این زنی به دنبال چه جور مردی میگردد برای جذاب بودن در نظر زنی با این ویژگی ها باید چه کسی بشوم چهل صفحه دیگر را در توصیف تمام ویژگی ها صفتها، رفتارها، دیدگاه ها و خصوصیت هایی که لازم بود خودم داشته باشم پر کردم بعد سعی کردم به چنین آدمی تبدیل شوم و آن ویژگی ها را به دست آورم حدس بزن چه شد؟ این کار جواب داد همسرم جورجیا که گویی از صفحه های آن دفتر بیرون آمده و مقابلم ظاهر شده دقیقا همان کسی است که توصیف کردم و در جستجویش بودم حتی در کوچکترین جزئیات کلید کار فهمیدن این مسئله بود که برای جذب کردن و رسیدن به چنین زنی باید چه کسی می بودم و بعد برای تبدیل شدن به چنین آدمی باید چه کاری انجام می دادم. بررسی رفتارها و اصلاح های بد بسیار خوب، بیا فرایند لازم برای دستیابی به هدفهایی را که تصمیم به رسیدن به آنها گرفته ای مشخص کنیم. این فرایند پروسه انجام دادن است، یا در برخی موارد پروسه توقف انجام دادن. آنچه بین تو و هدفت قرار گرفته، رفتارت است. آیا به توقف کاری نیاز داری تا اثر مرکب تو را به مارپیچی نزولی نکشاند؟ به همین ترتیب، آیا نیاز به شروع کاری برای تغییر دادن مسیرت داری تا در بهترین جهت ممکن پیش بروی؟ به عبارت دیگر، چه عادتها و رفتارهایی را باید از زندگیت کم یا به آن اضافه کنی؟ زندگیت در این فرمول خلاصه می شود. انتخاب تو، یعنی تصمیم، به اضافه رفتار تو، یعنی اقدام، به اضافه عادت تو، یعنی انجام دادن مکرر، به اضافه مرکب شدن یعنی زمان مساوی است با هدف هایت برای همین ضروری است که معلوم کنی چه رفتارهایی صد راه مسیری هستند که تو را به هدفت میرساند و چه رفتارهایی به تو کمک میکنند به هدفت برسی ممکن است فکر کنی که همه عادت های بدت را میشناسی ولی شرط میبندم که در اشتباهی برای همین است که در اینجا هم ردگیری و ثبت کردن عادتها اینقدر مهم و مؤثر است. بگذار بیشتر توضیح بدهم. آیا واقعا می دانی که هر روز چند ساعت تلویزیون می بینی؟ چند ساعت صرف تماشای شبکه های خبری می کنی؟ یا برای دیدن موفقیت های دیگران پای شبکه های ورزشی می‌نشینی، یا چند ساعت را به دیدن شبکه های مد اختصاص می دهی؟ می دانی که چند قوطی نوشابه می‌خوری؟ یا چند ساعت را صرف انجام دادن کارهای غیر ضروری با کامپیوترت می کنی، مثل سرزدن به فیسبوک، خواندن شایعات اینترنتی و غیره. همونطور که در فصل قبل تأکید کردم، وظیفه نخست تو این است که در مورد نحوه رفتارت آگاه شوی. باید بدانی که کجای کار قفلت کرده ای و عادت بدی را ناخداگاه در خودت شکل داده ای که تو را به بیراه برده است. چند وقت پیش مدیرعامل موفقی که همراه با او در یک هیئت مدیره غیرانتفاعی کار میکردم مرا استخدام کرد تا در جهت افزایش بهره وریش به او مشاوره دهم. او در کارش موفق بود ولی میدانست که با مقداری راهنمایی و هدایت میتواند زمان و بازده خود را بهینه کند. من از او خواستم که به مدت یک هفته کارهایش را ردگیری و ثبت کند و متوجه چیزی شدم که خیلی زیاد می بینم. او مقداری باور نکردنی از زمانش را صرف مرور اخبار میکرد. چهل و پنج دقیقه در صبح روزنامه میخاند. سی دقیقه دیگر در مسیر رفتن به سر کارش در اتومبیل به اخبار رادیو گوش میداد و همان مقدار زمان را هنگام برگشت به خانه باز به این کار اختصاص میداد. در طول روز در دفتر کارش چندین بار اخبار سایت یاهو را چک میکرد و در مجموع دست کم 20 دقیقه مشغول به این کار بود. وقتی به خانه می رسید، هینگپ و احوال پرسی با خانوادهش پانزده دقیقه پایانی اخبار محلی را گوش می داد. سپس سی دقیقه اخبار ورزشی را تماشا می کرد و در نهایت قبل از رفتن به رخت خواب سی دقیقه هم اخبار شبانگاهی می دید. سرجم هر روز سه ساعت و نیم را صرف اخبار می کرد. این مرد اقتصادان یا تاجر نبود یا در حرفهی مشغول به کار نبود که دانستن آخرین اخبار. حکم مرگ و زندگی را برایش داشته باشد. مقدار زمانی که صرف روزنامه ها و برنامه های خبری رادیو و تلویزیون می کرد، به میزان چشمگیری فراتر از آنچه رفته بود که به عنوان یک عضو آگاه و فعال جامعه یا حتی برای افزایش منافع شخصیش به آن نیاز داشت. در حقیقت، او با انتخاب یا بهتر است بگویم، عدم انتخاب برنامه‌هایش، اطلاعات ارزشمند خیلی کمی به می‌آورد. پس چرا تقریبا چهار ساعت از روزش را به این شکل تلف می کرد؟ چون عادتش شده بود. من به او پیشنهاد دادم که تلویزیون و رادیویش را خاموش کند. اشتراک روزنامهش را لغو کند و از فیدهای RSS استفاده کند تا فقط اخبارهایی را انتخاب و دریافت کند که برای کسب و کارش و منافع شخصیش مهم بودند. این کار فوراً 95 درصد از آنها آنهایهوی خورد کن و اطلاف کننده زمان را از بین برد. حالا میتوانست روزانه در کمتر از 20 دقیقه تمام اخباری را که برایش مهم بودند مرور کند. این تغییر موجب شد که 45 دقیقه از صبح از زمان مسیر رفتن به سر کار و یک ساعت از عصر برای انجام دادن فعالیت‌های مفید و سازنده برایش باقی بماند. برای انجام کارهایی از قبیل ورزش کردن، گوش دادن به نوارهای آموزشی و الهام بخش، مطالعه کردن، برنامه ریزی کردن، آماده شدن و گذراندن ساعتهایی پر از عشق و توجه با خانوادهش. او به من میگوید که هرگز در عمرش به این اندازه از استرس رها نبوده. آخر اخبار منفی همیشه آدم را نگران می‌کنند و هرگز با روحی تر و متمرکز تر از حالا نبوده است. تغییر کوچک سادهی در یک عادت موجب جهش بزرگ و روبه جلوی در تعادل و بهرهوری او شده است. بسیار خوب. حالا نوبت توست. دفترچه یادداشت کوچکت را بیرون بیاور و سه هدف اول خودت را در آن بنویس. حالا لیستی از آدتهای بدی را تهیه کن که ممکن است پیشرفتت را در هر کدام از این حوضه از بین ببرد. تک تکشان را بنویس. آدتها و رفتارها هرگز دروغ نمی‌گویند. اگر اختلافی بین آنچه میگویی و آنچه انجام میدهی وجود دارد، من آنچه را که معمولاً انجام میدهی باور میکنم. اگر بگویی که میخواهی سالم باشی ولی خورده های چیپس روی انگشتانت هست، من آن خورده های چیپس را باور میکنم. اگر بگویی که اصلاح فردی اولویت اصلیت هست ولی وقتت را بیشتر جلوی کامپیوتر به بازی های می‌گذرانی، میگذرانی تا در کتابخانه به مطالعه من آن بازی های رایانه ای را باور می کنم. اگر بگویی که یک هرفهی متعهد به کارت هستی ولی همیشه با تأخیر و بدون آمادگی سر کار می رفتارت خود واقعی تو را لوم می دهد. اگر بگویی که خانوادت مهمترین اولویت زندگیت هستند ولی در عمل در تقویم کاری شلوغت جایی ندارند پس معلوم می شود که اولویت اول تو نیستند. نگاهی به لیست آدتهای بدی که همین الان نوشتی بیانداز این لیست واقعیت توست. حالا باید تصمیم بگیری که آیا همین وضع خوب است یا میخواهی در روال زندگیت تغییر بدهی. بعد تمام آدتهایی را به این لیست اضافه کن که باید در خودت ایجاد کنی. آدتهایی که وقتی در گذر زمان به کار گرفته و مرکب شوند منجر میشوند شکوه مندانه به هدفهایت برسی. البته یادت باشد هدفت از تاییه چونی لیستی این نیست که انرژیت را با سرزنش کردن خودت و تأصف خوردن به هدر بدهی. هدف فقط این است که نگاه دقیق و روشنی به آن چیزی بیاندازی که میخواهی بهبود ببخشی. و البته قرار نیست به اینجا که رسیدیم تو را رها کنم. بیا آن عادت های بد ویرانگر را از ریشه درآوریم. و به جایشان آدت های جدید مثبت و سالم بکاریم. تغییر دهندگان بازی پنج استراتژی برای ریشکن کردن آدت های بد تو آدت هایت را یاد گرفته ای. بنابراین می توانی آنها را از ذهنت بزدائی. اگر می‌خواهی کشتی زندگیت را در مسیر جدیدی پیش برانی اول باید لنگر عادتهای بدی را که تو را سنگین و زمین گیر کرده است از جا بکنی کلید کار این است که نیروی چرای خود را چنان قوی کنی که بر میل شدید تو به براورد شدن آنی خاستهایت غلبه کند برای این منظور به روش جدیدی نیاز داری آنچه در ادامه می‌آید، مجموعه ای از استراتژی های تغییر دهنده بازیست که همیشه طرفدارشان بودم. یک هایی را که موجب به بروز عادتهای بدت می شوند شناسایی کن. به لیست های بد خود نگاهی بیانداز و برای هر کدامشان مشخص کن که چه چیزی عاملش است. از آنچه سردر بیاور که من چهار سؤال بزرگ می خانم. یعنی چه کسی؟ چه چیزی؟ چه جایی و چه زمانی پشت هر رفتار بدی است برای مثال آیا وقتی با افراد خاصی هستی بیشتر می نوشی؟ آیا ساعت خاصی از روز هست که باید حتماً چیز شیرینی بخوری چه احساسهایی معمولاً بدترین عادت‌های تو را برمیانگیزند؟ استرس خستگی خشم نگرانی دلشوره و بی‌حوصلگی چه زمانی آن احساسها را تجربه می کنی؟ با چه کسی؟ کجا؟ و در حال انجام دادن چه کاری؟ چه موقعیت هایی موجب بروز عادت های بدت می شوند؟ موقعی که سوار اتومبیلت هستی؟ قبل از شروع جلسه ارزیابی عمل کردت؟ ملاقات با خانواده همسرت؟ کنفرانس ها؟ محیط های اجتماعی؟ وقتی که به لحاظ جسمانی احساس ناامنی می کنی؟ موقع فراریدن زرب عجل ها؟ نگاه دقیقتری به روال معمول زندگیت بیانداز. معمولا وقتی از خواب بیدار میشید چه میگویی؟ در زمان استراحت برای خوردن قهوه یا ناهار چطور؟ یا وقتی که بعد از یک روز طولانی به خانه برمیگردی؟ در اینجا هم باز دفترچه یادداشتت را بیرون بیاور و عامل های محرکت را بنویس. همین کار ساده، به تنهایی آگاهیت را تصاعدی افزایش می دهد. البته این همه کاری نیست که باید انجام بدهی. چون همانطور که قبلا گفتیم صرف افزایش آگاهیت از یک عادت بد برای شکن کردنش کافی نیست. دو، خانه را تمیز کن حالا نوبت تمیز کردن است: تمیز کردن واقعی. اگر میخواهی دست از عادت نوشیدنت برداری، باید تا قطره آخرش را از خانهت بیرون ببری و همینطور هم از ویلایت که برای تعطیلات به آنجا میرو. خود را از شر جام و بقیه وسایلی که موقع نوشیدن استفاده می خلاص کن. اگر می خواهی که دیگر قهوه ننوشی دستگاه قهوه ساز را جمع کن و باقیمانده پاکت قهوت را به همسایه خواب بده. اگر میخواهی عادت خرج کردنت را کنترل کنی، بعد از ظهری وقت بگذار و اشتراک هر ناکاتالوگ کالا یا بروشور تخفیف فروشگاهی را که به صندوق پستیت یا ایمیلت ارسال می شود، لرف کن. تا حتی لازم نباشد روند همیشگی جمع‌آوری و ریختن آنها در سطل زباله را دنبال کنی. اگر می‌خواهی غذاهای سالم بخوری، کابینت آشبازخانت را از تمام آتواشخالهای ناسالم خالی کن. دست از خریدن حلحوله بردار و تسلیم این استدلال هم نشو که چون خودت منصفانه نیست نگذاری بقیه افراد خانوادت هم آن حل حوله ها را بخورند به من اعتماد کن حال و روز همه اعضای خانوادت با نخوردن آن آتواشخال بهتر خواهد شد آن حل حوله ها را وارد خانت نکن خود را از شر هر چیزی که های بدت را تقویت می کنند خلاص کن 3. های بد خود را با های خوب جایگزین کن نگاه دوباره ای به لیست عادتهای بدت بینداز. چطور میتوانی آنها را تغییر دهی تا دیگر اینقدر مذر نباشند؟ آیا میتوانی آنها را با عادتهای سالمتری تری جایگزین کنی یا اصلا از زندگیت حذف کنی؟ منظورم برای همیشه است. آنهایی که مرا میشناسند میدانند که عاشق خوردن چیز شیرینی بعد از غذا هستم. اگر در خانه بستنی باشد، آن چیز شیرین تبدیل می شود به یک بستنی سیسکوپی با تکه های موز معادل 1255 کالری. من موفق شدم این عادت بد را با دو شکلات کوچک یعنی 50 کالری جایگزین کنم. با این کار هنوز قادر به ارزاق میلم به خوردن شیرینی هستم ولی دیگر لازم نیست یک ساعت بیشتر روی ترد میل بدوم تا آن کالری های اضافی را بسوزانم و به حالت نرمال برگردم. خواهر همسرم مدتی بود موقع تماشای تلویزیون حل حوله های شور و ترد می‌خورد و اصلا هم متوجه نمیشد که مثلا ته پاکت چیپسی را در آورده است. بعد فهمید آنچه چه واقعاً از خوردنش لذت میبرد، احساس تردی در دهانش بود نه خود آن حل حوله ها. برای همین تصمیم گرفت این عادت بدش را با عادت جویدن های هویج و کرفس و کلم خام جایگزین کند. با این کار همزمان هم آن حس لذت بخش را تجربه می کرد و هم طبق توصیه متخصصان تغذیه سبزیجات را وارد رژیم غذاییش کرده بود. مردی که قبلا برای من کار می کرد، عادت به نوشیدن 8 تا 10 نوشابه رژیمی در روز داشت. واقعا عادت بدی است. من پیشنهاد کردم آنها را با آب گازدار که اسانس لیمو یا پرتقال تازه به آن اضافه شده جایگزین کند. او حدود یک ماه این کار را انجام داد و کم کم متوجه شد که اصلا به نوشابه گازدار نیاز ندارد و نوشیدن آب معمولی را بر همه چیز ترجیح می دهد. روی این استراتژی کار کن و ببین که چه رفتارهایی را می توانی جایگزین یا حذف کنی. چهار. آرام آرام پیش برو. من نزدیک اقیانوس آرام زندگی می کنم. هر وقت که برای شنا کردن به ساحل میروم، اول تا قوزک پایم را در آب خیس میکنم، بعد تا زانو توی آب می میروم، بعد تا کمر و بعد تا قفسه سینه و سپس کامل در آب فرو میروم. برخی ها هم هستند که سریع میدوند و شیرجه میزنند و خلاص. خوش به حالشان. ولی برای من اینطور نیست. من دوست دارم آرام آرام وارد آب شوم. احتمالا هم به علت ضربه روحیم در دوران بچگی است. که در استراتژی بعدی در موردش توضیح می دهم برای راحت تر از بین بردن برخی از عادت قدیمی و ریشه دارت شاید بهتر باشد که از قدم های کوچک شروع کنی ممکن است دهها سال صرف تکرار کردن نهادینه کردن و تقویت کردن آن عادت ها کرده باشی لذا عاقلانه است که به خودت مقداری زمان برای در هم شکستن آنها بدهی هر بار یک قدم چند سال قبل دکتر همسرم از او خواست که به مدت چند ماه کافئین را از رژیم غذاییش حذف کند. ما هر دو عاشق قهوه بودیم. بنابراین اگر قرار بود او عذاب بکشد، به این نتیجه رسیدم که فقط وقتی منصفانه است که هر دو با هم رنج بکشیم. ما اول به سراغ روش حذف پنجاه پنجاه رفتیم. به مدت یک هفته پنجاه درصد قهوه بدون کافئین و پنجاه درصد قهوه معمولمان. هفته بعدش به کل از قهوه بدون کافئین استفاده کردیم هفته سوم چای بدون کافئین ارل گری خوردیم و به دنبالش چای سبز بدون کافئین. یک ماه طول کشید تا به آن نقطه برسیم ولی یک لحظه هم از قطع کافئین زجر نکشیدیم نه سردردی، نه خابالودگی، نه خستگی ذهنی و نه هیچ چیز دیگری ولی اگر یک مرتبه قطعش می کردیم، وای از فکرش تنم پنج یا یک مرتبه به درونش بپر همه مثل هم نیستند. برخی محققان دریافتند که برای بعضی آدمها عوض کردن یک تعداد زیادی از های بد می تواند راحت تر باشد تا تغییر دادن تدریجی آنها. برای مثال دکتر دین اورنیش متخصص پیشگام در حوزه قلب و روغ متوجه شد که می تواند بیماری قلبی پیشرفته افراد را با ایجاد تغییرهای اساسی ناگهانی در سبک زندگیشان بدون تجویز دارو یا عمل جراحی درمان کند. او کشف کرد که این بیمارها اغلب برایشان راحت تر است که یک مرتبه با تقریبا تمام آدتهای بد خود خداحافظی کنند. او آنها را به یک دوره آموزشی دعوت کرد. و رژیم بسیار کم چربی را جایگزین منوی غذای پر از چربی و کلسترولشان نمود. این برنامه مشتمل بود بر ورزش کردن یعنی بلند شدن از روی کاناپه و پیاده روی کردن یا آهسته دویدن و همینطور تکنیک های کاهش استرس و دیگر آدت مفید برای سلامتی قلب. در کمال شگفتی در کمتر از یک ماه این بیماران یاد گرفتند مجموعه از عادت های بد تمام عمریشان را رها کنند و عادت جدیدی را در پیش بگیرند و در نتیجه بعد از یک سال مثل بقیه آدمها ها سالم و تندرست شدند به شخصه این روند از نظر من استثناء است نه ولی در هر حال تو باید استراتژی را پیدا کنی که از همه بیشتر به دردت می خورد. وقتی بچه بودم، خانواده هر از گاهی در کنار دریاچه رولینز چادر می زدند. آب این دریاچه که در ای در کالیفورنیای شمالی قرار دارد، از زوب شدن یخچالهای طبیعی رشتکوهای مشرف بر دریاچه تاهو تأمین می شود. برای همین، آبش به طرز وحشتناکی سرد است. در مدتی که آنجا بودیم، هر روز پدرم اصرار می کرد که در آن دریاچه قطبی اسکی روی آب کنم کل روز با تمام وجود نگران آن دستور ترسناک پدرم بودم البته ناگفته نماند که من عاشق اسکی روی آب بودم فقط از رفتن به درون آب نفرت داشتم و خب البته نمیشد هم خدا را خواست و هم خورم را. پدرم حواسش بود که از زیر این کار در نروم ولو شده به قیمت پرت کردن ناگهانی من در آب بعد از ده دوازده 12 ثانیه جانکاه که نزدیک بود در اثر سرمای شدید آب سکته کنم آب حالم را جا می آورد و نشاط خاصی به من میبشید. باید اعتراف کنم که وحشت من از رفتن به درون آب از خود پریدن در آن بدتر بود. البته همین که بدنم به دمای آب عادت میکرد اسکی روی آب تبدیل به تجربههای لذت بخش می شود. با این حال، من هر بار و همیشه این چرخه وحشت و آسودگی خیال را از سر می گذراندم. رها کردن یا تغییر دادن ناگهانی یک عادت بد بیشباهت به این پروسه نیست شاید برای مدت کوتاهی جانکاه به نظر برسد یا حداقل ناخوشایند ولی درست همانطور که بدن ما از طریق فرایندی به نام حومه استازی خود را با محیط جدید سازگار می کند توانای هومه استازی مشابهی هم برای سازگاری با تغییرات رفتاری ناآشنا داریم و معمولاً خیلی سریع میتوانیم به لحاظ فیزیولوژیکی و روانی خود را با موقعیت جدید سازگار کنیم. گاهی اوقات وارد شدن تدریجی به درون آب جواب نمیدهد. گاهی واقعاً باید یک مرتبه به درون آن بپری. اکنون میخواهم از خودت بپرسی کجا میتوانم آهسته شروع کنم و کجا لازم است که آن پرش بزرگ را انجام دهم. که از درد و ناراحتی فرار کردم در حالی که در اعماق وجودم میدانستم اگر صرفاً به سراغش میرفتم و سری وارد عمل میشدم. در چشم بر زدنی با موقعیت جدید سازگار می شدم. یکی از شریک های قبلی من برادر دائم الخمری داشت که نهار، شام، بعد از شام و کل تمام آخر هفته را می نوشید. یک روز که در مراسم عروسی همدانشگاهی سابقش شرکت کرده بود برادر دوستش را دیده بود که از هر دوی آنها ده سال بزرگتر بود ولی ده سال جوانتر به نظر می رسید. آن مرد در تمام طول عروسی داشت می و می خندید و خوش می و و سرزندگی و شور و نشاطی از خود ساته می کرد که او سالهای سال بود تجربه نکرده بود در جا تصمیم گرفت که دیگر لب به مشروب نزند یک تصمیم آنی که بیش از شش سال است به آن پایبند بند مانده است شخصا وقتی قرار بر تغییر عادت بدی در خانه باشد محتاطانه پیش می و اول پنجه هم را خیست می کنم. ولی در مورد زندگی کاریم دریافتم که یک شیرجگ بزرگ به مراتب کارسازتر است. چه داری کسب و کار جدیدی راه میاندازی و چه داری با مشتریها، شرکا یا سرمایه جدید سر و کله میزنی، محتاط بودن و آهسته پیشرفتن معمولا جواب نمیدهد. در چون این مواقعی به یاد دریاچه رولینز میوفتم و به خودم یاداوری میکنم که این تغییر جدید هم درست مثل رفتن به درون دریاچه؟ اولش دردناک خواهد بود ولی بعد در عرض مدت کوتاهی روح بخش و نشاتنگیز خواهد شد و بنابراین به آن سختی موقتیش میارزد هر از گاهی آدت های بدت را چک کن. نمی‌گویم که هر چیز بدی را از زندگیت حذف کن. تقریبا همه چیز به قدر اعتدال خوب است. ولی چطور می‌توانی بفهمی که آیا عادت بدی دارد به آقا بالا سرت تبدیل می‌شود یا نه؟ شخصا این مسئله را با چک کردن آدت های بدم متوجه می‌شوم. من هر از گاهی یک روزه عادت بد می‌گیرم. یعنی عادت بدی را انتخاب می‌کنم. و برای مدتی از انجام دادنش اجتناب میکنم تا مطمئن شوم هنوز در رابطه من رئیس منم. عادت های بد من قهوه، بستنی، نوشیدنی و فیلم هستند. قبلا در مورد وسواسم به بستنی برایت گفتم. وقتی پای نوشیدنی به میان میآید، آید، دوست دارم مطمئن شوم که یک لیوانش برایم کفایت میکند و لازم نیست خودم را در آن غرق کنم تا حال خوبی پیدا کنم. حدود هر سه ماه یک بار یک عادت بد را انتخاب میکنم و به مدت سی روز از آن پرهیز میکنم این امر احتمالاً ریشه در چله روزه بر گرفته از آیین کاتولیک من دارد من عاشق این هستم که به خودم ثابت کنم رئیس هنوز منم تو هم این کار را امتحان کن عادت بدی را انتخاب کن چیزی که معمولاً به قاعده انجامش میدهی، ولی میدانی که انجام دادنش چندان به مسلحتت نیست و بعد یک دوره سی روز از آن پرهیز کن اگر دیدی که در آن سی روز پرهیز کردن واقعاً برایت سخت است، احتمالاً عادتی را یافته ای که بهتر است از زندگیت حذف کنی تغییر دهندگان بازی، شش تکنیک برای جاانداختن عادت های خوب. حالا که به تو کمک کردیم عادت های بدی را حذف کنی که تو را به مسیر اشتباه میبرند نیاز به انتخاب رفتارها و نهایتا عادتهایی داریم که تو را در مسیر آرزوهای بزرگت می حذف یک عادت بد معنایش کنار گذاشتن چیزی از روال معمول زندگیت هست. اما ایجاد و سپس جاانداختن عادت های جدید سربخشتر، نیازمند مجموعی کاملا متفاوت از مهارت هاست. تو در واقع درختی را می کاری، آبش می دهی، کودش می دهی و اطمینان حاصل می کنی که به خوبی ریشه کند. انجام دادن این کار، تلاش، زمان و ممارست می تلبد. در ادامه به تکنیک های محبوب خودم برای جا انداختن عادت های خوب اشاره می کنم. جان سی مکسویل متخصص حوزه رهبری گفته است، تو هرگز زندگیت را عوض نخواهی کرد مگر اینکه چیزی را که هر روز انجام میدهی عوض کنی راز موفقیت تو ریشه در روال معمولت دارد طبق تحقیقات لازم است یک رفتار جدید را 300 بار انجام دهی تا آن را به عادت ناخداگاهی تبدیل کنی این یعنی تقریبا یک سال تمرین روزانه خوشبختانه همانطور که قبلا هم گفتم بعد از سه هفته تمرکز مستمر شانس به مراتب بیشتری برای جا انداختن عادت جدید در زندگیمان داریم. معنایش این است که اگر در سه هفته اول هر روز توجه ای به عادت جدیدی بکنیم شانس خیلی بیشتری خواهیم داشت که آن را به یک عادت تمام عمری تبدیل کنیم. حقیقت این است که تو قادری عادتی را در عرض یک ثانیه عوض کنی اما ممکن هم هست بعد از ده سال آزگار باز هم در حال تلاش برای ریشکن کردن آن باشی. اولین باری که به بخاری داغ دست زدی، فورا فهمیدی که این کار هرگز عادتت نمی شود. شک و دردش چنان شدید بود که برای همیشه آگاهی تو را نسبت به این قضیه تغییر داد و متوجه شدی که دیگر تا آخر عمرت باید با حواس دور بر بخاری روشن بپلکی. کلید کار حواس جمع ماندن است. اگر واقعا میخواهی عادت خوبی را حفظ کنی، اطمینان حاصل کن که حداقل یک بار در روز به آن توجه می اینطوری احتمال خیلی بیشتری هست که موفق بشوی. 1. شرایت را برای موفق شدن خود مهیا کن. هر عادت جدیدی باید با سطک زندگیت همخانی داشته باشد. اگر در باشگاهی ورزشی ثبت نام کرده که 50 کیلومتر با خانه فاصله دارد، مطمئن باش که تا آخرش نخواهی رفت. اگر عادت داری که شبها تا دیر وقت بیدار باشی، باشگاهی که شش عصر می می‌شود، به درد تو نخواهد خورد. باشگاه تو باید نزدیکت باشد و به زمان بندیت هم بخورد. اگر میخواهی وزن کم کنی و رژیم غذایی سالم‌تری داشته باشی، اطمینان حاصل کن که یخچال و کابینتاش پسخانهت پر از غذاهای سالم باشند. می خواهی مطمئن باشی وسط روز که دلت ضعف رفت به سراغ خوردن هله هوله نمیروی، آجیل و میان وعده های سالم در کشوگ میز کارت داشته باش. ساده ترین راه برای برطرف کردن گرسنگی خوردن مواد قندی است که البته خیلی مزرند. یکی از استراتژی های من همراه داشتن پروتئین است. من آخر هفته مقداری مرغ میپزم و آن را فریز می کنم تا در طول هفته از آن استفاده کنم. یکی از حواظ و مخرب ترین من اعتیادم به خواندن ایمیل است. جدی می گویم، خنده ندارد. اگر مراقب نباشم و حواسم را جمع نکنم، ممکن است روزانه ساعت زیادی را بابت خواندن و جواب دادن به حجم عظیمی از ایمیل شخصی و کاریم برباد بدهم. لذا برای پایبندی مستمر به این عادت جدید که فقط روزی سه بار ایمیلم را چک کنم، تمام اعلانهای خودکار مربوط به دریافت ایمیل را از کار انداختم. به علاوه، وقتی در یکی از آن بازه های زمانی نیستم که به خواندن ایمیل اختصاص دادم، ایمیلم را کلن میبندم. باید دور گردا به زمان حسار بکشم، وگرنه هر لحظه احتمال دارد به درون آن کشیده شوم. دو، به اضافه کردن فکر کن، نه به کم کردن. وقتی که با مانتل ویلیامز برای مجله موفقیت مصاحبه کردم، در مورد رژیم سفت و سختی گفت که به دلیل بیماری ام خود مجبور به حفظ آن است. او روشی را در پیش گرفته که خودش اصل افزودن میخواند و به عقیده من ابزاری فوقالعاده مؤثر و کارآمد برای هر آدمی با هر هدفی است. او روشش را این طور برایم توصیف کرد در این روش آن چیزی که از رژیم غذایت حذف می‌کنی اهمیت چندانی ندارد. مهم آن چیزی است که در عوضش به رژیم غذایت اضافه می‌کنی. این معیار زندگی او شده است. به جای فکر کردن به اینکه باید خودش را از فلان غذا محروم کند یا فلان خوراکی را از برنامه غذایش حذف کند، برای مثال نمی‌توانم همبرگر، شکلات یا لبنیات بخورم، به آنچه چه فکر می‌کند که می‌تواند به جایش بخورد. برای مثال، امروز قرار است سالاد و سبزیجات پخته و انجیر تازه بخورم. او تمرکزش و شکمش را با چیزی پر می کند که می بخورد. برای همین، دیگر توجه یا احساس گرسنگی به چیزی ندارد که نمی بخورد. مانتل در عوض تمرکز روی آنچه باید کم کند، به آنچه فکر می کند که می‌تواند اضافه کند. نتیجه این کار به مراتب قدرتمندتر است. یکی از دوستانم می‌خواست عادت بد طرف کردن مقدار زیادی از زمانش پای تلویزیون را بشکند. برای کمک به او ازش پرسیدم اگر سه ساعت وقت آزاد داشت، دوست داشت چه کاری انجام دهد. او گفت که در این صورت با بچه‌هایش بیشتر بازی می‌کرد. من همچنین از او خواستم سرگرمی را انتخاب کند که همیشه دلش می‌خواسته به آن بپردازد ولی وقتش را نداشته است. انتخابش عکاسی بود. او که خوره تکنولوژی بود، به بازار رفت و همه ابزار لازم برای عکاسی و ویرایش پیشرفت عکس را خرید. از آن به بعد، شادمانه با خانوادهش به گردش میرفت و تا می‌توانست های فوق‌العاده از آنها میانداخت. بعد اصرها چندین ساعت را صرف ویرایش عکس ها و کنار هم قرار دادن آنها و درست کردن اسلاید و آلبوم عکس برای نشان دادن به خانوادهش می کرد. این کار منجر شد که آنها زمانهای بیشتری را در کنار هم به خنده و شادی و یادآوری اینکه چقدر خوش بودند بگذرانند. از آنجایی که تمرکز دوستم حسابی روی بچه ها و عکاسی بود، دیگر نه زمان و نه میلی به نشستن و تماشای تلویزیون در شب داشت. او فهمید اشتیاقش به تماشای تلویزیون به این دلیل بوده که حواسش را از های کاری روزانهش پرت می‌کرده است. اما حالا به واسطه جایگزین کردن تماشای تلویزیون با عادت جدید بازی کردن با بچه ها و اکاسی کردن اشتیاق جدیدی را کشف کرده بود با قدرتی به مراتب بیشتر و پاداشهایی به مراتب بزرگتر. چه چیزی را می توانی به زندگیت اضافه کنی تا با کمک آن تجربه ی زندگیت را غنیتر کنی؟ 3. همه را خبر کن یک مقام رسمی را در حال خوردن سوگند کاریش تصور کن. او میگوید: سوگند یاد می کنم که و سپس شروع به سخنرانی در مورد نحوه محقق کردن وعده های انتخاباتیش می کند. او میداند که به محض سوگند خوردن در محضر مردم، از یک طرف مسئول و جوابگوی هر اقدامی است که در جهت عکس وعده هایش انجام می دهد و از طرف دیگر، برای هر پیشرفتی به سوی هدف هایش مورد تحسین قرار می گیرد. میخواهی آن عادت جدید را در وجودت نهادینه کنی برادر بزرگی پیدا کن که تو را زیر نظر بگیرد این کار با این همه رسانه جمعی که امروزه در دسترس است هرگز به این راحتی نبوده است من در مورد زنی شنیدم که تصمیم گرفت با نوشتن هر پنی که هر روز خرج میکرد در وبلاگش کنترل امور مالیش را در دست بگیرد او از خانواده دوستان و تعداد زیادی از همکارانش خواست که عادتهای خرج کردن او را دنبال کنند. در نتیجه آن چشمهای مراقب، در امور مالیش به مراتب مسئولیت پذیرتر و منذبه شد. یک بار به همکاری کمک کردم سیگار را ترک کند. برای این کار، همه ی افراد شرکت را از این مسئله خبردار کردم. خوب گوش کنید، زلدا تصمیم گرفته دیگه سیگار نکشه. عالی نیست؟ همین الان آخرین نخ سیگارش رو کشید. بعد بیرون دفترش تقویم دیواری بزرگی نصب کردم. زلدا هر روزی که سیگار نمی‌کشید، در قرمز رنگ بزرگی روی آن میکشید. همکاران با دیدن آن ضربدرها تشویقش میکردند و این کار آنقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره کل تقویم پر شد. زلدا نمیخواست شرمنده آن تقویم و همکاران و خودش بشود، برای همین سیگار را ترک کرد. به خانوادهت بگو، به دوستانت بگو، در فیسبوک و توییتر اعلان کن. همه را خبردار کن که کلانتر جدید در شهر است و از این به بعد رئیس تو هستی. چهار. یک رفیق موفقیت پیدا کن. چیزهای خیلی کمی به قدرتمندی دو نفری هستند که دست در دست هم به سوی هدف مشترکی پیش می روند. برای افزایش احتمال موفقیتت یک رفیق موفقیت برای خودت دست و پا کن کسی که هین نهادینه کردن عادت جدیدی در خودت تو را مجبور به قبول مسئولیت کارهایت کند و تو هم در ازاگش همین لطف را در حق او بکنی من برای مثال کسی را دارم که همراه موفقیت خودم میخوانم ما هر جمعه درست سر ساعت یازده صبح با هم سی دقیقه تلفنی صحبت میکنیم و بردهایمان هایمان، باعث هایمان، هایمان و افسوسهایمان هایمان را مطرح می کنیم. و نظر یکدیگر را در موردشان جویا می شویم و مسئولیت های هر کسی را به او گوش زد می کنیم. خوب است که یک رفیق موفقیت برای پیاده روی و دویدنهای های معمولت، یا برای رفتن به باشگاه ورزشی، یا برای بحث و تبادل نظر در مورد کتاب های رشته فردی داشته باشیم. پنج. رقابت و رفاقت هیچ چیز به اندازه رقابت دوستانه، موجب برانگیخته شدن روحی رقابتی و قوته ورکردن خودت در یک عادت جدید نمی شود. دکتر محمد آز یک بار در مساحبهی به من گفت، اگر آدمها در روز فقط هزار قدم بیشتر بر می داشتند، زندگیشان زیر و رو می شد. یک بار ویدیو سهامدار عمده مجله موفقیت، رقابتی را برگزار کرد که در آن با استفاده از قدمسنج تعداد قدمهای افراد شرکت کننده شمارش می‌شد. کارمندان به تیم‌های مختلف دست بندی شدند و با هم رقابت کردند تا معلوم شود کدام تیم رکورد بیشترین تعداد قدم را به دست می‌آورد. برایم مایه شگفتی بود که می‌دیدم آدم‌هایی که قبلاً برای سلامتی یا منفعت خودشان ورزش نمی‌کردند ناگهان شروع به 6، هفت یا 8 کیلومتر پیاده روی در روز می کردند. موقع نهار در محوطه پارکینگ پیاده روی میکردند اگر کنفرانس تلفنی داشتند با گوشی های تلفن همراهشان راه میرفتند و حرفشان را میزدند به خاطر این رقابت راه هایی را برای افزگش فعالیتشان پیدا کرده بودند قدم های همه ردگیری و ثبت می شد و همه می توانستند ببینند که چه کسی قدم هایش را کم کرده و چه کسی بر تعداد قدم هایش افزوده است. مجموع تعداد قدم های افراد هر روز بیشتر می شد. با این حال به محض تمام شدن رقابت در کمال حیرت دیدم تعداد قدم ها ناگهان افت شدیدی پیدا کرد. نزدیک به بیش از شست درصد درست در همان ماه اول بعد از رقابت. اما به محض شروع دوباره آن تعداد قدم ها در جا بیشتر شد. ظاهراً فقط نیاز به یک رقابت کوچک بود تا موتور آدم‌ها را دوباره روی دور تند بیندازد و افزون بر این حس شگفتنگیزی از وحدت و رفاقت را هم برایشان به ارمغان آورد. چنو رقابت دوستانه ای را میتوانی با دوستانت، همکارانت یا همتیمیهایت هایت راه بیندازی؟ چطور میتوانی رقابت دوستانه و روحی رقابتی را درون عادت جدیدت کنی؟ شش پیروزی هات را جشن بگیر به خودت پاداش بده حتما شنیده ای که میگویند کار دائم واری از تفریح میکند تو را آدم آهنی و این بدترین اتفاق ممکن است در طول مسیر باید زمانی را هم برای جشن گرفتن در نظر بگیری برای لذت بردن از ثمره دستاوردها و پیروزی ها اگر فقط از خودت مایه بگذاری بیان که هیچ پاداشی نصیبت شود، محال است به راحت را تا آخر ادامه دهی. به همین دلیل، باید هر ماه، هر هفته و هر روز، پاداش هایی هر چند کوچک برای دادن به خودت پیدا کنی. برای تقدیر از خودت به دلیل پایبند بودن به عادتی جدید. این پاداش می تواند اختصاص زمانی به خودت برای قدم زدن، دراز کشیدن در وان حمام یا خاندن چیزی صرفاً برای سرگرمی باشد برای پاداش موفقیت های مهمتر و بزرگتر میتوانی جلسه ماساژی برای خودت رزرو کنی یا در رستوران مورد علاقت غذا بخوری و صد البته وقتی که به نهایت موفقیت مورد نظرت رسیدی باید بزرگترین پاداشی را که میتوانی به خودت بدهی تغییر سخت است هورا 99 درصد افراد شکست خورده و موفق در یک چیز مشترکند همگی از انجام دادن کارهای یک نواخت متنفرند ولی فرقشان این است که آدمهای موفق در هر حال آن کارها را انجام می دهند. تغییر سخت است برای همین هم مردم عادتهای بد خود را عوض نمی کنند. و برای همین هم هست که افراد بسیار زیادی دست آخر در زندگی تبدیل به آدمهای ناراضی و ناخوش و ناشاد میشوند. با این حال آنچه مرا به هیجان میآورد این است که اگر تغییر آسان بود و همه می آن را انجام دهند، دیگر من و تو به این راحتی ها بالاتر از دیگران قرار نمی و آدمهای فوق موفقی نمیشدیم. معمولی بودن راحت است. غیر معمولی بودن و خاص بودن چیزی است که تو را از توده مردم جدا می کند. شخصا وقتی می بینم کاری انجام دادنش سخت است همیشه خوشحال می شدم. چرا؟ چون میدانم اکثر مردم انجامش نمی دهند. در نتیجه به مراتب راحتتر میتوانم بیفتم و بقیه پشت سرم بیایند. من آشغان چه هستم که دکتر مارتین لوتر کینگ با شیوایی بیان کرده است. ایار هر آدمی در کوران سختی ها ایان می شود. نه به وقت آسایش و فراغ بال. وقتی که تو با وجود همه سختی موانع و رنج ها به راحت ادامه می دهی، آن زمان است که پیشرفت می کنی و در رقابت دست بالا خواهی داشت. اگر کاری سخت، پردرد سر و بار است، خب باشد. تو فقط شروعش کن و به انجام دادنش ادامه بده. مطمئن باش جادوی اثر مرکب سخاوتمندانه پاداشت را خواهد داد صبور باش وقتی نوبت ریشکن کردن عادتهای بد قدیمی و شروع کردن عادتهای جدید میرسد یادت باشد که صبور باشی اگر بیست، سی، یا چهل سال و حتی بیشتر رفتارهایی را تکرار کرده ای که حالا سعی داری تغییرشان بدهی، باید انتظار زمان طولانی و تلاش زیادی داشته باشی تا نتایج پایدار را ببینی طبق تحقیقات علمی، الگوهای فکری و رفتاری که بارها تکرار شوند چیزی را خلق میکنند که شیار مغزی یا ای از نورانهای متصل به هم خانده میشوند این شیارها، الگوهای فکری یک عادت خاص را در خود دارند. یادت باشد. توجه عادت را تغذیه می کند. وقتی توجهمان را به عادتی معطوف می کنیم، شیارهای مغزی را فعال می کنیم و افکار، آرزوها و اقدامهای مرتبط با آن عادت را آزاد می کنیم. خوشبختانه مغز ما مثل موم منعطف و شکل پذیر است. برای همین اگر توجه نشان دادن به عادتهای بد را متوقف کنیم، آن شیارها ضعیف می شوند. در ضمن وقتی عادتهای جدیدی را شکل می دهیم، شیارهای جدید را با هر بار تکرار عمیق تر می کنیم، تا اینکه سرانجام بر شیارهای قبلی غلبه می کنند. خلق عادتهای جدید و ایجاد شیارهای جدید در مغزت کاری زمان بر است. صبور باش. اگر دوباره سکندری خوردی و در دام عادت بدی افتادی که مدتی بود آن را کنار گذاشته بودی، اشکالی ندارد. دوباره بلند شو، خودت را بتکن و در مسیر درست پیش برو. همه ما سکندری می خوریم. بنابراین فقط دوباره تلاشت را از سر بگیر و استراتژی دیگری را امتحان کن و تا جایی که می توانی و ثبات قدم خودت را تقویت کن. وقتی که بر راهی که می روی پافشاری کنی و ناامید نشوی، دست آخر پاداش های عظیمی نصیبت خواهد شد. حالا که صحبت از پاداش ها شد، خوب است بدانی که فصل بعدی جاییست که واقعا شروع به جدا شدن از بقیه می کنیم. جایی که تأثیر چند برابر کننده واقعا شکل می گیرد. بعد از تمام تلاش های منظمی که بر پایه اصول سفصل اول انجام دادی، حالا نوبت آن است که پاداشت را بگیری یک پاداش بزرگ اثر مرکب را به نفع خودت به کار بگیر خلاصه گام های عملی سه تا از بهترین عادت خود را مشخص کن عادت که مهمترین هدف تو را پشتیبانی می کنند سه تا از های بد خودت را هم مشخص کن. آدتهایی که تو را از مسیر رسیدن به مهمترین هدفت دور می کنند. سه تا عادت جدید مشخص کن که نیاز داری در خودت ایجاد کنی تا تو را در مسیر رسیدن به مهمترین هدفت قرار دهند. انگیزه اصلی خودت را مشخص کن. کشف کن که برای دستیابی به نتایج بزرگ چه چیزی در ابتدای راه به تو انگیزه می دهد و در ادامه مسیر پرشور و حیجان نگهت می دارد؟ نیروی چرای خود را پیدا کن هدفهای دقیق، گیرا و انگیزه بخش برای خودت تعیین کن کتاب بهترین سال عمر خود را رقم بزن فرمولی ثابت شده برای رسیدن به هدفهای بزرگ را بخر و از آن بهره بگیر تا تو را در طول پروسه تعیین اهداف. و نیز پروسه دستیابی به آن هدفها راه نمایی کند. فصل چهار تکانه آغاز حرکت تو به سوی هدف دوست دارم تو را با یکی از دوستان خیلی خوب خودم آشنا کنم. این دوست که با بیل گیتس، استیف جابز، ریچارد برانسون، مایکل جوردن، لانس آرمسترانگ، مایکل فلبس و هر آدم فوقالعاده موفق دیگری است چنان تأثیری بر زندگیت دارد که هیچ کس و هیچ چیز ندارد. مایلم تو را با تکانه یا آنطور که دوست دارم خطابش کنم تکانه بزرگ آشنا کنم. تکانه بدون تردید یکی از قدرتمندترین و اسرارآمیزترین نیروهای موفقیت است. تو نمیتوانی تکانه را ببینی یا احساس کنی، ولی وقتی به آن دست میابی، متوجه حضورش میشوی. نمیتوانی انتظار داشته باشی که تکانه در هر موقعیتی سر و کلش پیدا شود، ولی وقتی هم که خود را نشان می میدهد، وای، میتواند تو را به آسمان هفتم موفقیت پرتاب کند، وقتی که تکانه را طرف خودت داشته باشی، دیگر تقریباً محال است که کسی به به پای تو برسد. من به خاطر شروع این فصل هیجان زدم. وقتی ایده هایی را که در ادامه به طور خلاصه گفته شده به کار ببندی، پاداش نهاییت هزار برابر یا بیشتر از آنچه برای این کتاب پرداخت کرده ای خواهد بود. جدی میگویم، این ایده ها بزرگ و مهم هستند. قدرت تکانه را مهار کن اگر کلاس فیزیک دبیرستانت یادت باشد یادت هست مگر نه قانون اول نیوتون را که به قانون اینرسی هم معروف است به خاطر نیاوری اجسام ساکن تمایل به سکون دارند مگر اینکه نیروی بیرونی آنها را به حرکت وادارد و اجسام متحرک تمایل دارند به حرکتشان ادامه دهند مگر اینکه چیزی حرکت آنها را متوقف کند به بیان دیگر خوره های تلویزیون که به مبلشان چسبیدند تمایل دارند که همچنان در همان وضع بمانند. آدم های موفق یعنی کسانی که به زرباهنگ موفقیت دست یافتند هم میخواهند با همان تلاش و جدیت قبل به راهشان ادامه دهند. این افراد دست آخر به موفقیت های خیلی بیشتری دست می آبند. خلق تکانه یا همان حرکت آسان نیست ولی وقتی که این کار را کردی دیگر بنشین و تماشا کن، یادت می وقتی بچه بودی سوار آن چرخ و فلک های مستح می شدی؟ با چند تا از دوستانت جمع می شدید و به زور آن را میچرخاندید و هین چرخاندنش آواز می شروع کار کند بود. قدم اول یعنی به حرکت در آوردن چرخ و فلک ساکن همیشه سخت ترین قدم بود. باید آن را میکشیدی کشیدی و حل می دادی و تمام زورت را به کار می گرفتید. چهرت از سختی کار در هم می رفت و آه و نالت بلند میشد. یک قدم، دو قدم، سه قدم، نه، آب از تکان نمی خورد. اما بالاخره بعد از تلاشی طولانی و سخت، قادر بودی کمی سرعت به آن بدهی و همراهش بدوی. هرچند چرخ و فلک را به حرکت درآورده بودی و دوستانت داشتند با صدای بلند تشویقت می کردند ولی برای رسیدن به سرعت دلخواه باید با سرعت بیشتری میدویدی و با تمام قدرت آن را حل میدادی. و سرانجام موفق می شدی. تو روی چرخ و فلک می پریدی و به دوستانت ملحق می شدی و از برخورد باد به صورتت و تماشای دنیای اطراف که به دایره های رنگی تبدیل شده بود لذت می بردی. بعد از مدتی وقتی که سرعت چرخ و فلک دوباره شروع به کم شدن میکرد پایین میپریدی و برای ای همراه با آن میدویدی و هلش میدادی تا دوباره سرعت بگیرد. وقتی که چرخ و فلک به سرعت مناسب میرسید، تکانه زمام امور را به دست میگرفت و ادامه حرکتش را آسان میکرد. برگزیدن هر تغییری هم همینطور است. تو با برداشتن قدم های کوچک شروع میکنی. هر بار یک قدم. پیشروی آهسته است، ولی همین که عادت تازه شکل گرفتد، شروع به تأثیر گذاری کند، تکانه بزرگ به تو ملحق می شود. آنگاه موفقیتت و نتایجت به سرعت مرکب می شوند. همین اتفاق موقع پرتاب موشک فضاپیما هم می افتد. موشک فضاپیما سخت بیشتری را در طول چند دقیقه اول پروازش مصرف می کند تا بقیه سفرش. چرا؟ چون باید بر نیروی کششی جازبه زمین غلبه کند اما همین که این کار را بکند دیگر می تواند راحتی در مدار خود حرکت کند قسمت سخت ماجرا بلند شدن پیما از زمین های قدیمی تو و رفتارهای شرطی شده گذشتهت درست مثل اینرسی یا جاذبه زمین هستند همه چیز صرفا می خواهد در حالت فعلیش باقی بماند لذا انرژی زیادی نیاز داری تا اینرسی را در هم بشکنی و خود جدیدت را به حرکت درآوری. ولی به محض اینکه به تکانه مناسب برسی دیگر متوقف کردنت سخت خواهد بود تو عملا شکست ناپذیر میشوی و با آنکه حالا تلاشت خیلی کمتر شده ولی نتایجی که نصیبت می شود به مراتب بهتر و بزرگتر است. آیا تا به حال از خود پرسده ای که چرا آدم های موفق موفق تر می شوند؟ ثروتمندان ثروتمندتر می شوند، آدمهای شاد و خوشبخت، شادتر و خوشبختتر می شوند و آدمهای خوششانس، خوششانستر می شوند. آنها به تکانه دست می و بعد از آن دیگر از زمین و زمان براگشان خوبی میبارد. ولی سکه ی تکانه درو دارد، هم می به نفع تو کار کند و هم علیه تو. از آنجایی که اثر مرکب همیشه عمل میکند. اگر عادت های بدت به حال خود رها شوند، می توانند نیروی خلق کنند که تو را به قعر بحران و عواقب ناگوار میفرستد. این همان چیزی است که دوستمان برد در فصل اول تجربه کرد. با چند عادت بد کوچک 15 کیلو اضافه کرد و به دلیل تکانه منفی ناشی از آن عادت های بدش در کار و زندگی زناشویش با استرس عظیمی مواجه شد. قانون اینرسی میگوید اجسام ساکن میل به سکون دارند. این همان اثر مرکب است که علیه تو دارد عمل می کند. هرچه زمان بیشتری روی آن کاناپ بدهی و سریال های تنز تماشا کنی برایت سخت تر خواهد بود که بلند شوی و تکانی به خودت بدهی. پس بیا همین الان شروع کنیم. چطور کاری کنی تکانه بزرگ سری به تو بزند؟ باید با انجام دادن کارهایی که تا اینجا به آنها اشاره کردیم، شرایط آمدنش را فراهم کنی. این کارها عبارت بودند از 1. انتخابهای تازه کردن بر اساس هدفهایت و ارزشهای اصلیت دو به کار بستن آن انتخابها از طریق رفتارهای جدید مثبت و سازنده 3. تکرار کافی آن اقدامهای مثبت سالم برای ایجاد عادتهای جدید چهار، وارد کردن رویه ها و ریتم های رفتاری به درون کارهای روزمرد. پنج، ثابت قدم و راسخ ماندن برای مدت زمانی کافی. و بعد، بنگ. تکانه بزرگ در را با لگت باز می کند و وارد می شود. البته این چیز خوبی است و دیگر عملا هیچ چیز جلو دارد نخواهد بود. شناگر بزرگ ماکل فیلپس را ببین که در المپیک پکن 2008، به رکورد افسانه یه هشت مدال طلا دست یافت. چطور این کار را کرد؟ فلبس با تمرین کردن زیر نظر مربیش با بومن توانست در طول یک دوره دوازده ساله استعدادها و مهارتهایش را به حد اعلا برساند. آنها همراه با هم رویه ها و ریتم های رفتاری مشخصی را ایجاد کردند و ثبات قدمی را در عمل کرده شکل دادند که فلپس را برای به دست آوردن تکانه مناسب در لحظه درست یعنی بازی المپیک آماده کرد. این رابطه همزیستی فلپس و بومن از نظر دامنه و بلند و همینطور پیش بینی پذیری تمام عیارش افسانه است. وقتی نوبت تمرین میرسید رسید من چنان سببات قدمی از شاگردش میخواست که باور کردنی نبود. یکی از خاطرات فراموش نشدنی فلپس مربوط به روزی است که، بومن به او اجازه داد جلسه تمرین را فقط پانزده دقیقه زودتر تعطیل کند تا بتواند برای مراسمی که قرار بود در مدرسه اجرا کند آماده شود فقط همین یک بار در طول دوازده سال تعجبی ندارد که فلپس در استخر چنین شکست ناپذیر بود احتمالاً آیپاد داری آیا تا حالا به سیر تکامل آن ماسماسک کوچک توی جیبت فکر کرده ای؟ شرکت اپل ها قبل از عرضه آیپاد در بازار حضور داشت با آنکه کامپیوترهای مک این شرکت همیشه طرفداران پروپاقورس خودش را داشت اما باز هم فقط بخش کوچکی از بازار کامپیوترهای شخصی را به خود اختصاص داده بود آیپاد شرکت اپل مسلماً اولین امپیتری پلیر در بازار نبود اتفاقا اپل خیلی دیر وارد بازی شد و قبل از آیپاد مارکهای دیگری به بازار آمده بودند ولی شرکت اپل، فاکتورهای قدرتمندی در خدمت خود داشت که دیگران نداشتند فاکتورهایی از قبیل ثبات قدمشان در تلاش برای حفظ وفاداری مشتری، تعهد تزلزل ناپذیرشان به داشتن کیفیت بالا، طراحی نوآورانه و کاربرد راحت محصولاتشان آنها امپی تری را ساده، جذاب و راحت برای استفاده و بازی کردند و از طریق کمپین‌های تبلیغاتی مبتکرانه و جذاب به بازار عرضه کردند و صد البته جواب داد روغبایش نقره داغ شدند ولی آیپاد موفقیت یک شبه نبود در سال 2001 که شرکت اپل آیپاد را به بازار عرضه کرد از نرخ رشد درآمد سی درصدی به منفی سی درصد رسید سال بعد باز هم نرخ رشد درآمدشان منفی بود منفی دو درصد ولی سال 2003 رشد هشته درصدی را تجربه کرد و به دنبال آن، نرخ رشدش در سال 2004 به 33 درصد رسید و بالاخره در 2005 به تکانه دست یافتند. و بنگ اپل یک به نرخ رشد درامده 68 درصدی رسید و اکنون بیش از 70 درصد سهم بازار امپی را در اختیار خود دارد. همانطور که میدانی، تکانه بزرگ از آن موقع به آنها کمک کرده است تا با آیفون بازار گوشی هوشمند و با آیتیونز بازار پخش موسیقی دیجیتال را تسخیر کنند این تکانه همچنین باعث احیا و رشد بازار اصلیشان یعنی کامپیوترهای شخصی شده است حالا که تکانه بزرگ را در کنار خود دارند تعجب نخواهم کرد اگر روزی ببینم کارشان را به سایر بازارها هم توسعه دادند گوگل هم اوایل موتور جستجوی کوچکی بود که برای ماندن در عرصه رقابت تقلا کرد. اما امروزه آن هم بیش از شست در درصد سهم بازار جستجوی اینترنتی را در اختیار دارد یوتیوب فضای به گذاری ویدیو در فوریه 2005 ایجاد شد و به طور رسمی در نوامبر آن سال آغاز به کار کرد ولی اصلا وبسایت پربازدیدی نبود تا اینکه نماهنگ تنزی که به طور زنده از شبکه ان سی پخش شده بود در این وبسایت آپلود شد و مردم زیادی برای دیدنش به یوتیوب هجوم آوردند آن کلیف یوتیوب فراگیر شد و قبل از آنکه شبکه ان از یوتیوب بخواهد آن را رو از روی سایتش بردارد بیش از 5 میلیون نفر تماشایش کردند بعد از آن دیگر هیچ چیز جلودار یوتیوب نبود آنها به تکان دست یافته بودند امروز یوتیوب بیش از 60 درصد از سهم بازار اشتراک ویدیو را در اختیار دارد. انتهای ماجرا هم به اینجا ختم شد که گوگل در نهایت یک و شست و پنج بیلیون دلار به دو بنیان جوان یوتیوب داد تا تکانه آنها را از آن خود کند. مایکل فلپس، اپل، گوگل و یوتیوب چه چیز مشترکی دارند؟ آنها کارهای یکسانی را قبل از دستیابی به تکانه و بعد از آن انجام می دادند نظم و انزباتشان، رویه های معمولشان و ثبات قدمشان کلیدهایی بودند که درهای تکانه را به روی آنها گشودند. و وقتی که تکانه بزرگ به جمعشان پیوست، دیگر زمین و زمان هم جلودارشان نشد قدرت رویه های معمول برخی از بهترین هدف ها و مقصودهای ما شکست می خورند چون ما سیستم اجرایی مناسبی برایشان نداریم برای حل این مشکل نگرش ها و رفتارهای جدید تو باید درون رویه های روزانه، هفتگی و ماهانه گنجانده شوند تا زمینه برای هر گونه تغییر مثبت فراهم آید یک رویه کاری است که تو هر روز بی برو برگرد انجام می‌دهی تا سرانجام مثل مسواک زدن یا بستن کمربند ایمنی اتومبیلت عملی ناخداگاه شود. مشابه بحثمان در فصل عادتها، اگر به هر کاری که با موفقیت انجام میدهی نگاه کنی، میبینی که احتمالاً یک رویه یا روال معمول برای آن شکل داده ای. این رویه ها با غیر ارادی کردن و اثر بخش کردن اقدام ما از تنشها و فشارهای زندگی میکاهند، و موجه آرامش بیشتر ما در زندگی میشوند برای رسیدن به هدفهای جدید و شکل‌دهی دهی عادتهای تازه، لازم است که رویه های جدید خلق کنی تا هدفهایت را پشتیبانی کنند. هرچه چالش ها بزرگتر باشند، رویه های ما هم باید قاطع‌تر و دقیق تر باشند. تا حالا از خودت پرسیده ای که چرا پادگانهای آموزشی ارتش اینقدر سخت و طاقت فرسا هستند؟ جایی که کارهای کم اهمیتی مثل مرتب کردن تخت، برانداختن پوتینها یا خبردار ایستادن تبدیل به کارهایی بیش از حد مهم میشوند. شوند. دهی رویه ها به منظور آمادهسازی سربازها برای میدان نبرد موثرترین راهی است که سربازان عملکرد کارآمد، مثمر سمر و قابل اطمینان در لحظه های پرفشار و بحرانی را یاد میگیرند. این رویه های بظاهر ساده که در طول دوره آموزشی شکل می گیرند چنان دقیق هستند که تنها در عرض 8 تا 12 هفته نوجوانان نازک نارنجی، ترسو و شلخته را تبدیل به سربازان قوی، جسور و وظیفه‌شناس شناس می کنند. این رویه ها چنان خوب تمرین داده می شوند که این سربازان جوان می توانند در بحبوه نبرد به طور قریزی با دقت و ظرافت عمل کنند. چون این سطح فشرده و شدیدی از آموزش و تمرین، سربازان را برای انجام دادن وظایفشان حتی در یک قدمی مرگ آماده می کند. البته، تو در حال حاضر ممکن است اینقدر خطرناک نباشد، ولی بدون گنجاندن رویه های مناسب در برنامه پیامدهای حاصل از این قفلت می تواند سخت و غیر کنترل باشند. شکل دهی روالی از کارهای منظم روزانه قابل پیشبینی، تو را برای پیروزی در میدان نبرد زندگی آماده می کند جک نیکولاس گلفباز باز ای به خاطر رویه های پیش از ضربه هایش معروف بود او به رقصی که قبل از زدن هر ضربهی انجام می داد پای بند بود منظورم مجموعی از رویه ها یا قدم های روتین ذهنی و جسمی بود که او را برای زدن ضربه متمرکز و آماده می کردند. جک آرام, آرام به توب نزدیک می شد. چوب گلفش را با هدفش هم ختمی کرد و بعد وقتی که مطمئن می شد کاملاً آماده زدن ضربه است، پاهایش را در جای مناسب می گذاشت و به بدنش حالت خاصی می داد. سپس چندین بار چوب گلف را عقب و جلو می برد و به هدف و به چوب گلفش نگاه می کرد و دست آخر بعد از طی کردن همه این مراحل به توب ضربه می زد. روانشناسی در طول یکی از مهمترین مسابقه های گلف سال، زمان نیکولاس را محاسبه کرد از لحظه ای که چوب را از ساکش بیرون آورد تا زمانی که به توب ضربه زد و حدس بزن متوجه چه چیزی شد در هر ضربه، زمان بندی جک بیشتر از یک ثانیه با ضربه قبلی تفاوت نداشت شگفتانگیز است همین روانشناس زمان گرگ نورمن را هم در شکست تلخش در مسابقات 1996 اندازه گیری کرد نتیجه معلوم شد که با پیشرفتن مسابقه، سرعت رویه قبل از ضربه هایش مدام تغییر کرده بود. این تغییر رویه، باعث اختلال در ضرباهنگ و ثبات قدم او شد. نورمن هرگز قادر نشد که به تکانه مورد نظرش برسد. در حقیقت، لحظه ای که او رویه معمولش را عوض کرد، عمل کردش پیشبینی ناپذیر و نتایجش بی ثبات و نامنظم شدند. بازی کنان راگبی هم به رویه های پیش از ضربه هایشان اهمیت میدهند چون به آنها مجال میدهد تا با هزاران باری که در گذشته این کار را انجام داده اند هماهنگ شوند اگر این رویه های پیش از ضربه نباشد عمل تحت فشار زمان به میزان چشمگیری نزول خواهد کرد خلبانها هم چک لیست پیش از پرواز خود را به طور کامل کنترل میکنند حتی اگر قبلش هزاران ساعت گزارش پرواز پر کرده باشند و هواپیما هم با عمل بینقص از مقصد قبلی به زمین نشسته باشد. خلبان همیشه چکلیست قبل از پرواز را کنترل خواهد کرد. این کار نه فقط هواپیما را آماده می کند بلکه از آن مهمتر خلبان را هم متمرکز می کند و او را برای پرواز غریب الوقوعش آماده می کند. من با آدمهای موفق و صاحبان کسب و کارهای زیادی کار کردم و متوجه شدم که همگی آنها علاوه بر آدتهای خوب رویه های را هم برای انجام دادن کارهای منظم روزانهشان شکل دادند و این تنها راهیست که هر کدام از ما می رفتارهایمان را به طور پیشبینی پذیری تنظیم و کنترل کنیم هیچ راه دیگری وجود ندارد یک رویه روزمره که بر شالوده ی عادتهای خوب و روشهای درست استوار شده باشد، موفق افراد در میان ما را از بقیه جدا می کند. رویه های معمول، فوقلاده قدرتمند هستند. برای ایجاد رویه های مفید و موثر اول باید تصمیم بگیری که می‌خواهی چه رفتارها و عادتهایی را در وجودت نهادینه کنی. چند لحظه وقت بگذار و هدفهایت را مرور کن. و همینطور رفتارهایی که می خواهی اضافه یا کم کنی حالا نوبت توست که جک نیکولاس باشی و بهترین رویه پیش از ضربه خودت را پیدا کنی سعی کن مؤلفه‌های گذار بر این کار را بشناسی بعد از اینکه برای مثال یک رویه صبحگاهی شکل دادی می‌خواهم که تا اطلاع ثانوی هر روز صبح بدون هیچ حرف و حدیثی تمام و کمال انجامش دهی اگر هم کسی یا چیزی مانع شد دوباره از اول شروع کن تا ارادت را برای انجام دادنش قوی تر کنی. نحوه شروع و پایان روزت را خودت تعیین کن. اگر میخواهی که با تلاش هایت به سطح موفقترین آدمهای دنیا برسی، راهش این است که عملکردت را حول رویه در سطح آن افراد بنا کنی. پیشبینی یا کنترل آنچه در طول روزکاریت پیش میآید ممکن است سخت و حتی بیهوده باشد. ولی تقریبا همیشه می توانی این مسئله را کنترل کنی که روزت چطور شروع شود و چطور پایان یابد. من برای هر دوگ اینها رویه دارم. در اینجا ابعاد متفاوتی از هر کدامشان را بیان می کنم تا ایده هایی به تو بدهم و کمکت کنم قدرت و اهمیت تبدیل رفتارهای جدیدت به رویه های منظم را بهتر درک کنی. من اول هدفهایم را در ذهنم مجسم می کنم و سپس رفتارها و رویه هایم را بر اساس آن هدفها طراحی می کنم. شاید با مطالعه تعدادی از روشهایی هایی که برای من جواب دادند استراتژیهایی برای امتحان کردن بیابی. بیدار شو و زود از رخت خواب جدا شو رویه صبحگاهی من مثل آماده سازی پیش از ضربه جک نیکولاس است که مرا برای کل روز آماده می کند و از آنجایی که هر روز صبح اتفاق میافتد ملکهی ذهنم شده و دیگر لازم نیست که در موردش فکر کنم. زنگ آیفون من ساعت پنج صبح به صدا در میآید. اعتراف می کنم گاهی پنج و نیم صبح و من صدای آن را با دستم قطع می کنم. بعد میدانم که هشت دقیقه وقت دارم. چرا هشت دقیقه؟ نمیدانم از استیو جابز بپرس. او آیفون را اینطور برنامه ریزی کرده است. در طول آن هشت دقیقه سه تا کار انجام می دهم اول به تمام چیزهایی فکر می کنم که بابتشان شکر گذار هستم میدانم که باید ذهنم را برای فراوانی کوک کنم. وقتی که تو روزت را با احساس سپاس گذاری بابت چیزهایی که داری شروع می کنی نگاه، رفتار و واکنش دنیا به تو بسیار متفاوت خواهد بود. دوم کاری را انجام می دهم که شاید به نظرت کمی عجیب بیاید. هر روز برای یکی عشق می فرستم. راه گرفتن عشق، دادن عشق است و یکی از چیزهایی که من همیشه بیشترش را می عشق است. من با فکر کردن به یکی، هر کسی، چه دوست، چه خیشاوند، چه همکار و چه غریبهی در سوپرمارکت به او عشق می دهم و سپس، با تجسم تمام آن چه برایش آرزو کردم، عشق و محبتم را به سویش روانه نمی کنم. برخی شاید این کار را دعا یا نیایش بنامند، من به آن نامه عاشقانه ذهنی می گویم. سوم به هدف شماره یک خودم فکر میکنم و تصمیم میگیرم که امروز کدام سکار را برای نزدیکتر شدن به آن انجام دهم. برای مثال در زمان نوشتن این سطور هدف شماره یک من این است که عشق صمیمیت را در زندگی زناشوییم میقتر کنم. لذا هر صبح انجام سکار را برنامه ریزی می کنم تا مطمئن شوم همسرم بفهمد به او عشق میورزم، برایش احترام قائلم و در نظرم زیبا می‌آید. وقتی از خواب بیدار میشم قهوه می‌گذارم و هین دم کشیدنش حدود ده دقیقه تعدادی حرکت کششی انجام می دهم. روشی که از دکتر آز یاد گرفتم. من متوجه شدم تنها راه گنجاندن ورزش در زندگیم این است که این کار را تبدیل به یک رویه همیشگی کنم. سعی کردم بفهمم در کجای برنامه روزانم می توانم این کار را وارد کنم و بالاخره زمان دم کشیدن قهوه ام را بهترین زمان برای نرمش کردن یافتم وقتی که حرکات کششیم را انجام دادم و قهوه‌ام را در فنجانم ریختم روی صندلی راحتی چرمیم می نشینم زنگ آیفونم را برای سی دقیقه نه بیشتر و نه کمتر تنظیم می کنم و مطلبی مثبت و آموزشی می خانم. وقتی که زنگ آیفونم بلند شد، به سراغ مهمترین پروژه می روم و یک ساعت تمام با تلاشی کاملا متمرکز و با حواسی کاملا جمع روی آن کار می کنم. دقت کن که هنوز ایمیلم را باز نکردم. سپس، هر روز صبح رأس ساعت هفت کاری را انجام می دهم که خودم مرور هدفها میخوانم کاری تکرار شونده در تقویمم که طی آن هر روز پانزده دقیقه را صرف بررسی هدفهایم می کنم. در این روب ساعت به سه هدف اول یک ساله و پنج ساله خودم هدفهای کلیدی آن فصل و همچنین به هدف اولم در آن هفته و ماه می پردازم. سپس در مهمترین بخش آن سه مورد از مهمترین و با ارزشترین اولویتهای آن روزم را مرور یا تنظیم می کنم و از خودم می پرسم اگر امروز قرار بود که فقط سه تا کار را انجام دهم، کدام کارها بودند که بیشترین و بهترین نتایج را برای نزدیک شدن به هدفهای اصلیم فراهم می‌آوردند؟ و بعد و تنها بعد از آن، ایمیلم را باز می کنم و مجموعی از وظایف و معمولیتها را برای پیگیری بقیه اعضای تیمم که حالا دیگر روزشان را شروع کرده اند سپس فوراً ایمیلم را میبندم و به سراغ مهمترین و با ارزشترین اولویتهای آن روزم میروم. بقیه روزم میتواند یک میلیون شکل مختلف به خود بگیرد. ولی تا زمانی که رویه صبحگاهی خود را دنبال میکنم، قسمت اعظم کارهای منظم کلیدیم انجام میشود و من به خوبی قادرم کارهایم را در سطح بالایی انجام دهم. اگر روزم را بدون برنامه و یا از آن بدتر، با مجموعی از عادتهای بد شروع می کردم هرگز از سطحی معمولی فراتر نمی رفتم خوابهای قشنگ ببینی اصرها دوست دارم کارهایم را جمبندی کنم عادتی که از دوران کار کردنم در رستوران در ایام جوانی یاد گرفتم. در آن شغل قبل از اینکه بتوانی به خانه برویم باید همه چیز را جمع میزدیم و حساب پس میدادیم. یعنی باید تمام ها، رسید های اعتباری و پول نقدی را که از مشتری گرفته بودیم تحویل میدادیم. همه ی حساب و کتاب باید کاملا به هم میخورد و توی دردسر بزرگی می افتادیم. مهم است که روزت را جمع بندی کنی. سعی کن بفهمی آیا روزت مطابق با برنامه‌ای که ریخته بودی پیشرفت است یا نه. آیا کاری از امروزت مانده که مجبوری به برنامه فردایت منتقل کنی؟ بر اساس اتفاق‌های امروزت، چه کار دیگری باید به فردایت اضافه شود؟ چه کاری دیگر مهم نیست و باید از برنامه حسوش کنی؟ من ابزون برین دوست دارم هر ایده، هر بینش یا هر استراتژی جدیدی را که در طول روز کسب کردم در دفتر یادداشت روزانهام بنویسم. از همین راه، تا حالا بیش از چهل دفتر یادداشت از ایدهها، بینش‌ها و استراتژی‌های خارق‌الادت جمع‌آوری کردم. و بالاخره اینکه قبل از رفتن به رخت خواب دوست دارم حداقل ده صفحه از متنی ادام بخش را بخوانم. میدانم که مغز انسان به پردازش آخرین اطلاعاتی که قبل از خواب دریافت کرده ادامه می‌دهد. بنابراین، می توجهم را فقط و فقط روی چیزی سازنده و مفید برای هدفها و خواسته هایم متمرکز کنم. روش من همین است و بس. حتی اگر در طول روز قیامت هم به شود، چون شروع و پایانش در اختیارم است، می‌دانم که همیشه روزم را با قدرت شروع خواهم کرد و با قدرت هم به پایان خواهم رساند. رویه معمولت را برهم بزن هر از گاهی دوست دارم رویه های معمولم را برهم بزنم. در غیر این صورت زندگی راکت و ملالا آور می شود و من هم فسیل. یک مثال ساده کار کردن با وزن است. وقتی که هفته های متمادی در زمانی یکسان و به روشی تکراری ورزش می کنم بدنم دیگر نتایج مراکب نشان نمی دهد. من بیدل و دماغ می شوم. را از دست می دهم. و خبری از تکانه بزرگ هم نیست لذا مهم است که هر از گاهی رویه معمولت را به هم بزنی خود را با شیوه های جدید به چالش بکشی و به تجربات صفای تازهی بدهی من در حال حاضر دارم روی افزودن ماجراجویی بیشتر به زندگیم کار میکنم برای این منظور هدفهای هفتگی، ماهیانه و سالانهی برای انجام دادن کارهایی تعیین کردم که در حالت عادی انجامشان نمیدهم کارهای عجیب و غریبی هم نیستند. صرفاً چیزهای ای مثل خوردن غذاهای متفاوت، ثبت نام در کلاسی جدید، بازدید از مکانی تازه یا پیوستن به یک انجمن برای آشنایی با آدمهای جدید. این تغییرهای کوچک به من احساس سرزندگی می دهند. شور و شوق زندگی را از نو در وجودم شعله ور می کنند و فرصتهایی را برای آشنایی با چشمندازهای تازه در اختیارم می گذارند. تراریه های خودت نگاه کن اگر کاری که قبلا با شور و شوق انجام میدادی در نظرت به همان کار همیشگی تبدیل شده است یا دیگر نتایج قدرتمندی برایت به بار نمی آورد، متوقفش کن رسیدن به زرباهنگی ثابت روال جدید زندگی خود را پیدا کن وقتی که رفتارهای منظم روزانه تبدیل به رویه شد باید از توالی آن قدم ها برای خلق یک ریتم یا زرباهنگ رفتاری استفاده کنید وقتی که رفتارها و اقدامهای منظمت تبدیل به یک ریتم منظم هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه شود مثل این است که برای ورود تکانه بزرگ فرش قرمز جلوی خانت پهن کرده ای. این مسئله مثل به حرکت در آمدن چرخهای قطار است. وقتی قطار ثابت است، ممانعت از حرکت به جلوی آن زحمت زیادی نمی برد. گذاشتن یک تکه چوب کوچک زیر چرخ جلویش کفایت می کند. مقدار قابل توجهی انرژی لازم است تا پیستونها به حرکت در و موجب مجموعی از اتصالات شوند که در نهایت چرخها را آهسته آهسته به حرکت درآورند. ولی به محض اینکه قطار راه افتاد، چرخها به یک ریتم می رسند. اگر فشار ثابت بماند، قطار به تکانه دست پیدا می کند و بعد بنشین و تماشا کن. این قطار که حالا با سرعت 55 و پنج مایل در ساعت حرکت می کند، می میتواند از دیوار بتونی آرم فلزی یکونی متری رد شود و ویرانش کند و به راهش ادامه بدهد. تجسم موفقیتت به شکل قطاری غیرقابل قابل توقف میتواند کمکت کند در رسیدن به ریتم رفتاریت پرشور و مشتاق باقی بمانی. وقتی که اقدامها و رفتارهایت ریتم منظمی را شکل دادند به استقبال تکانه بزرگ میروی من در کنار ریتم های رفتاری روزانم، برای هفته ها و ماه های پیش روهم برنامه ریزی می‌کنم. برای مثال، در بازبینی هدف امیغ کردن اشق و سمیمیت در زندگی زن وشوییم یک برنامه منظم هفتگی، ماهانه و فصلی تر راهی کردم. چندان رومانتیک به نظر نمی‌رسد. میدانم ولی حتما متوجه شده ای که اگر کاری در تقویمت گنجانده نشود، اغلب انجام نمی شود. حتی اگر اولویت خیلی زیادی برای تو داشته باشد. چرا؟ چون انجام بی مقدمه آن کار با برنامه های روتین تو تداخل پیدا می کند و ریتم زندگیت را به هم می ریزد. برنامه ای که ریخته‌ام از این قرار است. هر جمعه شب شب قرار عاشقانه است و من و جورجیا با هم بیرون می‌رویم یا کار خاصی انجام می دهیم. ساعت شش بعد از ظهر زنگ آیفون های هر دوی ما به صدا در میآید و این یعنی شروع قرار شبانه ی عاشقانه ایمان. مهم هم نیست که داشتیم چه کاری انجام میدادیم. هر یک شنبه رخ است. یعنی روز خانواده که معنایش کار ممنوع است. در واقع از غروب آفتاب جمعه تا طلوع آفتاب صبح یک زمانی است که ما به زندگی زناشویی و خانواده ایمان اختصاص می دهیم. اگر این مرزها را نگذاری، کار امروز معمولا به فرداهایی که هرگز نمی آیند مکول می شود و متاسفانه در این میان آدمهایی به گوش رانده می شوند که اغلب مهمترین آدمهای زندگیمان هستند. همچنین ساعت شش بعد از ظهر هر یک شنبه برنامه میمره داریم یعنی مرور رابطه مشترکمان. این روشی است که من از متخصصان رابطه مشترک لیندا و ریچارد ایر در طول مساهبه ای آموختم که با آنها برای مجموعه صوتی موفقیت در اکتبر 2009 انجام دادم. در این برنامه میمره، پیروزی ها و شکست های هفته گذشته من را بررسی می کنیم. همینطور هم تغییرات و اصلاحاتی که برای بهتر شدن باید در رابطهمان بدهیم. ما گفتگوهایمان را با تعریف و قدردانی از کارهای خوب طرف مقابل در طول هفته گذشته شروع میکنیم. خیلی مفید است که حرفگتان را با نکات خوب شروع کنید. سپس با به کارگیری ایده ای که از مصاحبهم با جک کانفیلد دیاد گرفتم از یکدیگر می پرسیم. از یک تا ده به رابطهمان در این هفته چه امتیازی می دهی؟ ده بهترین است. این سوال بحث را به سمت پیروزی ها و شکست هایمان های میبرد. وای! خدای من. بعد با پرسیدن این سوال درباره تغییرات و اصلاحاتی صحبت میکنیم که باید در رابطهمان ایجاد کنیم. برای اینکه امتیازمان ده شود، چه کارهایی باید بکنیم؟ به پایان بحث که برسیم، هر دو این احساس را داریم که حرفهایمان شنیده و بررسی شدند و ملاحظات و خواسته برای هفته جدید کاملا روشن شدند. واقعا پروسه فعلاده است. قویان انجام دادنش را توصیه می کنم. البته اگر دل و جراتش را داری. به علاوه، هر ماه من و جورجیا انجام دادن کاری بی نظیر به یاد ماندنی را برنامه ریزی می کنیم. جیمران به من یاد داد که زندگی چیزی نیست غیر از مجموعه ای از تجربه ها. برای همین، هدف ما باید افزایش تعداد و بزرگی تجربه های خوب باشد. ما ماهی یک بار سعی می کنیم کاری را انجام دهیم که تجربه ای یاد ماندنی را برای من رقم بزند. این کار می تواند رفتن به کوهستان باشد یا گردشی ماجراجویانه. یا رفتن با اتومبیل به شهری مجاور برای امتحان یک رستوران شیک جدید یا قایق کردن در خلیج خلاصه هر کاری خارج از روال معمول که تجربه ناب و فراموش نشدنی برای من خلق کند به علاوه هر فصل برنامه گریز دو سه روزهی میریزیم من دوست دارم یک مرور فصلی بر تمام هدفها و الگوهای زندگی هم داشته باشم و این سفرهای کوتاه فرصتی عالی هستند برای بررسی امیختر رابطهمان در ضمن هر سال در ایام تعطیلات سال نو به سفر طولانی مدتی می رویم همانطور که می ما همه اینها را در برنامه زندگی خود گنجانده ایم. و دیگر لازم نیست درباره کارهایی که باید انجام دهیم فکر کنیم همه چیز به روال خود اتفاق می‌افتد. ما ریت می خلق کرده ایم که به ما تکانه می دهد. سبت کردن ریتم خود اکنون می خواهم چیزی را با تو در میان بگذارم که خودم تراحیش کردم و در ردگیری و ثبت ریتم رفتارهای جدیدم به من کمک می کند. من آن را برگه ثبت ریتم رفتارهای هفتگی خود میخوانم و فکر می آن را بی نهایت مفید خواهی یافت اگر می خواهی آب بیشتری بنوشی یا هر روز بیشتر از روز قبل پیاده روی کنی یا از همسرت مهربانانه تر قدردانی کنی، خلاصه هر رفتاری که به نظرت برای پیشرفتن به سوی هدفت به آن نیاز داری، باید آن را ردگیری و ثبت کنی تا مطمئن شوی که یک ریتم رفتاری ایجاد می کنی. ثبت ریتم رفتارهای هفتگی به همراه پروسگ هفتگی برنامه ریزی کردن، انجام دادن، مرور کردن و اصلاح کردن، بخشی بنیادی از سیستم مدیریت موفقیت، برای رقم زدن بهترین سال عمر خود است. تعهد یعنی انجام دادن آن چیزی که گفته ای قرار است انجام دهی، مدت‌ها بعد از اینکه از حال و هوای انجام دادنش بیرون آمدی. ریتم درست زندگی وقتی که آدم ها دست به کار جدیدی میزنند تقریبا همیشه در آن زیاد روی می کنند. البته خیلی خوب است که در مورد ایجاد یک ریتم رفتاری برای رسیدن به موفقیت هیجان زده باشی، ولی باید برنامه بریزی که در بلند مدت بدون هیچ عضر و بحانه و چانهزنی کامل و درست انجامش دهی. در اینجا منظورم فقط برنامهای برای این هفته یا این ماه یا حتی 90 روز آتی نیست میخواهم به چیزهایی فکر کنی که باید تا آخر عمرت انجام دهی اثر مرکب یعنی همان نتایج مثبتی که میخواهی در زندگیت تجربه کنی حاصل انتخاب و کارهای هوشمندانه است که در گذر زمان به طور مداوم تکرار می شوند وقتی که روز و شب قدم های درست برداری در نهایت موفق میشوی ولی وقتی کارهایی را انجام می‌دهی که هم فراتر از توانت هست و هم خیلی زودتر از موعد مقرر انجام می‌شوند، مقدمه شکست خود را فراهم می‌آوری. یکی از دوستانم در تیم مجله موفقیت با نام مستعار داستانش را خواهم گفت بعد از دیدن عکسی از خودش که در توییتر به اشتراک گذاشتم، تصمیم گرفت که رژیم بگیرد و خودش را لاغر کند. این تصمیم معنایش تغییر بزرگی در سبک زندگی او بود. چون سر کار حد اقل ده دوازده ساعت روی صندلی می نشست و از ورزش کردن هم متنفر بود. حتی یک بار گفته بود ترفندهایی را پیدا می کند که نخواهد برای برداشتن چیزی از سر جایش بلند شود یا خم راست شود. اینقدر از فعالیت جسمانی متنفر بود. با این حال همین آدم مسمم شد که هیکلش را درست کند. او در باشگاهی ورزشی ثبت نام کرد، مربی خصوصی گرفت و دو ساعت در روز پنج روز در هفته شروع به ورزش کرد گفتم ریچارد کارت اشتباه است بگذار ریچارد صدایش کنیم تو نمیتوانی این راه را تا آخرش ادامه بدهی و بالاخره ولش میکنی داری با دست خودت شکستت را رقم میزنی ولی او گوشش به این حرفها بدهکار نبود و قاطعانه به من گفت که دیگر آن آدم سابق نیست و برای همیشه تغییر کرده است حتی مربیش هم تمرین و فشار بیشتری را به او توصیه کرده بود. او گفت من تا ته این ماجرا می میخواهم می خواهم از های شکمم را ببینم. من از او پرسیدم. ریچارد، هدف اصلی تو از این کار چیست؟ می دانستم به دنبال این نیست که عکسش روی جلد مجله پرورش اندام بیاید. او به من گفت می خواهم خوبی داشته باشم. پرسیدم چرا؟ او جواب داد می خواهم زنده و تندرست و شاداب باشم. میخواهم آنقدر عمر کنم که نوه هایم را ببینم. اینها انگیزه های واقعی و معنیدار او بودند. هدف ریچارد کوتاه مدت نبود. میخواست تا زمانی که زنده است با حفظ اندامی مناسب سالم و شاد بماند. من گفتم بسیار خوب، متقاعدم کردی، ولی داری در این کار زیاده روی میکنی. دو سه ماه که گذشت میگویی امروز وقت ندارم دو ساعت بروم باشگاه. به گمانم امروز خبری از ورزش نیست. این اتفاق بارها و بارها برای تو خواهد افتاد. پنج روز ورزش کردن در هفته تبدیل به دو یا سه روز می شود و تو بی انگیزه و دل سرد خواهی شد. خیلی زود بی خیال همه چیز می شوی. میفهمم که الان واقعا هیجان زده ای ولی بیا این کار را بکن. فعلا همون دو ساعت در روز پنج روز در هفته ورزش کن ولی بیشتر از 60 تا 90 روز این کار را نکن. انرژی زیادی برای غلبه بر اینرسی و حرکت کردن چرخال لازم است. یادت که هست بعدش می خواهم که آن را به یک ساعت یا یک ساعت و روب کاهش دهی هنوز هم می توانی پنج روز در هفته ورزش کنی ولی بهتر از چهار روزش کنی این روند را شست تا نوت روز دیگر ادامه بده بعد از تو می برنامه را به سه روز ورزش یک ساعت در هفته تغییر دهی یا اگر خیلی انرژی و انگیزه داری چهار روز این برنامه است که می طبق آن بروی چون اگر کاری را شروع کنی که نتوانی ادامه دهی، هیچ وقت تمامش نمی کنی. راستش خودم را کشتم تا بالاخره موفق شدم این مسئله را به ریچارد حالی کنم. چون در آن زمان تنش حسابی داغ بود. فکر می کرد که تا آخر عمر میتواند به این رویه جدیدش ادامه بدهد. برای کسی که در عمرش یک دقیقه ورزش نکرده بود، دو ساعت در روز پنج روز در هفته برای شروع قطعا به بمبست ختم می شود. تو باید برنامهای بریزی که به توانی پنجاه سال انجامش دهی. نه پنج هفته یا پنج ماه. خوب است که اولش با شور و انرژی پیش بروی. ولی یادت باشد که آخرش را هم ببینی وگرنه نه کم کم سست می و دست آخر هم قیدش را می زنی. پیدا کردن چند تا و پنج دقیقه یا یک ساعت در هفته کار راحتی است. ولی دو ساعت پنج روز در هفته؟ نه، در دراز مدت هرگز جواب نمیدهد و به رویه معمول زندگیت تبدیل نمی شود. یادت باشد، سبات قدم و پایداری یکی از مهمترین های موفقیت است. قدرت ثبات قدم گفتم که اگر فقط یک ویژگی باشد که به من مزیت رقابتی بدهد چیزی نیست غیر از توانایی من در ثبات قدم و پایداری داشتن هیچ چیزی سریعتر و قاطعانه تر از فقدان ثبات قدم تکانه بزرگ را نمی کشد. وقتی پای ثبات قدم و استقامت به میان میآید، حتی آدم خوب، پرشور و بلند هم که نیت خوبی در سر دارند، ممکن است کم بیاورند، ولی ثبات قدم، ابزار قدرتمندی است که می توانی برای حرکت به سوی هدفهایت از آن استفاده کنی. به این چشم نگاهش کن. اگر من و تو بخواهیم با هواپیما از آنجلس به منحتن پرواز کنیم، ولی تو در هر فرودگاه بین این مسیر مدام پیاده و سوار شوی، در حالی که من مستقیم به سوی مقصدم پرواز میکنم، در نهایت من با اختلاف زمان فاحشی زودتر از تو به مقصد میرسم. حتی اگر تو با سرعت 500 مایل بر ساعت پرواز کنی و من فقط با سرعت 200 مایل بر ساعت، زمان و انرژی که از تو صرف میشود تا مدام بیستی و بعد دوباره شروع کنی و شتاب بگیری، زمان سفر تو را حداقل ده برابر طولانی تر از سفر من میکند. در حقیقت، به احتمال زیاد حتی به مقصد نهاییت هم نخواهی رسید چون سوختت یعنی انرژی، انگیزه، باور و ارادت بالاخره در جایی تمام می شود به مراتب راحت تر است و انرژی کمتری می برد اگر فقط یک بار از روی باند بلند شوی و در تمام طول مسیر با سرعتی معمولی حتی آهسته تر از اکثر آدمهای دیگر پیش بروی دستی چاه آب. اگر فکر کمکاری در رویه ها و ریتم‌های های رفتاریت به سرت زد، اول به بهای گذافی فکر کن که بابت عدم ثبات قدمت پرداخت خواهی کرد. یادت باشد، قضیه فقط رها کردن کار و نتایج کوچک متاقبش نیست. قضیه سقوط کامل و از دست دادن تکانه است که کل پیشروی تو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به چاه آبی فکر کن که آب آن را با تلمبه دستی از چند متر زیر زمین بالا میکشی. باید چندین بار پشت سر هم و به شدت تلمبه بزنی تا مکش لازم برای بالا کشیدن آب از ته چاه و بیرون آمدنش از دهانه گلوله فراهم آید. ثبات قدم کلید دستیابی به تکانه و حفظ آن است. اکثر آدم ها وقتی تلاشی را آغاز می کنند دسته را میگیرند و با تمام توان شروع به تلمبه زدن می کنند. آنها هیجان زده هستند و مصمم به ادامه کار. درست مثل حال و هوای ریچارد در ابتدای برنامه ی تناسب اندامش. آنها تلمبه می زنند و تلمبه می زنند و تلمبه می زنند. ولی بعد از چند دقیقه یا چند هفته وقتی که هیچ آبی یعنی نتیجه ای نمی بینند، به یک بار دست از تلمبه زدن میکشند. آنها متوجه نیستند که ایجاد خلع لازم برای مکش آب به درون لوله و در نهایت فوران آن به داخل سطل زمان می‌برد. درست مثل چرخ و فلک مسطح، موشک فضاپیما و لوکوموتیوی که از اینرسی رها می شوند، کردن آب به بالا هم زمان، انرژی زیاد و ثبات قدم لازم دارد. خیلی ها دست می‌کشند، ولی آدم عاقل به طلوم زدن ادامه می دهند. آنهایی که استقامت به خرج می دهند و به طلوم زدن ادامه می دهند، دست آخر چند قطره آب نصیبشان می شود. خیلیها با دیدن این صحنه می گویند، شوخیت گرفته، این همه طلوم زدن برای چه؟ فقط چند قطر آب ناقابل؟ بابا بیخیال خیال. تسلیم می و دست از تلاش می کشند، ولی آدم های باز هم پافشاری می کنند، و اینجاست که جادو اتفاق می افتد. اگر به پمبه زدن ادامه دهی خیلی طول نمیکشد کشد که جریان قوی و مستمر آب از دهانه لوله جاری می شود. بالاخره موفق میشوی. حالا که آب جاری شده دیگر لازم نیست به سختی یا به سرعت قبل پمبه بزنی. در واقع از این به بعد زحمت زیادی در کار نیست. برای ثابت نگه داشتن فشار جریان آب فقط کافی است آهسته و پیوسته پمبه بزنی. این همان اثر مرکب است. حال اگر دسته را مدتی طولانی به حال خودش رها کنی چه اتفاقی می افتد مسلما آب دوباره به درون چاه برمیگردد و تو هم برمیگردی به سر جای اولت روز از نو روزی از نو حالا دیگر اگر آهسته و پیوسته تلمبه بزنی آبی نصیبت نمی شود تکانه از دست رفته و آب به ته چاه برگشته است تنها راه برگرداندن آب به بالا این است که دوباره از اول به شدت و با سرعت تلمبه بزنید. این وصف حال و روز اکثر ماه است. ما زندگی هایمان را به همین شکل پیش میبریم. بریم. مثلا کس و کار جدیدی راه می اندازیم. ولی بعد از مدتی دست از آن تلاش سخت اولیه بر می داریم و سرگرم مسافرت و تفریح و خوشگذرانی می شویم. یا مثلا تصمیم میگیریم گیریم که به طور مرتب هر روز با ده مشتری بالقوه تماس بگیریم. به کمی موفقیت می رسیم و بعد خسته می شویم و به روال همیشگیمان گیمان بر می گردیم. ما برای شروع قرار شبانه ی, عاشقانه ی خود با همسرمان سر از پا نمی شناسیم. ولی چند هفته نگذشته دوباره جمعه شبها بر می گردیم به سراغ لم دادن روی کاناپه و تماشای فیلم و سریال و خوردن تنقلات. آدم هایی را می بینم که کتاب جدیدی می خرند برای برنامه یا سمینار جدیدی ثبت نام می‌کنند و به مدت چند هفته یا چند ماه دیوانوار به آن می‌پردازند و بعد دست می‌کشند و برمیگردند درست به همان جایی که شروع کرده بودند این داستان به نظر آشنا میآید فقط دو هفته دست از کاری که داری انجام می‌دهی بکش مثلا رفتن به باشگاه ورزشی ابراز محبت به همسرت یا تماس‌های تلفنی که بخشی از رویه مشتریابی هستند خواهی دید که فقط نتایج حاصل از آن دو هفته را از دست نمی دهی. راستش اگر همه آنچه از دست می دادی همان دو هفته بود، آنطور که اکثر آدم ها خیال می کنند، زیادی نمی کردی. ولی با متوقف کردن روند خود، حتی برای یک مدت کوتاه تکانه را می کشی. و نابودی تکانه یعنی فاجعه. برای بردن مسابقه فقط و فقط حفظ حرکت مهم است. لاک پشت باش. همان کسی که وقتی زمانی کافی در اختیار داشته باشد با حفظ ثبات قدم در آدتها و رفتارهای مثبتش دست آخر هر رقیبی را شکست می دهد. این کار قدرتی جادویی به تکانه تو می دهد و آن را حفظ می کند. انتخاب درست کردن رفتار درست در پیش گرفتن آدتهای عالی را تمرین کردن ثابت قدم ماندن و حفظ کردن تکانه همه اینها در حرف آسانترند تا در عمل مخصوصاً در دنیای مدام در حال تغییر و چالش برانگیز امروزی که با میلیاردها آدم دیگر سهیم هستیم در فصل بعد به عوامل تأثیرگزاری خواهم پرداخت که عمدتا بی آنکه خودت بدانی می توانند به موفق شدن ات کمک کنند یا مانعش شوند این عوامل تاثیرگذار فراگیر ترقیب کننده و دائمی هستند اگر یاد نگیری که چطور از آنها به نفع خودت استفاده کنی، در نهایت تو را زمین میزنند. بگذار نشانت دهم چطوری. اثر مرکب را به نفع خودت بکار بگیر خلاصه گامهای عملی روی های صبحگاهی و شامگاهی برای خودت شکل بده. برنامه منظم و همیشگی مشابه با برنامه های, آدم های موفق دنیا در پیش بگیر که هم مشخص و پیش پذیر باشد و هم مطمئن. سه حوزه از زندگیت را که در آنها به قدر کافی ثابت قدم نیستی یادداشت کن. این عدم ثبات قدم تا اینجا چقدر در زندگی برایت هزینه به بار است. به خودت و به بقیه اعلام کن که از این به بعد نمیگذاری خلالی در ثبات قدمت ایجاد شود. تعدادی از رفتارهای کلیدی مرتبط با هدفهای جدیدت را بنویس. باید رفتارهایی باشند که میخواهی با آنها ریتمی به زندگیت بدهی و در نهایت تکانه بزرگ را خلق کنی. فصل پنج آملهای تأثیر بیرونی امیدوارم که تا اینجا دیگر دقیقاً متوجه شده باشی که انتخابهای تو چقدر مهم هستند. حتی آنهایی هم که به نظر کم اهمیت می آیند، وقتی که مرکب شوند، می توانند تأثیر عظیمی روی زندگیت بگذارند. همچنین گفتیم که تو مسئول صد درصدی زندگیت هستی، تو به تنهایی مسئول هایی که میکنی و هایی که انجام میدهی هستی. با این حال باید این را بدانی که انتخابها، رفتارها و های تو تحت تأثیر عوامل بیرونی بسیار قدرتمند هم هستند. اکثر ما از کنترل ظریف و نامحسوسی که این نیروها بر زندگی زندگیمان دارند بیخبریم. برای اینکه بتوانی مسیر مثبتت را به سوی هایت حفظ کنی، باید این تأثیرها را درک کنی. و کنترلشان را در دست بگیری تا در سفرت به سوی موفقیت پشتیبانت باشند نه اینکه تو را از جاده موفقیت منحرف کنند همه آدم ها تحت تأثیر سه عامل هستند ورودیها یعنی آنچه به ذهنت میخورانی معاشران یعنی آدم هایی که با آنها زمانت را سپری میکنی و محیط یعنی فضای پیرامونت یک ورودی ها آشغال وارد شود آشغال خارج می شود اگر می خواهی که بدنت بهترین عملکرد خود را داشته باشد باید مراقب باشی که مواد غذایی درجه یک مصرف کنی و تسلیم وسوسه خوردن هله ها نشوی اگر می خواهی که مغزت بهترین عملکرد خود را داشته باشد باید در مورد آنچه به خوردش می دهی از این هم بیشتر مراقب باشی آیا خلاصه ای اخبار و سریال های تنظ کننده ذهن به آنها میخورانی؟ آیا مجلات زرد میخوانی یا مجله موفقیت کنترل کردن ورودی ها، تأثیر مستقیم و قابل توجهی روی بازدهی تو و نتایجت خواهند داشت. البته کنترل آنچه که مغزمان مصرف می کند؟ واقعا کار سختی است چون قسمت اعظم آنچه به خوردش می دهیم ناخداگاه است. در مورد بدن چنین نیست؟ درست است که میتوانیم بدون فکر کردن غذا بخوریم. اما قادریم مراقب آنچه به بدنمان وارد می کنیم باشیم. آخر غذا که خودش توی دهان ما نمی پرد. در مورد آنچه به مغزمان خورانیم به سطح بالاتری از هوشیاری و دقت نیاز داریم تا مانع از این شویم که مغزمان ورودی های بی ربط و مخرب را جذب کند. این نبردی بی پایان است بین تو و هر نوع اطلاعاتی که می توانند نیروی خلاقیتت را منحرف حرف کنند. بنابراین باید تا جایی که میتوانی مراقب باشی و اجازه ورود هر چیزی را به مغزت ندهی. مغز تو برای خوشحال کردن طراحی نشده است بلکه فقط یک دستور کار دارد. بقا مغزت همیشه به دنبال علائم کم بود و حمله است. به عبارت دیگر برای جستجوی منفی ها برنامه ریزی شده است. چیزهایی از قبیل منابع به کاهش آلودگی هوا خلاصه هر آنچه آن بیرون برای آسیب زدن به تو وجود دارد. بنابراین وقتی در راه رفتن به سر کار رادیو را روشن می کنی و توسط تمام آن گزارش های مربوط به سرقتها، آتش ترورها، اقتصاد خراب و غیره بمباران می شوی مغزت به کار می افتد. و حالا تمام طول روز را صرف خوردن غذاهای آن زیافت ترس، نگرانی و منفی نگری می کند. همینطور است وقتی که بعد از کار اخبار شبانگاهی را می‌گیری، باز هم اخبار بد بیشتر؟ آلیست. مغزت تمام طول شب مشغول آن خواهد بود. اگر مغزت به حال خودش گذاشته شود، روز و شب در کار منفی بینی، نگرانی و وحشت هست. البته ما نمی توانیم دی ای خودمان را عوض کنیم، ولی می‌توانیم رفتارمان را عوض کنیم. می‌توانیم به مغزمان بیاموزیم، که به فراتر از کم و حمله نگاه کند. چطوری؟ با تغذیه سالم مغزمان و محافظت از آن. ما می توانیم در مورد آنچه اجازه ورودش را به مغزمان میدهیم دهیم، سخت گیرتر باشیم. آب کثیف ننوش. تو چیزی را در زندگی به دست می آوری که خودت خلقش می کنی. انتظارات فرایند خلاقیت را به کار میاندازند. تو انتظار چه چیزی را داری؟ انتظار آن چیزی را داری که دربارهش فکر می کنی. پروسه فکر کردنت یعنی همان گفتگوی درون ذهنت شالوده نتایجی است که در زندگی خلق می کنی. بنابراین سوال این است که، داری در مورد چه چیزی فکر می کنی؟ چه چیزی دارد روی افکارت تاأثیر میگذارد و آنها را هدایت می کند؟ پاسخ: هر آنچه که به خودت اجازه می دهی، بشنوی و ببینی؟ این همان ورودی است که مغزت را با آن تغذیه می کنی؟ افکار منفی یا آب کثیف را با افکار مثبت، الهام بخش و حمایت کننده یا آب تمیز جایگزین کن ذهن تو مثل لیوانی خالی است. هر را که در آن بریزی در خود جای می دهد. اگر اخبار مهیج، تیترهای جنجالی یا وجوییهای میزگردهای تلویزیونی را در آن بریزی، داری لیوانت را با آب کسیف پر می کنی. اگر آب سیاه و لجنالود درون لیوانت بریزی، هر چیزی که خلق کنی از میان آن کسافت عبور خواهد کرد. چون این چیزی است که داری در موردش فکر می کنی. اگر آشغال وارد شود، آشغال هم خارج می شود. تمام آن وراجی های در مورد قتلها، توتعه ها، ها، اقتصاد خراب و اعتراضات سیاسی که هین رانندگی به آنها گوش می دهی، فراگند فکر کردن تو را هدایت می کنند و روی انتظارات و خروجی خلاقیتت اثر منفی می گذارند. این خبر بدی است، ولی درست مثل یک لیوان کسیف اگر به مدت کافی آن را زیر شیر آب تمیز بشویی دست آخر لیوان پاک و تمیزی خواهی داشت. آن آب تمیز چیست؟ ورودی ها و ایده مثبت الهام بخش و حمایت کننده از قبیله داستان های الهام بخش، آدمهایی که عل رغم چالشها بر مشکلات قلبه کردند و به هدف های بزرگ دست یافتند. استراتژی‌های موفقیت، رفاه و آسایش، سلامتی، عشق و شادی، ایده هایی برای خلق فراوانی بیشتر، رشد کردن، شکوفا شدن و بیشتر شدن و مثال ها و داستان هایی در مورد آنچه در این جهان خوب، درست و امکان پذیر است. اصلا دلیل تلاش شبانه روزی ما در مجله موفقیت هم همین است. می خواهیم آن مثال ها، آن داستان ها، و آن استراتژی های کلیدی را در اختیار تو بگذاریم تا با استفاده از آنها نگاهت را به دنیا به خودت و به نتایجی که خلق می کنی، بهتر کنی. به همین دلیل هم هست که من صبحها و اصرها به مدت سی دقیقه مطلبی الهام بخش و آموزشی میخوانم و در اتومبیلم به سیدی های رشد فردی گوش می دهم. من لیوانم را با آب تمیز میشویم و به مغزم غذای خوب می دهم. آیا این کار به من مزیتی نسبت به کسی می‌دهد؟ که به محض بلند شدن از خواب اول از همه روزنامه می در مسیر رفت و برگشت به سر کار و خانه به اخبار رادیو گوش می دهد و قبل از رفتن به رخت خواب اخبار شبانگاهی تماشا می کند مطمئن باش که می دهد می تواند به تو بدهد قدم یک مراقب باش تو خواه نخواه آب کسیف را در لیوانت می ریزی مگر اینکه تصمیم بگیری در غار یا جزیره متروکه ای زندگی کنی. آب کثیف همه جا هست. روی بیلبوردها، در برنامه های, شبکه های خبری، توی سالون های انتظار فرودگاه در تیترهای جنجالی نشریههای زرد کنار صندوق فروشگاه ها و خیلی جاهای دیگر. حتی دوستانت، اعضای خانوادهت و افکار منفی خودت می توانند آب کثیف را به درون لیوانت سرازیر کنند. ولی معنایش این نیست که نمیتوانی برای قرار نگرفتن در معرض آن شرک و کثافت‌ها قدمی برداری. قبول. شاید نتوانی از دیدن نشریه های زرد کنار صندوق فروشگاه اجتناب کنی. ولی میتوانی اشتراک خود را با چنین هایی لغو کنی. میتوانی از گوش دادن به رادیو در مسیر رفت و برگشت به محل کار و خانه اجتناب کنی و در عوض سیدی آموزشی و الهام بخشی گوش دهی. می توانی اخبار شبانگاهی را خاموش کنی و در عوض با عزیزانت صحبت کنی. می توانی یک دستگاه دیویار بخری و فقط آن برنامه های را ضبط کنی که احساس می کنی واقعا آموزشی و مثبت و روحی بخش هستند. و صد البته می توانی پیام های بازرگانی بین آنها را جلو بزنی و نبینی. همان پیام هایی که هدفشان این است که احساس کم و فقر کنی. مگر اینکه به قول خودشان آشغالهای تبلیغ شده یا آنها را بخری. من حقیقتا با تلویزیون بزرگ نشدم. البته یادم می آید که فیلم موزیکال و تنز تماشا می کردم. حتما تو هم بعضی از آن فیلم دوران کودکیت را به یاد داری، مگر نه. ولی در کل تلویزیون بخش مهمی از زندگی خانوادگی ما نبود. من به نوعی توانستم بدون آن بزرگ شوم. همین مسئله باعث شده حالا وقتی که هر از گاهی برنامهی را میبینم دیدگاه روشنتری در مورد پیامی که میخواهد به من منتقل کند داشته باشم البته من هم با سریال کمدی میخندم ولی بعدش همان احساسی را دارم که بعد از خوردن فست فود پیدا میکنم احساس خوردن غذایی آشغال و نفخاور در زمن نمیتوانم چشمم را روی این مسئله مهم ببندم که های تلویزیونی چطور از روانشناسی ما؟ ترس دردهایمان، درد نیازهایمان و نقاط ضعفمان برای بدامانداشتن ما استفاده می کنند. اگر شب و روز در این فکر باشم که آنچه دارم کم است، اینکه باید حتما فلان و بهمان چیز را بخرم تا خوب باشم، چطور می توانم انتظار داشته باشم که نتایج شگفتانگیزی برای خودم رقم بزنم؟ طبق بررسی ها، آمریکایی های دوازده سال به بالا حدود 1704 ساعت در سال تلویزیون تماشا می کنند. این یعنی به طور متوسط چهار و 7 دهم ده ساعت در روز. ما تقریبا سی درصد از زمان بیداری من را به تماشای تلویزیون می گذرانیم. تقریباً سی و ساعت در هفته. یعنی هر هفته بیش از یک روز کامل. این مدت زمان برابر است با صرف دو ماه کامل از دوازده ماه سال به تماشای تلویزیون. وای! و تازه مردم از این تعجب می کنند که چرا در زندگی پیش رفت نمی کنند. رژیم رسانه‌ای بگیر رسانه ها با گروگان گرفتن ما امپراتوری خود را می سازند. تا حالا در بزرگراهی در ترافیکی به طول چند کیلومتر گیر افتاده ای تو دیرت شده و از خودت میپرسی که چه چیز کوفتی باعث توقف این همه ماشین شده. وقتی بالاخره نزدیک میشوی میبینی که هیچ چیز فیزیکی مانع حرکت خودروها نشده است فقط ظاهرا مدتی قبل تصادفی اتفاق افتاده و حالا اتومبیل تصادفی به کنار بزرگ راه انتقال داده شدند حرکت لاکپشتی اتومبیل ها به دلیل سرک کشیدن راننده ها موقع عبور از کنار ماشین های تصادفی است حالا دیگر واقعا خونت به جوش می آید. ولی چه اتفاقی می افتد وقتی اتومبیل خودت از کنار صحنه تصادف رد می شود تو هم سرعتت را کم می کنی چشم هایت را از جاده مقابلت برمیداری و گردن دراز می تا صحنه تصادف را ببینی چرا آدم‌های خوب و محترم دوست دارند چون این سحنه های تراژیک و ناخوشاغندی را ببینند دلیلش میراث ژنتیکی ماست که به حس ماقبل تاریخ ما در رابطه با بقایمان برمیگردد؟ وقتی که پاگجار و جنجال و حیاهو به میان میآید ذاتمان نمیتواند مقاومت کند و ما قادر نیستیم جلوی خودمان را بگیریم حتی اگر در اجتناب از منفی نگری خبره باشیم و خود را طوری تربیت کرده باشیم که سرسختانه اندیش بمانیم. اربابان رسانه این موضوع را خیلی خوب می دانند. آنها ذات تو را از خیلی جهات بهتر از خودت میشناسند. شناسند. رسانه ها همیشه از تیترهای شکاور و جنجالی برای جلب توجه استفاده کردند. ولی امروزه در عوض سه شبکه خبری تلویزیونی و رادیویی صدها شبکه وجود دارد که 24 ساعت هفت روز هفته در حال پخش برنامه هستند. به جای چند روزنامه محدودی که قبلا روی دکه روزنامه فروشی ها می دیدیم، حالا انبوهی سایت خبری وجود دارند که اخبار و گزارش هایشان از طریق کامپیوترها و گوشی های هوشمندمان به ما می رسند. رقابت برای جلب کردن توجه تو هرگز به اندازه این دوران خونین نبوده است و هر روز هم خونبارتر می شود. رسانه ها هر روز ده تا از فجی ترین تکاندهنده ترین، مرگ بارترین، خشنترین، قمنگیز ترین و هلناک ترین اتفاقهای دنیا را پیدا می کنند و آنها را از طریق روزنامه ها، شبکه های خبری و ویب ها بارها و بارها به نمایش می گذارند. البته در طول همان 24 ساعت، میلیون ها رختاز زیبا و خار العاده هم اتفاق می افتد. ولی ما چندان از آنها نمی شنویم. از آنجایی که برای جست و اخبار منفی ریزی شده ایم، دنبال موارد منفی بیشتر و بیشتری می رویم. حالا خودت قضاوت کن. داستان خبری مثبت چطور می امیدوار باشند با این میزان اقبال مردم به رخدادهای منفی و این همه هزینه های هنگفت تبلیغاتی رقابت کنند بیا برگردیم سراغ بزرگراه خودمان اگر کنار جاده به جای صحنه تصادف خیره کننده ترین و دلگیز ترین غروب آفتاب عمرت را میدیدی چه می‌شد؟ آن موقع چه بر سر ترافیک می من این صحنه را بارها دیده ترافیک خیلی روان پیش میرفت. بزرگترین خطر رسانه این است که چشماندازی بسیار تحریف شده از دنیا به ما میدهد. و از آنجایی که تمرکز و تکرار پیام رسانی روی رویدادهای های است، ذهن ما هم کم, کم باور می که دنیا تا این حد بد است این چشمانداز تحریف شده و محدود از واقعیت تأثیر شدیدی روی نیروی خلاقیت تو دارد و میتواند فلج کننده باشد. فیلتر کننده ای که من استفاده می کنم در اینجا آنچه را که برای محافظت کردن از ذهنم انجام می دهم، با تو در میان می گذارم. قبلش به تو هشدار می دهم که من رژیم ذهنی سفت و سختی دارم بنابراین اگر می‌خواهی از رژیم من استفاده کنی باید آن را با اولویت‌های خودت سازگار کنی به هر حال برای من که خیلی خوب جواب داده است همانطور که احتمالا حدس می‌زنی، من هیچ خبری را گوش نمی دهم یا تماشا نمی‌کنم. و هیچ روزنامه یا مجله خبری را نمیخوانم. چرا؟ چون 99 درصد از کل اخبار هیچ اثری روی زندگی شخصی من یا هدفها، رویاها و بلند پروازیم ندارند. بنابراین من تعدادی اپلیکیشن خبرخان یا فیتها یارس اس نصب کردم تا آن دست از اخبار و اطلاعات بروز شده صنعت موفقیت را که واقعاً به منافع علائق و هدفهای مستقیم من مربوطند شناسایی کنند اینطوری اخباری که براگ من مفیدند از انبوه خبرهای دیگر جدا می شوند و من دیگر مجبور نیستم هر آتو آشغالی را توی لیوان آبم بریزم در حالی که اکثر مردم ساعتهای متمادی آشغالهای بیربطی را می که فقط ذهنشان را پریشان می کند و روحشان را در هم می من سودمندترین اطلاعاتی را که میخواهم، درست زمانی که به آنها نیاز دارم، در کمتر از پانزده دقیقه به دست می آورم. قدم دو در دانشگاه سیار ثبت نام کن البته کافی نیست که فقط ورودی های منفی را حذف کنی. برای حرکت در مسیر مثبت و سازنده، باید لیوانت را با آب زیاد بشویی و بعد با محتویات خوب پرش کنی. اتومبیل من بدون دو چیز راه نمی افتد. بنزین و مجموعه همیشه حاضری از سیدی های آموزشی که هین رانندگی گوش میدهم. یک فرد آمریکایی معمولی سالانه دوازده هزار مایل رانندگی می کند. این یعنی سیصد ساعت زمان برای تمیز کردن ظرف ذهنت و پر کردن آن با محتویات مثبت. برایان تریسی مفهوم تبدیل کردن اتومبیل به کلاس درس سیار را به من آموخت. او برایم توضیح داد که با گوش دادن به سیدی های آموزشی هین رانندگی هر سال میتوانم دانشی را کسب کنم که معادل دو ترم تحصیل در دانشگاه است. فکرش را بکن، اگر زمانی را که با گوش دادن به رادیو هنگام رانندگی تلف میکنی، صرف شنیدن سیدی های آموزشی کنی، بعد از چند سال می توانی دانشی معادل دکترا در حوزه مدیریت، موفقیت در فروش، خلق ثروت، برقراری روابط عالی یا هر حوزهی که دوست داری به دست آوری. این تعهد وقتی با رویه مطالعه کردن تلفیق شود، تو را از توده ی معمولی جدا می کند. پس در هر فرصتی از سیدی، دیویدی یا کتابی برای افزودن بر دانشت بهره بگیر. 2. معاشران چه کسی روی تو تأثیر می‌گذارد؟ هم جنس با هم همجنس پرواز می کند. آدم هایی که از روی عادت با آنها هم نشین هستی، گروه مرجع تو خانده می شوند. طبق تحقیقی که روانشناس اجتماعی دکتر دیوید مکلند از دانشگاه هاروارد انجام داده است، گروه مرجع معمولاً تا 95 درصد از موفقیت یا شکست فرد را در زندگیش رقم میزند. تو بیشتر وقتت را با چه کسانی می گذرانی؟ چه افرادی هستند که از همه بیشتر تحسینشان می‌کنی آیا این دو گروه از افراد دقیقاً یکی هستند اگر نه چرا نیستند جیمران به من یاد داد که ما میانگین پنج آدمی میشویم که بیشتر از بقیه با آنها می‌گردیم به او با نگاه کردن به معاشرانمان می‌توانیم کیفیت سلامتیمان نگرشمان و درآمدمان را مشخص کنیم آدمهایی که وقتمان را با آنها می‌گذرانیم معمولا در موضوعاتی که برایمان مهمند و نوع نگرش ها و دیدگاههایی که به مرور به دست میآوریم نقش تعیین کنند دارند. این تأثیر آنقدر زیاد است که دست آخر شروع به خوردن آنچه آنها میخورند میکنیم. مثل آنها حرف میزنیم. همان چیزهایی را میخوانیم که آنها می آنچه آن را که آنها تماشا می تماشا میکنیم. مثل آنها فکر میکنیم، مثل آنها با مردم رفتار میکنیم. حتی مثل آنها لباس می پوشیم. جالب اما اینجاست که معمولا از شباهتهای بین خودمان و آن حلقه پنج نفره کاملاً بیخبریم. چرا بیخبریم؟ چون معاشرانمان ما را به زور به سمت و سویی هل نمیدهند. آنها به تدریج در گذر زمان باعث عوض شدن ما میشوند. تاثیر تأثیر همنشینان بسیار زریف و نامحسوس است. درست مثل وقتی که سوار بر تیوب روی دریا هستی، و فکر می کنی که سر جایت شناوری، تا اینکه ناگهان به خودت می‌آیی و متوجه می جریان آرام آب تو را یک کیلومتر از ساحل دور کرده است. به آن دوستانت فکر کن که قبل از شام پیش غذاهای چرب و چیلی یا نوشابه سفارش می دهند و این کار همیشگیشان است. اگر مدام با آنها بگردی، کم کم می بینی که تو هم داری مثل آنها چیپس پنیری و سیب زمینی سرخ کرده میخوری و برای اینکه پا به پایشان پیش بروی آن لیوان اضافی نوشیدنی را سر می کشی. حال اگر با دسته دیگری از دوستانت بگردی که غذای سالم سفارش می دهند و در مورد کتابهای الهامبخش بخش و بلند در کسب و کار حرف میزنند تو هم شروع به همگون شدن با رفتارها و عادتهای آنها میکن. همان چیزهایی را میخوانی و در موردش حرف میزنی که آنها میخواند و در موردش حرف میزنند. فیلم هایی را تماشا میکنی که آنها عاشقش هستند و به جاهایی میروی که آنها پیشنهاد میکنند. تأثیری که هم نشینان روی تو میگذارند ظریف و نامحسوس است و میتواند مثبت یا منفی باشد. در هر دو حالت تأثیری فوق قدرتمند است. پس حواست باشد. نمیتوانی دور بر آدمهای منفی به پلکی و انتظار زندگی مثبتی داشته باشی. بنابر این سوالی که باید از خودت بپرسی این است که میانگین درآمد، سلامتی یا نگرش آن پنج نفری که بیشتر وقتت را با آنها میگذرانی چقدر است آیا جواب این سوال تو را به وحشت می‌اندازد اگر چنین است بهترین راه برای افزایش توانمندیت در هر کدام از های مورد نظرت این است که بیشتر وقتت را با کسانی بگذرانی که خودشان این ها را دارند آنگاه قدرت تأثیر همنشین را خواهی دید، قدرتی که به نفع تو عمل می نه به ضررت در نتیجه این همنشینی، همان رفتارها و نگرشهایی که به آنها کمک کرده به موفقیتی تحسین برانگیز دست یابند، کم کم تبدیل به بخشی از روال روزمره تو می شوند. اگر به قدر کافی دوروبر این افراد باشی، به احتمال زیاد، همان نتایج موفقیت ها میز را در زندگی خودت هم خواهی دید. اگر تا حالا این کار را نکرده ای، اسم آن پنج نفری را که بیش از همه با آنها میگردی روی کاغذ بنویس. همینطور، مهمترین ویژگی های مثبت و منفیشان را. مهم نیست که این پنج نفر چه کسانی هستند. میتواند همسرت، برادرت، همسایت یا دستیارت باشد. حالا میانگین آنها را بگیر. متوسط سلامتیشان و موجودی بانکیشان چگونه است؟ میانگین کیفیت روابطشان چطور؟ بررسی نتایجی که به دست آورده ای از خودت بپرس آیا وضعیت آنها از نظر من خوب است؟ آیا این همان جایی است که میخواهم برسم؟ اکنون وقتش است آدمهایی را که معمولا وقتت را با آنها میگذرانی مجددا ارزیابی و اولویت بندی کنی یادت باشد رابطه ها میتوانند به تو پر و بال دهند گرسنه نگهت دارند یا دست و پایت را ببندند حالا که شروع به بررسی دقیق این مسئله کرده ای که وقتت را با چه کسانی میگذرانی بیا کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم همانطور که جیمران به من یاد داد بسیار مفید است که معاشرانت را ارزیابی کرده و به سه دسته تقسیم کنی معاشرانی که باید با آنها کلن قطع رابطه کنی معاشرانی که باید رابطت را با آنها محدود کنی و معاشرانی که باید رابطت را با آنها بیشتر کنی قطع رابطه تو فرزندانت را در برابر تأثیرهایی که در معرضشان هستند و آدم که با آنها معاشرت دارند، محافظت می کنی. چون از تأثیری که دیگران می روی فرزندانت و انتخابهایشان داشته باشند، به خوبی آگاهی. من معتقدم که این اصل باید در مورد خود تو هم اعمال شود. تو به خوبی این را می دانی که برخی از آدم هستند که باید با آنها قطع رابطه کنی، آن هم به طور کامل. احتمالاً برداشتن چون این قدمی آسان نیست، ولی باید این کار را بکنی. باید این تصمیم سخت را بگیری که دیگر نگذاری برخی تأثیرهای منفی خاص تو را تحت و خود قرار دهند. کیفیت مطلوب زندگیت را مشخص کن و سپس اطرافت را با آدمهایی پر کن که مظهر و حامی آن نوع زندگی هستند. من مدام کسانی را که حاضر نیستند رشد کنند و مثبت زندگی کنند همچون علف هرزی از زندگیم ریشکن می کنم. شکل دهی و رشد و حف فراگندی تمام عمری است. ممکن است برخی ها بگویند که من در این موضوع بیش از حد محتاط و سخت گیرم ولی باور کن دلم میخواهد از این هم محتاط تر و سخت گیرتر باشم. زمانی شریکی کاری داشتم که واقعا به او علاقمند بودم ولی وقتی اوضاع اقتصادی خراب شد شب و روز از این می نالید که چقدر اوضاع وحشتناک شده و چقدر شرکتش از این مسئله ضربه خورده و چقدر زندگی سخت شده است. من میگفتم: گفتم مرد اینقدر نگو اوزا خراب است. هرچه بیشتر در موردش حرف بزنی بیشتر باور می کنی که اوزا درست بشون نیست. ولی متاسفانه او همچنان اصرار داشت همه چیز را غمنگیستر و ناامید کننده تر از آنچه واقعا بود ببیند. و من بالاخره به این نتیجه رسیدم که دیگر راهمان از هم سواست. وقتی که تصمیم سختی مبنی بر گذاشتن مرزهایی بین خودت و آدم هایی میگیری که حالت را خراب میکنند، بدان که با تو خواهند جنگید، مخصوصاً آنهایی که به تو نزدیک ترند. چرا؟ چون تصمیم تو برای داشتن یک زندگی مثبتتر و هدفمندتر آینه‌ای میشود که در آن انتخابهای نادرست خودشان را میبینند. تو باعث میشوی که آنها احساس ناخوشایندی پیدا کنند، و لذا تلاش خواهند کرد که تو را به سطح خودشان بازگردانند البته مقاومتشان معنایش این نیست که تو را دوست ندارند یا خیر تو را نمیخواهند نه به هیچ وجه در واقع اصلا قضیه تو نیستی قضیه فقط احساس ترس و عذاب وجدان خودشان از انتخاب بدشان و عدم داشتن اراده و انضباط لازم برای تغییر زندگیشان است فقط بدان که جدا شدن هرگز آسان نخواهد بود. محدود کردن رابطه افرادی هستند که می توانی سه ساعت با آنها وقت بگذرانی، ولی سه روز نه. دیگرانی هم هستند که میتوانی سه دقیقه با آنها باشی، ولی سه ساعت نه. همیشه به یاد داشته باش که تأثیر رابطه ها روی تو هم قدرتمند است و هم نامحسوس. کسی که داری با او قدم میزنی، هم به معنای حقیقی کلمه و هم به معنای استعاریش میتواند سرعتت را کم یا زیاد کند. به همین منوال، لاجرم تحت تأثیر نگرش ها، کارها و رفتارهای غالب آدمهایی قرار می‌گیری که زمانت را با آنها سپری می‌کنی. بر اساس رفتار و کردار آدمها تصمیم بگیر که تا چه حد با آنها پیش بروی و ازشان تأثیر بپذیری سپس مرزهایت را با آنها مشخص کن. سخت است میدانم خود من مجبور شدهام بارها این کار را انجام دهم. حتی با خیشاوندان درجه یکم. برایم سخت است ولی اجازه نمیدهم دهم که اقدام یا نگرش های شخص دیگری تأثیری تضعیف کننده روی من داشته باشد من همسایه ای دارم که دوستی سه دقیقه ایست برای سه دقیقه می توانیم با هم گپ بزنیم و اختلاط کنیم ولی برای سه ساعت نه با دوستی قدیمی از دوران دبیرستان می توانم سه ساعت وقت بگذرانم ولی رفیق سه روزه نیست و هستند آدم هایی که می توانم چند روزی در کنارشان باشم ولی هرگز به سفری طولانی با آنها نمی رویم. نگاهی به رابطه هایت بینداز و اطمینان حاصل کن سه ساعت را با فردی سه دقیقه ای نمی گذارانی. بیشتر کردن رابطه. ما همین الان در مورد ریشه کن کردن رابطه های منفی در زندگیت صحبت کردیم. اما این فقط یک روی سکه است، طرف دیگر این است که می توانی ریشه برخی رابطه ها را محکمتر کنی. آدم های موفق را در آن حوزه هایی از زندگی که می خواهی بهتر شوی شناسایی کن. آدم هایی با همان موفقیت مالی و کاری که در آرزویش هستی، با همان مهارت تربیت فرزندی که دنبالش هستی. با همان رابطه هایی که آرزومندش هستی، با همان سبک زندگی که عاشقش هستی، و بعد زمان بیشتری را با این آدم ها بگذران. به سازمان ها، انجامان کاری و باشکاهای ورزشی که این آدمها در آنجا دور هم جمع می شوند ملحق شو و با آنها طرح دوستی بریز. در ادامه خواهی دید که من برای گذراندن اوقات با کیفیت و رسیدن به نتایج مثبت نامنتظره حتی به شهر دیگری هم در طول این کتاب، مدام با شور و حرارت از جیمران حرف زدم. چون بعد از پدرم، او بزرگترین استاد من و اثرگزارترین شخص در زندگیم بوده است. رابطه من با جیم، نمونه کامل یک رابطه یافته است. درست است که چندین بار فرصت غذا خوردن و گذراندن اندک زمانی با او، هین مساحبه ها و قبل از سینارها نصیبم شده، اما قسمت اعظم زمان بودن من با جیم، حاصل گوش دادن به سخنان او در اتومبیلم و خواندن مطالبش در اتاق نشیمن خانم بوده است. من بیش از هزار ساعت آموزش مستقیم از جیم دریافت کردم که 99 درصد آن از طریق کتاب‌ها و نوارهای صوتی بوده است. نکته مهیج ماجرا این است که مهم نیست در زندگیت کجا هستی. شاید در خانه سرت با بچه های کوچکت گرم است یا داری از پدر و مادر پیرت مراقبت می کنی. یا ساعت طولانی با آدم کار می کنی که حرف مشترک چندانی با هم ندارید یا در حومه شهر دور از اداره ها و شرکت ها زندگی می کنی. در هر حال فرقی ندارد. تو هم می توانی هر استادی را که می خواهی داشته باشی اگر او بهترین افکار، داستان و ایدههایش را در قالب کتاب، CD، دیVD دی دی و پادکست درآورده باشد. منابع نامحدودی برای استخراج در اختیار توست پس از آنها استفاده کن، اگر میخواهی های بهتر، امیقتر و معنادارتری داشته باشی، از خودت بپرس: چه کسی همان نوع ای را دارد که من به دنبالش هستم؟ چطور میتوانم زمان بیشتری را با این فرد بگذرانم؟ ملاقات با چه کسی میتواند روی زندگی من تأثیر مثبت بگذارد؟ بگذار درخشش و گرمای چنین آدمی به تو برسد. با کسی دوست شو که فکر میکنی بزرگترین، عاقل‌ترین و موفق ترین آدم در حوزه مد نظر توست ببین این فرد چه مطالبی می خاند برای نهار خوردن کجا می رود رابطه با او چطور بر زندگی تو تأثیر میگذارد. گذارد تو می توانی با پیوستن به شبکه های اجتماعی انجمن ها و تشکیلات مشابه رابطه هایت را با آدم های مورد نظرت بیشتر کنی مؤسسه های خیریه باشگاه های ورزشی و انجمن های را پیدا کن که آدمهایی که میخواهی مثل آنها شوی آنجا دور هم جمع میشوند یک همراه موفقیت پیدا کن راه دیگر برای توسعه دادن رابطه هایت پیدا کردن یک همراه موفقیت است کسی به اندازه خودت متعهد به جستجو و مطالعه و رسیدن به رشد فردی این فرد باید کسی باشد که به او اعتماد داری فردی آنقدر شجا که به تو بگوید واقعا در مورد تو نگرش هایت و عمل کرده چه نظری دارد این فرد می تواند دوستی قدیمی باشد یا حتی کسی که تو را اصلا خوب نمیشناسد. اصل مطلب گرفتن و دادن یک بازخورد صادقانه و بی‌طرفانه است. همراه موفقیت فعلی من دوست خوبم لندن تیلور است. همانطور که پیشتر گفتم ما هر جمعه گفتگوی تلفنی سی دقیقهی با هم داریم تا پیروزی ها، شکست ها، ها و اشتباه های هفته پیش من را بررسی کنیم و ببینیم که در حال حاضر در کجای برنامه رشد و پیشرفتمان هستیم. انتظار آن تماس تلفنی و دانستن اینکه باید به لندن جواب پس بدهم، مرا در طول هفته فوق‌العاده گوش به زنگ و مراقب نگه می‌دارد. من شکست‌ها و اشتباه‌های لندن یا هر بازخوردی را که نیاز دارد، یادداشت می‌کنم و هفته بعد درباره‌ی ها از او سؤال می‌کنم. او هم همین کار را در مورد من انجام می‌دهد. از این طریق یکدیگر را مسئول و پاسخگو نگه می‌داریم. مثلا او می‌گوید: بسیار خوب، هفته پیش قبول کردی که اینجا گند زدی و قول دادی که درستش کنی. خوب بگو ببینم تو این چند روز در موردش چیکار کار کردی؟ البته هر دوی ما مدیران پرمشغله‌ای هستیم با یک عالم کار و مسئولیت‌های مختلف و معمولا وقت سرخوردن نداریم. اما برای مایه شگفتی است که هر هفته و برگرد این کار را انجام می‌دهیم. البته کار آسانی نیست. گاهی در طول روز به این فکر می‌کنم که از زیرش در بروم و با خودم میگویم آه گندش بزند. کاش میشد زنگ نزند. ولی اغلب وسط مکالمه تلفنیمان با خودم فکر می کنم چقدر خوب است که داریم با هم حرف میزنیم. جالب این که معمولاً هین آماده شدن برای آن گفتگوی تلفنی و فکر کردن به پیروزی‌ها و شکست‌های مهمم در طول هفته چیزهای زیادی در مورد خودم میفهمم مثلا این هفته به لندن گفتم، میدونی من یه عالم کار رو سرم ریخته دارم کتاب مینویسم کلی کار است که باید به اونا رسیدگی کنم این هفته خیلی چیزا دیدم و شنیدم و فهمیدم ولی واقعا هیچ چیز قابل ذکری برای گفتن پیدا نکردم او خیلی و پوست کنده گفت ببین این آخرین هفته ای که بدون چیزی میای آب دهانم را قورت دادم او ادامه داد پس کلا سر من نزار و سعی نکن کمکاری تو به پای چیزای دیگه بنویسی دوزاریم هم افتاد واقعیت این بود که من کمکاری کرده بودم و وقت کافی برای تعیین موضوعی که با هم در موردش بحث کنیم نگذاشته بودم و در واقع داشتم خودم را فریب میدادم. حالا یک چالش جدی برای تو دارم البته اگر واقعا مرد این کار باشی بازخورده واقعی می خواهی آدم را پیدا کن که آنقدر برایشان مهم باشی که بیرحمانه رحمانه با تو صادق باشند و بعد این سوال ها را از آنها بکن. در نظرت چطور میآیم؟ فکر می کنی نقاط قوتم کدامند؟ به نظرت در چه زمینه هایی میتوانم بهتر شوم؟ فکر می کنی کجاها خراب کاری کردم؟ چه کاری هست که با متوقف کردنش میتوانم منفعت بیشتری به خودم برسانم؟ چه کاری هست که باید شروعش کنم؟ از خرچ کردن پول برای در اختیار گرفتن استاد دریغ نکن پول جیمیر یکی دیگر از استادان من بود پل در 2009 در 81 سالگی درگذشت. هر وقت فکر می کردم واقعا دارم کاری در سطح بالا انجام می دهم به سراغ پل می رفتم. او برای من معیار بررسی واقعیت بود من زمان زیادی را با پل می گذراندم چون او یکی از شرکت های مرا خریده بود و من هم مدتی مشغول ایجاد تحولی بنیادین در یکی از شرکت‌هایش بودم. پل فرد بسیار تأثیر گذاری در زندگی من بود. معمولاً بعد از چند ساعت همنشینی با پل و شنیدن تمام طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های آمیزش سرگیجه می‌گرفتم. صرف تلاش برای درک تمام کارهایی که داشت می‌کرد، مرا از پای می‌انداخت. بعد از چند ساعت بودن در کنار پل، فقط دوست داشتم بخوابم. ولی ام با او سطح بازیم را بالا می‌برد. سرعت راه رفتن او مساوی با سرعت دویدن من بود. این دیدارها درک مرا در مورد اینکه می‌توانستم چقدر سطح بالا بازی کنم و چقدر بلند پرواز باشم بسیار بالا می‌برد. تو هم باید وقتت را با چنین آدم‌هایی بگذرانی. تو هرگز آنقدر خوب نیستی که نیازی به استاد و مربی نداشته باشی. در طول مصاحبهام با هاروی مکی، او به من گفت من بیستا مربی داشتم، باور می مربی سخنوری، مربی نویسندگی، مربی تنز پردازی، مربی زبان و آخر راستش، همیشه برایم جالب بوده که موفقترین افراد همان کسانی هستند که حاضرند به هر قیمتی که شده بهترین استادان و مربیان را در خدمت خود بگیرند. سرمایه گذاری بهبود عمل کردد واقعاً ارزشش را دارد. پیدا کردن استاد و جلب رضایتش برای قبول تعلیم تو فراگند اسرارآمیز یا ترسناکی نیست. وقتی پای صحبت کن بلانشارد نشستم، او سادگی این کار را چنین برایم توضیح داد. اولین چیزی که در رابطه با یک استاد باید در خاطر داشته باشی این است که لازم نیست وقت خیلی زیادی از او بگیری. شخصاً بهترین توصیه‌های عمرم را طی ملاقات‌های کوتاهی مثل صرف صبحانه یا نهار به دست آوردم. من فقط به آنها می گویم که مشغول انجام دادن چه کاری هستم و ازشان درخواست راهنمایی یا توصیه ای میکنم. همین و بس. تعجب خواهی کرد وقتی ببینی آدمهای فوق‌العاده موفق چقدر مشتاق مربیگری دیگران هستند، به شرطی که بدانند این کار وقت زیادی از آنها نمیگیرد. مجله موفقیت، ژانویه 2010 جان وودن در مصاحبه ای با مجله موفقیت در سپتامبر 2008 روی این نکته تاکید کرد که استادان واقعا مایل به مربیگری دیگران هستند. مربیگری میراث واقعی توست. این بزرگترین ارسی است که میتوانی برای دیگران به جا بگذاری و هرگز هم نباید تمام شود. اصلاً برای همین است که هر روز صبح از خواب بیدار میشوی، برای اینکه یاد بدهی و یاد بگیری. او در ادامه توضیح داد که مربیگری جاده‌ای دو طرف است. البته اشتیاق استاد کافی نیست. شاگرد هم باید مشتاق زانو زدن در محضر استاد باشد. این وظیفه ماست که افکارمان، زندگیمان و دل و جانمان را به دست استادان بسپاریم تا توسط آنها به درستی شکل بگیرند و نیرومند شوند. یک هیئت مشاوره شخصی تشکیل بده. من در کنار افزایش زمان و تعاملم با رهبران بزرگ نقشه دیگری را هم برای آگاهتر شدن، آینده نگرتر شدن و کارمتر شدن خودم دنبال می کنم عبارت است از تشکیل یک هیئت مشاوره در زندگی شخصیم. من ده دوازده نفر را بر اساس هوش های تخصصشان توانایی تفکر خلاقشان و یا به دلیل احترام امیقی که برایشان قائلم گلچین چین کردم هفته یک بار به سراغ چند تایی از آنها می روهم. از آنها می خواهم که برایم حرف بزنند و از ایده ها و افکارشان بگویند نگاهی به برنامه ها و ایده های من بیاندازند و راهنماییم کنند با اطمینان به تو می گویم منافعی که تا کنون از این کار به دست آوردم بسیار فراتر از انتظارم بوده واقعا مایه شگفتی است که وقتی تو علاقه صادقانه نشان می دهی آدم های نابغه این چنین با دلوجان حاضرند خرد خود را با تو تقسیم کنند چه کسانی باید در حیات مشاوره شخصی تو باشند به دنبال آدم مثبتی بگرد که به همان موفقیتی دست یاافتند که تو در زندگیت در جست و جویش هستی این کلام حکیمانه یادت باشد هرگز از کسی که نمیخواهی جای او باشی مشورت نخواه. سه. محیط تغییر چشماندازت موجب موجب تغییر نگرشت می شود زمانی که در حرفه املاک و مستقلات بودم در خلیج شرقی سانفرانسیسکو در منطقه کوچک و بسیار کم جمعیتی زندگی و کار می کردم همیشه همان آدمهایی را می دیدم که در سطح ثابتی مشغول به کار و زندگی بودند می دانستم برای رسیدن به جایی که آرزوگش را دارم باید جمع بهتر و برجسته‌تری از معاشران را پیدا کنم. برای همین از آن قسمت از خلیج به یکی از و ترین و زیباترین نقاط روی سیاره زمین یعنی تیبورون در مارین کانتی در شمال سانفرانسیسکو رفتم. اگر تا حالا به موناکو رفته باشی، تیبورون شبیه آن است ولی زیبایی خاصتری دارد. یک چشمانداز تماشایی است. در آنجا به رستوران سام می رفتم که غذاهای دریاییش فوق‌العاده بود. ولی از کیفیت غذایش مهمتر مشتریها گش بودند که ساکنان ثروتمند آن منطقه بودند. جدا از رفتن به آن رستوران برای گسترش و افزایش ارتباط هایم، روی اسکله مینشستم و به دامنه کوه خیره می شدم. من مسهور افسون خانه های چند میلیون دلاری روی صخره بودم. یکیشان مخصوصاً همیشه توجه هم را جلب می کرد. یک خانه چهار طبقه آبی رنگ با آسانسور، و میله سایق گیری به شکل دلفین روی سقفش. همیشه از خودم میپرسیدم، خانه رؤیای من کدام یکی از اینهاست؟ اگر قرار بود یکی از این خانه ها را به من بدهند، کدام را انتخاب میکردم؟ و جواب همیشه یکی بود، آن خانه آبی زیبا. در ترین نقطه بود و بهترین چشمانداز را داشت. در یک کلام، گل سرسبد آن خانه ها بود. یک روز بعد از خوردن صبحانه در رستوران سام در راه بازگشت به خانه، تابلوی را دیدم که رویش نوشته بود. بازدید این خانه برای عموم آزاد است. با خودم گفتم بد نیست بروم و ببینم. هر تابلو به تابلوگ دیگر اشاره می کرد. و من همانطور که تابلوها را دنبال می کردم، از جاده مارپیچ باریکی بین ها بالا رفتم. بالاخره به بالای تپه رسیدم و خانه تبلیغ شده را پیدا کردم. به محض اینکه وارد شدم و به سمت پنجره روبه خلیج با آن چشمانداز تماشاییش رفتم، دنیا در یک گستره 300 ست در مقابل چشمانم گشوده شد. نوک شپه جزیره تیبورون، جزیره انجل در یک سوی خلیج، برکلی و خلیج شرقی و کل نمای ساختمانهای سان فرانسیسکو در افق بر فراز پل گلدنگیت. من توی بالکون رفتم و به اطراف نگاه کردم. ناگهان متوجه شدم که این همان همون است که سالها بود به آن نگاه میکردم. همان خانه آبی بود. در جا قرار داد را امضا کردم. خانه رویایم اکنون مال من شده بود. واقعا نمیتوانم بگویم که در رستوران سام با فرد خاصی آشنا شدم که زندگیم را تغییر داد. ولی خود آن محیط تأثیر قدرتمند و عمیقی بر من گذاشت. تماشای خانه های بالای سخره ها جاه طلبی من را شعله ور رویاهایم را وسعت بخشید. برای تحقق آن رویاها سختتر از آنچه متصور بودم تلاش کردم و سرانجام موفق شدم رویاهایم را به واقعیت تبدیل کنم. رویای درون قلبت ممکن است بزرگتر از محیطی باشد که در آن زندگی می کنی. گاهی باید از آن محیط خارج شوی تا تحقق آن رویا را ببینی. این موضوع مثل کاشتن قلمه بلوطی در گلدان است. وقتی که ریشهش پا گرفت، رشدش محدود می شود. چون نیاز به فضای بیشتری دارد تا بلوط تنومندی شود. تو هم همینطور. وقتی دارم از محیطت حرف میزنم، فقط منظورم جایی که زندگی می کنی نیست به هر تو را احاطه کرده اشاره دارم. خلق محیطی مثبت برای حمایت و پشتیبانی از قدمهایی که در مسیر موفقیتت بر می داری، معنایش پاکسازی تمام ها و اختلال ها و آشفتگی ها از زندگیت است نه فقط اختلال ها و آشفتگی های فیزیکی که کارایی و بهره‌وریت را کم می‌کنند هرچند که آن هم مهم است بلکه اختلال و آشفتگی روانی ناشی از هر آنچه در اطراف توست و درست کار نمی‌کند هر آنچه خراب است هر آنچه باعث پریشان احوالیت می‌شود هر امر ناتمامی در زندگیت فشار تحلیل ای بر تو وارد می آورد و درست مثل خوناشامی که خونت را می آن امر ناتمام هم انرژی پیشرفت و موفقیتت را از تو بیرون می کشد. هر وعده، تعهد یا توافق ناتمامی قدرت تو را تحلیل می برد چون صد راه حرکت تو و در نتیجه مانع از پیشرفتنت می شود. کارهای ناتمام مدام تو را به گذشته فرا میخوانند تا به آنها رسیدگی کنی. بنابراین به کارهای فکر کن که میتوانی همین امروز کاملشان کنی و خیالت را از بابتشان راحت کنی. افزون بر این، وقتی محیطی برای پشتیبانی از هدفهایت خلق میکنی، به یاد داشته باش در زندگی آن چیزی را به دست می آوری که تحملش میکنی. این مسئله در مورد هر حوزه ای از زندگیت صدق میکند، مخصوصاً در روابطت با اعضای خانوادهت، دوستانت و همکارانت. آن چه تصمیم به تحملش می گیری، در موقعیت‌ها و شرایط زندگی فعلیت همون می می‌شود. به عبارت دیگر، تو چیزی را در زندگی به دست خواهی آورد که میپذیری و باور داری که سزاوارش هستی. اگر بی‌احترامی را تحمل کنی، به تو بی‌احترامی خواهد شد. اگر تأخیر دیگران و معتل شدنت را تحمل کنی، آنها هم دیر به سر وعده با تو میآیند. اگر تحمل کنی که بیشتر از وظیفت کار کنی و کمتر از حقت پول بگیری این روال برای تو ادامه پیدا خواهد کرد اگر اضافه وزن، خستگی و بیماری مداوم را تحمل کنی همیشه همین طور خواهی بود واقعاً حیرت انگیز است که چطور زندگیت حول استانداردهایی که برای خودت تعیین می کنی شکل می گیرد برخی آدم ها فکر می کنند قربانی رفتار دیگران هستند ولی در واقعیت، این ما هستیم که نحوه رفتار دیگران با خودمان را کنترل می کنیم. فضای احساسی، ذهنی و جسمی خودت را محافظت کن تا بتوانی در آرامش زندگی کنی. به جای اینکه در آشوب و استرسی زندگی کنی که دنیا به سویت روانه می کند. اگر می خواهی رویه منظمی از ریتم های رفتاری و ثبات قدم را شکل دهی، طوری که تکانه بزرگ نه فقط سری به بزند بلکه برای همیشه بماند. باید اطمینان حاصل کنی که محیطت از تبدیل شدنت عمل كردنت و اجرا كردنت در سطح کلاس جهانی استقبال و حمایت می کند. حالا که صحبت به اینجا رسید، بگذار به اطلاعات برسانم که در فصل بعد کمکت خواهم کرد، هر چیزی را که تا اینجا یاد گرفته ای به بهترین شکل عملی کنی. به علاوه راز چند برابر کردن نتایج را هم به تو خواهم گفت. لابد با خودت میگویی کسب نتایج بزرگتر آن هم فقط با کمی تلاش اضافی مگر می شود بیشتر به خیال میماند تا واقعیت مثل یک مزیت ناعادلانه ولی ببینم که گفته که زندگی عادلانه است اساره مرکب را به نفع خودت به بگیر خلاصه گامهای عملی تأثیری که ورودیهای رسانه ها و اطلاعات روی زندگیت دارند مشخص کن معلوم کن که به چه ورودیهایی نیاز داری تا لیوانت یا ذهنت را محافظت کنی و چطور قرار است لیوانت یا مغزت را به طور پیوسته با داده های مثبت، روحی دهنده و حمایت کننده صاف و تمیز نگهداری رابطه های فعلیت را بررسی کن. آیا رابطه‌ای هست که بخواهی در آینده محدودش کنی؟ یا رابطه‌ای که به کلی قطعش کنی؟ هایی پیدا کن تا رابطه‌های خوبت را بیشتر کنی. یک همراه موفقیت پیدا کن. بعد با هم تصمیم بگیرید که کی، در چه فاصله های زمانی و در چه هایی به هم پاسخگو باشید و چه مسائل و هایی را به گفتگوهایتان بیاورید. سه تا از حوزه های زندگیت را مشخص کن که بیشترین تمرکز را روی بهبود و پیشرفت آنها داری. در هر کدام از این حوزه ها استادی پیدا کن و او را به خدمت بگیر. استادانت می توانند هایی باشند که به آنچه در آرزویش هستی رسیدند. کسانی که یا می با آنها گفتگوهای رو در روی مختصر داشته باشی یا ایده هایشان را از هایی که نوشتند یا فایلهای صوتی و تصویری که ضبط کرده‌اند بگیری. فصل ششم شتاب گرفتن وقتی که نتایج چند برابر میشوند. شوند وقتی که در لاجولای کالیفرنیا زندگی میکردم، برای ورزش کردن و آزمودن اراده ام، به طور مرتب دو مایل را با دوچرخم به سمت بالای کوه داد رکاب می زدم کارهای دافتلبانگ خیلی کمی هستند که به اندازه رکاب زدن بیوقفه به بالای کوهی باشی شیب تند دردناک و عذاب آور باشند. نقطه‌ای هست که در آن تمام انرژیات ته کشد و به قول معروف به آخر خط می‌رسی و با عیار واقعیت چشم در چشم می‌شوی. ناگهان تمام تصورها و باورهایی که در مورد خودت داشته‌ای محو می‌شوند و تو میمانی و حقیقت اوریان. ذهنت شروع می‌کند به سر هم کردن انواع بهانه‌ها که چرا بهتر از دست بکشی. آن موقع است که با یکی از بزرگترین سوال های زندگی روبرو می شبی. آیا می توانی راحت را از میان درد و رنج ادامه دهی؟ یا مثل شاخهی می شکنی و تسلیم می در جوان 2009 با لانس آرمسترانگ برای مجله موفقیت مصاحبه کردم. یادم می وقتی لانس برای اولین بار قهرمان تور دو فرانس شد در حال تماشای او بودم. مسابقه وارد مراحل کوهستانی طاقت فرسا شده بود. رکاب زنان دیگر لانس را جدی نگرفته بودند. چون تا قبل از این اسمش را هم نشنیده بودند. در سومین مرحله کوهستانی و در میان بارش باران، مه قلیز و به دنبالش بارش تگرگ، لانس از گروهش جدا شد و خودش را به جلوترین گروه رکاب ها رسند. اکنون به تنهایی مشغول رقابت با برترین دوچرخ سواران دنیا بود. در مسیر 18 مایلی مرحله پایانی بعد از 5 ساعت و نیم رکاب زدن و صعود از میان ها نفس همه رکاب زنان به شماره افتاده بود. همگی در عمق وجودشان به دنبال ذره‌ای توان برای ادامه دادن میگشتند. رقابت تبدیل شده بود به آزمونی برای فهمیدن اینکه چه کسی میتواند از این سختی به بهترین نحو جان سالم به در ببرد و قدرت ادامه دادن را در خود پیدا کند. در یک کلام که میشکند و که کند. پنج مایل به پایان مسابقه مانده بود و لانس دو ثانیه اغبتر از نفرات جلویی بود در دوچرخه سواری در مسیرهای کوهستانی این یعنی فاصله ای جبران نشدنی اما در یکی از پیچها لانس از روی زین بلند شد خیز برداشت و با چنان سرعتی رکاب زد که او از دو نفر جلوی گروه که از دوچرخه سواران مطرح بودند پیش افتاد بعد با جمع کردن هر در توانش بود حمله جدیدی را شروع کرد و چند متر از آنها جلو افتاد. او بعدها در کتابش داستان دوچرخه سواری هم نیست. ماجرای بازگشت من به زندگی است، گفت. وقتی از رقیبهایت جلو می‌زنی و آنها واکنشی نشان نمیدهند، معلوم می‌شود که از نفس افتادهاند و این بهترین زمانی است که می‌توانی از آنها پیشی بگیری. انرژی لانس کاملا ته کشیده بود و نفسش به شماره افتاده بود. و ماهیچه هایش از خستگی می ولی همچنان به رکاب زدن ادامه میداد. برخی از دوچرخه سوارها تلاش کردند خود را به او برسانند ولی هیچ کس موفق نشد. آنها قدرت این کار را در خودشان نمیدیدند. در خط پایان مدعی دور از انتظار با مشتهای گره کرده به هوا آن مرحله از مسابقه را برد و فاتح تور دو فرانس شد. در این فصل می در مورد رویارویی با چنین هایی. که عیار حقیقی هر کس عیان می شود حرف بزنم و اینکه چطور اثر مرکب می تواند کمکت کند راحت را به سطوح جدید و بالاتر موفقیت باز کنی آن هم سریتر از آنچه تصورش را می کردی وقتی که آماده باشی تمرین کرده باشی و نهایت تلاشت را به کار گرفته باشی دیر یا زود با ایار واقعی خودت روبرو می شوی آن لحظه است که معلوم می شود چه کسی هستی و داری به چه کسی تبدیل می شوی. آن لحظه است که رشد و پیشرفت زندگیت را مشخص می کنی اینکه به جلو گام برمیداری یا خود را عقب میکششی؟ اینکه از سکوی اول بالا می روی و مدال طلا را به گردن میآویزی یا اینکه با حالتی بغ کرده بین جمعیت برای پیروزی های دیگران دست میزنی همچنین به این موضوع خواهم پرداخت که چطور می توانی مدام فراتر از انتظارات دیگران عمل کنی؟ و خوشبختی و موفقیت و کامیابیت را چند برابر کنی لحظه رویاروی با واقعیت لانس در زندگی نامش می نویسد در هر مسابقه ای هست که رکابزن با رقیب واقعیش روبرو می شود و میفهمد که این رقیب کسی نیست جز خودش. در دردناک ترین لحظه هایم روی دوچرخه همیشه کنجکاوم که بدانم چه واکنشی نشان خواهم داد. آیا به عمیق ترین ضعفم پی میبرم یا اینکه عمیق ترین نقطه قوت خود را پیدا خواهم کرد؟ وقتی در کار املاک و مستقلات بودم، در روز چند بار انرژیم ته میکشید. و به قول معروف به آخر خط می رسیدم. وقتی همراه خریدار احتمالی به دیدن خانهی می رفتیم و آن خریدار ملک را نمی پسندید، شروع می کردم به سرهم کردن بهانه های جور و جور برای فرار از نشان دادن بقیه خانه ها و برگشتن به دفتر کارم. گاهی وقتها در بدترین زمان ممکن، وسط وقت استراحت صاحب خانه ها مشتری می بردم و اغلب با قرولند آنها روبرو شدم که با عصبانیت میگفتند مزاهم غذا خوردنشان یا سریال دیدنشان شده در آن لحظه ها فقط به این فکر می کردم که خودم را به خانه برسانم دوشی بگیرم و لیوان آب خونکی بنوشم ولی هر بار که به یکی از آن بومبست های ذهنی و عاطفی می رسیدم به جای تسلیم شدن به خودم می گفتم که رقبایم هم با این مسائل دست به گریبان هستند میدانستم این لحظه است که اگر به تلاشم ادامه دهم حسابی از آنها جرق می افتم. اینها لحظه های تعیین کننده موفقیت و پیشرفت من بودند. البته وقتی که مثل بقیه جماعت همکارانم رفتار میکردم کردم اوزا اصلا سخت، دردناک یا چالشی نبود. صرفا پا به پای بقیه پیش می رفتم ولی جلو زدنی در کار نبود. کشیدن انرژیت و رسیدن به آخر خط مهم نیست. مهم است که بعد از رسیدن به این نقطه انجام می دهی. لو مربی معروف میدانست دانست که تلاش های بعد از انجام بهترین تلاش ها هستند که پیروزی ها را رقم میزنند. در یک بازی، تیمش در انتهای نیمه اول صفر در برابر چهل و دو از حریف عقب بود. در زمان استراحت بین دو نیمه، لو اهمیت تلاش های برای براگ سد کردن، تکل کردن و گرفتن دوباره توپ را به تیمش گوش زد کرد. او به بازی کنان گفت آنها به این دلیل در تیمش نبودند که میتوانستند در هر بازی تمام تلاششان را نشان بدهند. هر بازیکنی در هر تیمی این کار را می کند. او گفت آنها به دلیل تواناییشان در انجام آن تلاش اضافی حیاتی عضو آن تیم بودند. تلاش های اضافی بعد از انجام دادن نهایت تلاش تفاوت به وجود آورد. تاثیر حرف این بود که تیمش در نیمه دوم برنده از میدان بیرون آمد. تو هم همینطوری برنده می شبی. محمد علی یکی از بزرگترین بکسورهای تمام دوران است. نه فقط به دلیل سرعت عمل و چالاکیش، بلکه به خاطر استراتژی هایی که به کار می برد. در 3 اکتبر 1974، محمد علی قهرمانی سنگین وزن دنیا را دوباره نصیب خودش کرد. آن هم در یکی از غیر منتظره ترین رقابتهای تاریخ بکس. او در مسابقه‌ای که به قررش در جنگل معروف شد، جورج فورمن را شکست داد. تقریبا هیچ کس حتی هاورد کوسل حامی قدیمی محمد علی، باور نداشت که قهرمان سابق شانسی برای پیروزی داشته باشد. جورج فورمان در عرض دوراند هم جو فریزر و هم کن نورتون را که قبلا محمد علی را شکست داده بودند ناک اوت کرده بود. اما استراتژی محمد برای این نبرد چه بود؟ استفاده از نقطه ضعف حریف جوانتر، یعنی کم آوردن نیرو. محمد علی که اگر بتواند کاری کند انرژی فرمن ته بکشد، آن وقت میتوانست از این مسئله به نفع خودش استفاده کند. برای همین در طول هفت راند از مسابقه به تناپاگ دور رینگ تکیه داده بود و جلوگ صورتش را در برابر صدها مشتی که فرمن حوالهش می کرد گرفته بود. اما راند هشتم که رسید دیگر انرژی فرمن کاملا ته کشیده بود و نایی براگش باقی نمانده بود. آن موقع بود که محمد علی با یک ضربه ترکیبی فرمن را وسط رینگ پهن کرد. کشیدن انرژی و رسیدن به آخر خط مانع نیست، فرصت است. در دومین تلاش لانس آرمسترانگ برای فتح تور دو فرانس بار دیگر نوبت به مراحل کوهستانی رسید. اولین مرحله مسابقه جایی بود که لانس در اوایل همان سال در یک روز بارانی بهاری سقوط بدی کرده بود، و شدیدی به سرش خورده بود و یکی از مهره های ستون فقراتش شکسته بود. حالا باز هم هوا بارانی بود. اما او به جای نگران یا مردد شدن با خودش گفت این بهترین هوا برای حمله است. چون می دانم بقیه از این هوا خوششان نمی آید. مطمئنم در دنیا هیچ کس نیست که در شرایط سخت و آور از من بهتر عمل کند. امروز روز من است. حق با او بود. لانس با دومین پیروزیش. به خانه برگشت وقتی شرراط عالی باشد، طبیعتا همه چیز آسان و راحت هست، نه هیچ عاملی برای حوااسپارتی وجود دارد، نه هیچ کسی که مداخله کند، نه هیچ وسوسه و فریبی که تو را به تسلیم شدن ترغیب کند و نه هیچ چیزی که قدم را سست کند. همه آدمها در چنین مواقعی عالی عمل می کنند. فقط وقتی شرایط سخت می شوند مشکلات سربر میآورند و چشم پوشی از ووسوسسه رها کردن، محال به نظر میرسد. آن وقت است که شاگستگیت را براگ پیش پیشرفت ثابت می کنی. همانطور که جیمران میگوید، آرزو نکن که آسانتر باشد آرزو کن که تو بهتر باشی. وقتی در رویه ها، ریتم های رفتاری و ثبات قدمت به آخر خط میرسی بدان این همان موقعی است که داری خودت را از خود قدیمیت جدا می کنی. از آن بنبست بیرون میایی، و خود جدید قدرتمند و فاتحت را پیدا می‌کنی. چند برابر کردن نتایجت. من فرصتی مهیج و استثنایی برای تو دارم. ما در مورد این حرف زدیم که چطور رویه ها و رفتارهای ساده در گذر زمان مرکب می شوند و نتایج فوقلاد قدرتمندی را برایت برمغان می آورند. چه میشد اگر می توانستی این فرایند را سرعت ببخشی و نتایجت را چند برابر کنی؟ کنجکاف شدی؟ در اینجا به تو نشان می دهم که چطور فقط کمی تلاش بیشتر می تواند به طور تساعدی به نتایجت بیفزاید. بیا فرض کنیم که بدنسازی می کنی و طبق برنامه باید وزنه مشخصی را دوازده بار بزنی. اگر این دوازده بار را تمام و کمال انجام دهی طبق برنامه عمل کرده ای. خیلی هم عالی. اگر ثابت قدم بمانی در نهایت خواهی دید که این روش به نتایج قدرتمندی مرکب می شود. با این حال اگر بعد از زدن آن دوازده حرکت و تا کشیدن به زدن سه تا پنج وزنه دیگر به هر بدبختی ادامه دهی نتیجه که از آن مجموعه تمرین میگیری چندین برابر خواهد شد یادت باشد: این کار فقط اضافه کردن چند تکرار ساده به تمرینت نیست. آن تکرارهای بعد از رسیدنت به تایخد نتایج تو را چند برابر می کنند. آنها تو را از بنبست بیرون میآورند. تکرارهای قبلیت تو را به انتهای خطر سانده بودند و به نظر میرسید که دیگر نمی توانی از آن جلوتر بروی. اما رشد واقعی با تکرارهایی حاصل می آید که بعد از رسیدن به آخر خط انجام می دهی آرنولد شوارت زنگر یک شیوه بدنسازی به نام اصل تقلب را ابدا کرد او به هیچ چیز غیر از انجام بی ایب و نقص تکنیک ها رضایت نمیداد. آرنولد معتقد بود وقتی تمام حرکت هایی را که در توانت بود بدون نقص انجام دادی و به نقطه رسیدی که خیال می کنی دیگر نمی توانی حرکت اضافی دیگر بزنی می توانی با کمک مچهایت و ماهیچه های دیگرت به کمک های اصلی درگیر در این کار بیایی در واقع کمی تغلب به آنها برسانی این کار به تو مجال میدهد که 5 یا 6 تکرار دیگر انجام دهی و نتایج آن مجموع تمرین را به میزان چشمگیری بهتر کنی همچنین می توانی این کار را با کمک یک شریک تمرینی انجام دهی تا تو را در انجام دادن چند حرکت آخری که به تنهایی قادر به انجامش نیستی کمک کند اگر دونده حرفه باشی با این تجربه غریبه نیستی تو به هدفی که برای آن روز خود معین کرده ای میرسی، و حالا دیگر در اعضلاتت احساس سوزش و خستگی میکنی، انرژیت ته کشیده و به آخر خط رسیده ای. ولی باز هم کمی جلوتر میروی. این کمی جلوتر واقعا فراتر از توانت است ولی با عبور از آن نتایج آن دویدن را چند برابر میکنی. آن سکه یک سنتی جادویی فصل یک یادت هست، همان پنی که هر روز ارزشش دو برابر میشد و نتیجه های کوچک مرکب شده را نشانت می داد. اگر در همان دوره گسی و یک روزه هر هفته فقط یک بار مضاعف ارزش آن سکه را دو برابر میکردی، ارزش مرکب شده آن به جای ده میلیون دلار به و یک میلیون دلار می رسید. باز هم فقط چهار روز تلاش اضافی، اما نتیجه ای چندین برابر بزرگتر. اثرات فقط کمی تلاش بیشتر اینطور خود را نشان می‌دهد دیدن خودت به چشم سرسختترین رقیبت یکی از بهترین راه‌ها برای چند برابر کردن نتایجت است وقتی که انرژیات ته کشد و به آخر خط می‌رسی باز هم بالاتر و فراتر برو راه دیگر چند برابر کردن نتایجت عبور کردن از آن چیزی است که دیگران از تو انتظار دارند یعنی فراتر رفتن از آن حد کافی. از انتظارات معمول فراتر برو اپرا به استفاده از این اصل معروف است. او با بهرهگیری از سخاوتمندیش و تواناییش در زندگی و کار کردن بالاتر از استانداردهای معمول همیشه فراتر از انتظارات دیگران ظاهر می شود. یادت میاد که چطور فصل 19 همه برنامه اش را در سپتامبر 2004 آغاز کرد وقتی که پای اپرا در میان باشد همه میدانیم که باید انتظار معرکه حسابی داشته باشیم ولی در آن برنامه او حقیقتا همه را انگشت به دهان کرد آن فصل چیزی بود که تا مدتها تمام تمام رسانه‌ها و مردم در موردش حرف می زدند بیا لحظه لحظه‌ای در زمان به عقب برگردیم بهترین انتخاب مدعوین این بود که دوستان و اعضای خانوادهشان به اوپرا نامه نوشته و گفته بودند این افراد شدیداً به اتومبیل جدیدی نیاز دارند. اوپرا با فراخواندن یازده نفر به روی صحنه برنامه اش را شروع کرد. او به هر کدام از آنها یک اتومبیل داد، یک پونتیاک جی 6 مدل 2005. بعد سورپرایز واقعی از راه رسید. او از انتظارات همه فراتر رفت. جعبه های حدیهی را در میان بریه هزار پخش کرد و گفت که یکی از جعبه ها حاوی سویچ اتومبیل دوازدهم است ولی وقتی که تماشاچی ها جعبه هایشان را باز کردند تک تکشان با یک سویچ مواجه شدند اپرا جیغ زنان می گفت، همه ماشین می گیرند همه ماشین می گیرند هرچند شاید این مشهورترین مثالش باشد ولی اپرا همچنان تقریبا در تمام کارهایش فراتر از انتظارات ما میرود. در قسمت دیگری از برنامهش، دختر 20 ساله ای را که سالهای متمادی در پرورشگاه و پناهگاه هاگ بی ها زندگی کرده بود با دادن یک بورسیه تحصیلی چهار ساله و کمک هزینه 10000 ده هزار دلاری برای خرید لباس و سایر لوازم مورد نیازش شگفت زده کرد. و در برنامه دیگری به خانواده با هشت فرزند خانده که قرار بود از خانهشان بیرون انداخته شوند و سی هزار دلار داد تا هم بدهیشان را بدهند و هم خانهشان را تعمیر کنند حالا ممکن است بگویی خب که چی ایشان اپرا معلوم است که می میتواند این کارها را انجام دهد ولی واقعیت این است که آدمهای خیلی زیاد دیگری در موقعیت مشابه اپرا هستند با ثروت و شهرتی مانند او که می میتوانند این کارها را انجام دهند ولی هرگز به خودشان زحمت فراتر رفتن از حد انتظارات را نمیدهند اپرا این کار را میکند و این همان چیزی است که او را اپرا کرده است از او درس بگیر تو هم میتوانی در هر جنبه ای از زندگیت فراتر از انتظارات بروی وقتی میخواستم همسرم جورجیا را از خانواده اش خواستگاری کنم می توانستم کاری را انجام دهم که از من انتظار می رفت. یعنی ملاقات با پدرش و خواستگاری دخترش از او اما در عوض تصمیم گرفتم احترام ویژه‌ای به پدرش بگذارم و برای این منظور متن صحبتهای خاصگاریم را به زبان پرتغالی آماده کردم. برای ترجمه آنچه میخواستم بگویم از خواهر جورجیا کمک گرفتم. البته پدر جورجیا انگلیسی را خوب میفهمید ولی زیاد با آن راحت نبود. در تمام طول مسیر از دیگو به لسانجلس تک تک کلمه ها را تمرین کردم. من گل و شیرینی به دست وارد شدم و از پدرش خواستم که در سالن پذیرایی به ما ملحق شود. بعد متن حفظ کرده خودم را ارائه کردم. خدا را شکر. او گفت: موافقم. ولی به این کار بسنده نکردم. در مسیر بازگشت و طی چند روز بعد با تک تک پنج برادرش تماس گرفتم و خواهرشان را از آنها هم خواست کاری کردم. برخیشان راحت موافقت کردند ولی بعضی دیگر گفتند که به همین راحتی ها هم نیست. خلاصه اینکه، جورجیا بعدها به من گفت یکی از ترین جنبه های خاستگاریم این بود که به پدرش احترام ویژه گذاشته بودم و با تک تک برادرهایش تماس گرفته بودم و خواهرش را واداشته بودم زبان پرتغالی یادم بدهد. همین کارها خاستگاری مرا خیلی خاص کرد. آن تلاش اضافی به طرز شگفتنگیزی پاداش مضاعف با خود به دنبال داشت. استوارت جانسون مالک ویدیو پلاس سهامدار عمده مجله موفقیت است وقتی که تصمیم گرفت مجله موفقیت وبسایت موفقیت success.com و دیگر متعلقات مربوط به رسانه موفقیت را از آن خود کند پول فراوان و اعتبار 22 ساله خیش را در معرض خطر قرار داد در یکی از چالشی ترین اوضاع اقتصادی تاریخ معاصر و در حالی که بازار نشر چاپی نامساعد بود این حرکت او فی نفس شجاعانه و جسورانه بود ولی بعد او کاری به مراتب فراتر از حد انتظارها انجام داد. در حالی که بنگاه تجاری جدیدش هنوز داشت جای پایش را محکم می کرد و کسب و کار اصلیش هم مثل بقیه دنیا در طول سونامی اقتصادی سالهای 2008 و 2009 داشت چند قدم عقب می رفت، بنیادی غیر انتفاعی مختص کودکان را راه انداخت. اگر می خواست خود را وقف کمک به آموزش اصول رشد فردی در دنیا کند، باید مخصوصاً مطمئن می که آن اطلاعات به نوجوانان یعنی مخاطبان اصلی آن آموزش ها برسد. برای همین، بنیاد موفقیت را راه اندازی کرد. www.successfoundation.org او اصول اساسی موفقیت فردی را در کتابی به نام موفقیت برای نوجوانان گردآوری کرد و آن را رایگان در میان افراد مسئول و سازمانهای غیر انتفاعی توضیح کرد تا به پرورش ذهن های جوان کمک کند. استوارد شخصا اعتبار مالی لازم برای اداره و مدیریت بنیاد موفقیت را تأمین کرد و در اولین سال فعالیت بنیاد با کمک چند تن از دوستان نزدیکش بودجه لازم برای توضیع بیش از یک میلیون جلد کتاب را فراهم آورد. امروز این عدد به مراتب بزرگتر است و همچنان در حال بیشتر شدن. حال به این دقت کن. استوارد قبل از راه این بنیاد به دلیل گذاری سنگین و پرخطرش تحت فشار بود ولی تصمیمش به راه آن بنیاد در آن شرایط رسانه ها، شرکایش، همکارانش و کارمندانش را انگشت به دهان کرد. او داشت کاری بسیار فراتر از حد انتظارات انجام میداد و این کار ناگفته عالمی حرف با خودش داشت. در کجای زندگیت وقتی انرژیت ته می و به انتهای خط میرسی رسی می توانی فراتر از انتظارات ظاهر شوی؟ یا کجا می توانی دیگران را شگفت زده کنی؟ این کار تلاش خیلی زیادی نمیبرد ولی همین تلاش اندک اضافی نتایجت را صد برابر می کند. چه داری تماس فروش می گیری، چه داری به مشتری خدمت رسانی می کنی، چه داری تیمت را تشویق می کنی، چه داری به همسرت محبت می میدوی چه داری وزنه نمیزنی؟ چه داری قرار شبانه ی ای, ای با همسرت برنامه ریزی می کنی؟ چه داری اوقاتی را با فرزندانت میگذرانی؟ به این سؤالم جواب بده. آن تلاش اندک اضافی که با انجامش می توانی فراتر از انتظارات بروی و نتایجت را چند برابر کنی کدام است؟ آنچه اصلا انتظارش نمی رود انجام بده. من ذاتا عکس همه هستم. خودم میدانم. به من بگو که بقیه مردم چه کاری می کنند؟ سر چه چیزی اتفاق نظر دارند و طرفار چه چیزی هستند؟ و من دقیقا عکس آن کارها و رفتارها را انجام می دهم. اگر دارند چپ میروند من راست خواهم رفت. از نظر من آنچه محبوب و آمپنده است معمولی است و چیزهای معمولی نتایج معمولی هم در پی دارند. محبوب ترین رستوران مک مکدونالد است. محبوبترین نوشیدنی کوکاکولا است. اگر چیزهای آمه پسند و محبوب را مصرف کنی، تو هم یکی می شوی مثل هزاران نفر از توده مردم معمولی. البته معمولی بودن هیچ اشکالی ندارد، ولی من ترجیح می دهم که به دنبال غیرعادی باشم و فوقلاده ها را نشانه بگیرم. برای مثال، همه برای کریسمس کارت تبریک میفرستند. ولی چون همه این کار را می کنند، در نظر من آن تأثیر عاطفی واقعی را ندارد. برای همین شخصا تصمیم گرفتم عید شکرگزاری کارت تبریک بفرستم. تو تا حالا چند کارت تبریک عید شکرگزاری گرفته ای؟ دقیقا این کارت را متفاوت می کند. در ضمن به جای استفاده از کارت های چاپی که بارت هایی مثل با آرزوی بهترین ها رویشان نوشته شده، با دست خط خودم احساس های قلبیم را روی کاغذ می آورم و به فرد مورد نظرم می گویم که چقدر بابت داشتن رابطه با او سپاسگزار هستم و چقدر وجودش برایم مهم است. همانقدر تلاش ولی با تأثیری به مراتب بیشتر. ریچارد برانسون هرفش را بر شالوده انجام کارهای غیر منتظر ساخته است. من آشق تماشای او هنگامی که شرکت جدیدی را راه می اندازد هستم. هر کار جدید او جسورانه تر، تر و غیر منتظره تر از کار قبلیش است. ریچارد همیشه کارهای غیر منتظره انجام می دهد. از هوا کردن بالون گرفته تا آوردن مخزن پر از نوشابه در خیابان پنجم نیویورک برای معرفی ویرجین کلا به امریکایی او می تواند با انجام کارهای معمولی مثل اطلاعرسانی از طریق روزنامه ها، انجام یکی دو مساهبه مطبوعاتی، و برگزاری چند مهمانی افتتاحیه با شکوه به اهدافش برسد. ولی در عوض دنبال انجام دادن کارهای حیرت انگیز می رود. پرانسون احتمالا به اندازه شرکت دیگر و گاهی حتی کمتر از آنها برای معرفی محصولات جدیدش وقت می گذارد. فرقش فقط این است که به شیوهی غیر منتظره کارش را پیش میبرد. این کارهای غیرمنتظره منجر به نتایج متفاوت می شوند. و تأثیر تلاش هایش را چند برابر می کنند معمولا برای انجام آن تلاش اضافی انرژی یا پول خیلی بیشتری نمیخواهی مثلا خود من زمانی که در کار املاک و مستقلات بودم به چشم این مسئله را میدیدم معمولا وقتی ملکی که مدتی طولانی در لیست فروش بود فروخته میشد، مدیر آژانس فقط با تلفنی ساده این موضوع را به اطلاع مالک می رسند اما من در عوض سوار اتومبیلم می شدم و به در خانه آن فرد می رفتم و تابلوی به فروش می رسد را که جلوی ملکش نصب کرده بودیم شخصاً به او تحویل می دادم. وقتی آن مالک در را باز می کرد به او می گفتم این تابلو را بگیرید. اگر دوباره خواستید ملکی را از طریق آژانس ما بفروشید به آن احتیاج پیدا می کنید. تنها هزینه این کار پول بنزین اتومبیلم بود ولی در عوض آنن این شانس را بیشتر می کردم که مالک برای فروش ملکش در آینده به ما مراجعه کند. اخیراً الکس یکی از دوستانم برای شغلی عالی به مصاحبه دعوت شد. او در کالیفرنیا زندگی میکند و شغل مورد نظر در بوستون بود. الکس یکی از دوازده کاندید نهایی برای آن شغل بود. قرار بود آنها با های محلی حضوری مصاحبه کنند و با کسانی که از آن منطقه نبودند به صورت ویدیو کنفرانس. الکس به من زنگ زد و پرسید که آیا میدانم چطور میشود با دوربین وبکم ویدیو کنفرانس را انداخت؟ من از او پرسیدم گرفتن این شغل چقدر برایت مهم است. الکس به من گفت خیلی. این شغل رویایی من است. همان شغلی است که چهل و پنج سال خودم را برایش آماده کردم. من گفتم پس سوار هواپیما شو و حضوری در مصاحبه شرکت کن. الکس گفت احتیاجی به این کار نیست. آنها با هزینه خودشان سه کاندیده نهایی را به بوستون میبرند تا حضوری با آنها مصاحبه کنند. من به او گفتم: گوش کن. اگر میخواهی جزء آن سه کاندید نهایی باشی، باید با انجام دادن کاری غیرمنتظره خود را از بقیه متمایز کنی. فورا سوار هواپیما شو و به بوستون برو و حضوری مصاحبه بده. اینطوری در نظرشان آدم متفاوتی خواهی آمد. شخصا اگر ازمم را برای انجام دادن کاری جذم کرده باشم با بکار بستن تمام تلاشم موفقیتم را حتمی می کنم. من اقدامهایی را انجام می دهم که شوک و بحت می خانم. در همین مورد استخدام به الکس پیشنهاد کردم که خودش را به آب و آتش بزند و سرسختانه و بی از هر جبهه ممکنی حمله کند. من به او گفتم در مورد تمام آن تصمیم گیرنده ها تحقیق کن. علائقشان، تفریحاتشان، سرگرمی سرگرمیهای هایشان، سرگرمی های بچه سرگرمی های همسرانشان، سرگرمی همسایه و غیره برای آنها کتاب، مقاله، هدیه یا هر چیز دیگری که احتمال میدهی خوششان بیاید بفرست الکس گفت زیاد روی نیست؟ بر شیطان لعنت، چرا هست؟ اما نکته همینجاست آنها میفهمند که داری خرشان میکنی ولی متوجه دل و و خلاقیتت هم میشوند در واقع تو با این کارها هم توجهشان را جلب میکنی و هم به احتمال زیاد نگاه احترام آمیزشان را سپس ادامه دادم در مورد تمام آدم های توی آن تشکیلات تحقیق کن آن لیست را بردار و در کل شبکه دوستانت پخش کن تا ببینی آیا کسی آنها را بیواسطه یا با واسطه می‌شناسد نام افرادی را که دوستانت معرفی می‌کنند در سایت لینکدین جستجو کن چند نفرشان را پیدا کن و برایشان پیغام بگذار با آنها حرف بزن و ازشان بخواه که از خوبی هایت برای آن تصمیم گیرنده ها بگویند برایشان هدیه، یادداشت و چیزهای دیگر بفرست و ازشان بخواه که شخصا به دست آن تصمیم گیرنده های اصلی برسانند در طول این پروسه به آنها زنگ بزن ایمیل بفرست پیام ارسال کن، در توییتر و فیسبوک برایشان پیغام بگذار. آیا این کارها زیادی گستاخانه به نظر نمیآید؟ چرا میآید؟ ولی من متوجه شدم. از پنج نفر شاید یکی را به خاطر گستاخیت از دست بدهی. ولی آن چهارتاگ دیگر را به دست می آوری. در هر حال الکس به نصیحتم گوش نداد و آن شغل را به دست نیاورد. حتی نتوانست جز آن سکاندید نهایی باشد. می توانم قاطعانه بگویم گزینه ای به مراتب بهتر و شایسته تر از آن فردی بود که آن سازمان استخدام کرد. ولی الکس موفق نشد روی آنها تاثیر بگذارد و این مسئله. به قیمت از دست دادن شغل رویاییش تمام شد من جزء هیئت مدیره شرکتی هستم که برای ادامه یکی از پروژه های مهمش نیاز داشت قانونی در کنگره تصویب شود و تصویبش در گروی امضای یکی از مردان کنگره بود اما این یارو امضا نمیکرد نه به دلیل اشکالی در خود قانون بلکه چون مسئله را سیاسی کرده بود و برای مخالفت با هواداران این قانون حاضر به امضا نبود من پیشنهاد دادم که در عوض التماس های بیهوده بیشتر از او بگذریم و به سراغ رئیسش برویم، یعنی همسرش. ما در میان شبکه رابطه های پرسجو کردیم تا بالاخره یک نفر ما را به شخصی که با همسرش دوست بود رسند. چند روز بعد بیرون کلیسایی که آن خانوم در مراسمش شرکت کرده بود به انتظارش ایستادیم و وقتی که بیرون آمد دوستش ما را به او معرفی کرد. ما موضوع و هدف مهممان را به او توضیح دادیم و گفتیم که اگر شوهرش آن قانون را امضا کند این اتفاق روی زندگی صدها کودک محله‌های فقیرنشین اثر می‌گذارد چون قرار است از این تسهیلات برای پر کردن اوقات فراغت بچه‌ها استفاده شود لازم نیست که بگویم هفته بعد سهشنبه نشده آن امضا پای قانون مورد نظر نشست و شرکت به پروژه رسید در ای که با انواع تبلیغ ها و جار و جنجال ها شده و جلب کردن توجه آدم ها بسیار دشوار است، گاهی انجام کاری غیر منتظره برای شنیده شدن صدایت لازم است. اگر هدف یا ایدهی داری که ارزش توجه کردن دارد، هر کاری که لازم است انجام بده، حتی کارهای غیر منتظره تا دیگران صدایت را بشنوند. به گنجینه خودت کمی جسارت و بیپروایی اضافه کن بهتر از حد انتظار انجام بده کودکان نامرئی بنیاد غیرانتفاعی دیگری که من عضو حیط مدیرهش هستم به نجات و بهبودی یافتن کودکانی کمک می کند که ربوده شده و به عنوان سرباز در شمال اوگاندا و کنگو به خدمت گرفته شدند برای جلب توجه و آگاهی دیگران از وجود این بنیاد و اهدافش افراد این مؤسسه کمپینی به نام نجات در صد شهر آمریکا برپا کردند. در این کمپین بیش از هشت صد هزار جوان در فضای باز اردو می‌زدند، تا رهبران برجسته جامعه برای کمک به نجات آن کودکان به کمپین آنها بپیوندند و به این ترتیب توجه و حمایت آنها را جلب می کردند. بعد از چهار روز تمام شهرها به جز یکی به کمپین نجات ملحق شده بودند و اشخاصی مثل سناتور تد جانکری، والکیلمر، کریستن بیل و خیلی های دیگر در آن 99 شهر دیگر حضور پیدا کرده بودند. آخرین شهری که باید به کمپین نجات ملحق می شد شیکاگو بود و این کار اوپرا وینفری را میطلبید. بعد از گذشت شش روز هیچ خبری از اپرا نبود. در روز چهار روم، آنها یک راه پیمایی هول استودیوییش ترتیب دادند. روز بعد مراسم رقص و آوازخانی برپا کردند که تمام روز و شب به طول انجامید در روز ششم بعد از گذراندن شبی سرد و خوابیدن زیر باران بیش از پانصد نفر دور استودیو اپرا جمع شدند و ساعت سه و سی دقیقه بعد از نیمه شب پلاکارد به دست در سکوت ایستادند صبحش اپرا از استودیو هارپو قدم بیرون گذاشت با بنیانگزاران آن تشکیلات صحبت کرد و کل گروه را به برنامه زندگی صبحش که بیش از 20 میلیون بیننده داشت دعوت کرد. آن توجه کودکان نامرئی را به برنامه لریکینگ لایو و دویست و, و دو رسانه خبری دیگر رساند و صدایشان در مجموع به بیش از شست میلیون نفر رسید. افزون بر این قانونی برای پشتیبانی از تلاش های بنیاد کودکان نامرئی در حال تصویب در کنگره است. این بنیاد قبل از توجه اپرا با کمپین نجات خود به موفقیتی فراتر از انتظار دست یافته بود ولی کمی دل و جرأت و ثبات قدم بیشتر برای جذب آن شهر آخر و جلب توجه اپرا بزرگترین ها می را نصیب کودکان نامرئی کرد و نتایجش را چندین و چند برابر کرد حد انتظار را پیدا کن و سپس از آن فراتر برو حتی وقتی پای مسائل کوچک در میان باشد یا شاید مخصوصا در همان مواقع باید این کار را انجام دهید مثلا من برای هر مراسمی لباسی را انتخاب می کنم که حداقل یک قدم فراتر از معیار معمولان مراسم باشد وقتی از نوع لباس مناسب برای مراسمی مطمئن نباشم همیشه محض احتیاط بهتر از آنچان جلسه میطلبد لباس می پوشم ساده است میدانم، ولی این فقط یکی از راه است که سعی می کنم اصلی را که گفتم زندگی کنم. اینکه همیشه بهتر از حد انتظارها باشم و انجام دهم. وقتی سخنران اصلی مراسمی هستم که شرکت‌های بزرگ برگزار می‌کنند، مدت زمان قابل توجهی را صرف آماده‌سازی می‌کنم، شناختن تشکیلاتشان، محصولاتشان، بازارشان و انتظاراتشان از سخنرانیم. هدفم این است که همیشه از آنچه انتظار دارند به میزان چشمگیری فراتر بروم. و این کار را از طریق آماده سازی خستگی ناپذیرم انجام می دهم. انجام دادن بهتر از حد انتظارات بخش بزرگی از حسن شهرت تو می شود و شهره شدن به عالی بودن نتایجت را چندین و چند برابر خواهد کرد. من مدتی با مدیرعاملی کار کردم که همیشه به افراد از جمله فروشنده ها و تهیه کننده ها چند روز قبل از موعد مقرر حقوق می داد. همیشه وقتی چکی را بیست و ماه از او برای حقوق ماه بعدم دریافت می کردم، حیرت زده می شدم. یک بار وقتی از علت این کارش جویا شدم، جوابی بدیهی به من داد و گفت این همان پول است، ولی شگفتی و حسن شهرتی که با آن می خری بی حد و حسر است. خب، چرا آدم این کار را نکند؟ این یکی از دلایلی است که من اینقدر استیو جابز را تحسین می کنم. از میان تمام آدم های مشهوری که تصویرشان را روی جلد مجله موفقیت آورده ایم و با آنها مصاحبه کرده ایم جابز یکی از محبوب ترین های من بود. هر انتظاری که از محصول بعدی اپل داشتی، جابز همیشه کمی یا خیلی فراتر از آن میرفت تا تو را شگفت زده کند. وقتی کل محصول را در نظر می گرفتی، ممکن بود فقط چیزی خیلی جزئی اضافه کرده باشد. ولی حتی در آن صورت هم، باز فراتر از انتظارات بود و واکنش و حیجان مشتری ها را چند برابر و وفاداریشان را امیغتر می کرد. در دنیایی که بیشتر چیزها حتی در حد انتظار هم نیستند، با فراتر رفتن از حد انتظارات می توانی نتایجت را چندین برابر کنی و متفاوت از دیگران باشی. من آشق جسارتی هستم که در کلام رابرت شولر در مصاحبهش با مجله موفقیت در دسامبر 2008 موج میزد. اگر ایده‌ای در همان ابتدا با وای شروع نشود، هیچ ارزشی ندارد. نوردستروم به این معیار شهرت دارد. وقتی پای خدمات به مشتری در میان باشد، آنها همیشه در تلاشند تا بهتر از حد انتظارات خدمت رسانی کنند. نوردستروم معروف به این است که جنسی را که مشتری بیش از یک سال قبل خریده، بدون فاکتور خرید پس میگیرد. و در برخی موارد حتی کالایی را که از فروشگاه دیگری خریده است. چرا این کار را می کنند؟ چون میدانند که فراتر رفتن از سطح انتظارات اعتماد سازی می کند و باعث وفاداری مشتری ها می شود. در نتیجه این کار به شهرت خارقلادهی دست آفتند که همچنان توجه دیگران را جلب می کند. نمونه من که اینجا در موردش حرف میزنم. این تأثیر چند برابر کننده همچنان ادامه دارد. از تو می که این فلسفه ها را در زندگیت در پیش بگیری و در عادت ها، روش ها و رویه های روزمرهت به کار ببندی. اختصاص کمی زمان، انرژی یا فکر بیشتر به تلاشهایت فقط نتایجت را بهتر نخواهد کرد. آنها را چند برابر خواهد کرد. تلاش اضافی فوقلاده کمی لازم است تا فوقلاده شوی. در تمام حوضه های زندگیت، به دنبال فرصت‌های چند برابر کننده نتایج باش. جایی که بتوانی کمی پیشتر بروی. کمی بیشتر به خودت فشار بیاوری. کمی طولانیتر دوام بیاوری. کمی بهتر خودت را آماده کنی. و کمی بیشتر ارزه کنی. کجا میتوانی بهتر و بیشتر از حد انتظار ظاهر شوی؟ کی میتوانی کاری کاملا غیر منتظر انجام دهی؟ هرچه میتوانی، فرصت های بیشتری برای شگفت زده کردن دیگران پیدا کن. آنگاه سرعت و سطح دستاوردها و پیشرفت تو را حیرت زده خواهد کرد. همینطور هم آدم های دور و را. اثر مرکب را به نفع خودت بکار بگیر. خلاصه گام های عملی کی با ایار حقیقی خودت روبرو می برای مثال، موقع تماس با مشتری های موقع ورزش کردن، موقع حرف زدن با همسر یا فرزندانت؟ آن لحظه ها را مشخص کن تا بدانی در چه مواردی می توانی به خودت بیشتر فشار بیاوری تا رشد تازه بیابی. و خودت را از دیگران و خود قدیمیت جدا کنی سه حوزه از زندگیت را پیدا کن که می توانی کار بیشتری در آنها انجام دهی برای مثال تمرین های بدنسازی تماس با مشتری ها تشویق دیگران نشان دادن احساس قدرشناسی و غیره سه حوزه از زندگیت را پیدا کن که می توانی فراتر از انتظارات بروی کجا و چطور میتوانی لحظه های شگفتی ساز خلق کنی؟ سه روشی را که میتوانی کاری غیر منتظر انجام دهی مشخص کن. کجا میتوانی خود را از آنچه رایج، معمولی و قابل انتظار است متمایز کنی؟ سخن آخر علم بیعمل بیفایده است من برای سرگرمی خودم این کتاب را ننوشتم این کار سخت است یا حتی صرفا برای انگیزه دادن به تو انگیزه بدون عمل حاصلی جز خودفریبی ندارد همانطور که در پیش گفتار گفتم اثر مرکب و نتایجی که در زندگیت آشکار می بهترین ابزار موفقیت هستند با وجود اثر مرکب دیگر هرگز آرزو نخواهی کرد و به این امید نخواهی بود که موفقیت تو را پیدا کند. اثر مرکب ابزاری است که وقتی با اقدام مثبت دائمی ترکیب شود تفاوت واقعی و ماندگاری در زندگیت ایجاد می کند. بگذار این کتاب و فلسفهاش راه نمای تو شود. بگذار ایدهها و راه حلهایش در عمق جانت بنشینند و نتایج واقعی و ملموس و قابل ملاحظهای برایت رقم بزنند. هر زمانی که متوجه شدی، آدت بد کوچک به ظاهر بیزرری دوباره به زندگیت رخنه کردند، این کتاب را بیرون بیاور. هر وقت که ثبات قدمت را از دست دادی، این کتاب را بیرون بیاور. هر بار که میخواهی انگیزت را از نو شعله ور کنی و نیروی چرایت را تقویت کنی، این کتاب را بیرون بیاور. هر بار که این کتاب را میخوانی تکانه بزرگ را تقویت میکنی، که سریع به زندگیت بزند. بگذار آنچه را که به من انگیزه می دهد، با تو در میان بگذارم. ارزش اصلی من در زندگی کمک به دیگران و تاثیرگذاری بر زندگی آنهاست. آرزوی من این است که تغییر مثبتی در زندگی آدم دیگر به وجود بیاورم. بنابراین برای رسیدن به این هدفهایم نیاز دارم که تو به هدفهای خودت در زندگی برسی. من به دنبال شهادت تو در مورد نتایج تغییر دهنده زندگی هستم می خواهم ایمیل یا نامت را دریافت کنم یا ببینم که سال بعد یا حتی پنج یا ده سال بعد جلوی مرا در فرودگاهی می گیری و در مورد نتایج خارقلادهی برایم تعریف می کنی که در نتیجه ایده های این کتاب به دست آورده ای. فقط آن زمان است که مطمئن خواهم شد به هدفهایم به مقصودهایم در زندگی رسیدم مطمئن خواهم شد که بر اساس ارزش های اصلی هم زندگی کردم. برای اینکه تو به نتایج مد نظرت برسی و من هم به شهادتم باید بر اساس بینش و دانش جدیدت بیدرنگ دست به عمل بزنی. یادت باشد ایده هایی که به کار گرفته نشوند به هدر می روند. من نمی خواهم این اتفاق برای تو بیفتد. حالا وقت آن است که بر اساس باورها و اعتقادات راسخ جدیدت دست به عمل بزنی، تو اکنون قدرتش را داری و از تو انتظار دارم که آن را مقتنم به شماری، تو آماده هستی تغییرات و اصلاحات چشمگیری در زندگیت بدهی، مگر نه، صد البته که جواب بدیهی بله است، ولی تا حالا دیگر حتما متوجه شده ای که بین گفتن این که برای ایجاد تغییرهای ضروری آماده ای و عملی کردن آن تغییرها فرق زیادی هست، برای کسب نتایج متفاوت، باید کارها را به شیوهی متفاوت انجام دهی. مهم نیست کجا هستی؟ یا موقعی که با این کتاب آشنا می شوی چه سالی است؟ اگر می توانستم، دوست داشتم این سوالهای ساده را از تو بپرسم. به زندگیت در پنج سال گذشته نگاهی بینداز. آیا اکنون همان جایی هستی که فکر می کردی پنج سال دیگر خواهی بود؟ آیا آن عادتهای بدی را که قسم خورده بودی با لگت بیرون می کنی از زندگیت بیرون انداخته ای؟ آیا اندامت است که می خواستی باشد؟ آیا در کافی و مطمئن و سبک زندگیت خواستنی و رشک برانگیز است و استقلالی که انتظارش را داشتی داری؟ آیا در این لحظه از زندگیت آن تن سلامت، آن رابطه عمیق عاشقانه و آن مهارتهای فوقلادهی را که می داشته باشی داری؟ اگر نه چرا؟ جوابش ساده است. انتخابهایت. وقتش است که انتخابهای جدیدی در زندگی بکنی. انتخاب کن که نگذاری پنج سال بعدیت دنباله ی پنج سال قبلیت باشد. انتخاب کن که زندگیت را تغییر دهی. یک بار و برای همیشه. بیا پنج سال بعدی زندگیت را به طرزی باور نکردنی متفاوت از پنج سال قبلی کنیم. امید من این است که حالا دیگر چشمت به روی حقیقت باز شده باشد. اکنون آنچه را برای کسب موفقیت لازم است میدانی. پس دیگر هیچ عذر و قبول نیست. مثل من تو هم دیگر با حیله ها و ترفندهای پررنگ و لعاب گول نمی‌خوری و یا با راه های یک شبه اقفال نمی‌شوی. بلکه روی اقدامهای ساده اما عمیق متمرکز می‌مانی که تو را در مسیر آرزوهایت هدایت می‌کنند. اکنون میدانی که موفقیت آسان یا یک شبه به دست نمیآید میدانی که وقتی خود را در تک تک لحظه های زندگیت متحد به انتخاب های مثبت کنی علارغم نبود نتایج مشهود یا آنی اثر مرکب قطعاً تو را به اوجی از موفقیت میرساند که خودت را مبهوت میکند و دوستانت خانوادهت و رقبایت را انگشت به وقتی به نیروی چرای خودت وفادار بمانی و در رفتارها و عادتهای جدیدت ثبات قدم داشته باشی تکانه تو را به سرعت جلو خواهد برد و بعد با وجود آن حرکت و اقدامهای مثبت دائمی محال است که پنج سال آیندهت مثل پنج سال گذشتهت باشد برعکس وقتی که اثر مرکب را به نفع خودت به خدمت بگیری موفقیتی را تجربه خواهی کرد که حاضرم شرط ببندم اکنون تصورش را هم نمی کنی. العاده خواهد بود. یک اصل موفقیت با ارزش دیگر هم دارم که می خواهم در اختیارت بگذارم. من متوجه شدم بهترین راه برای به دست آوردن چیزهایی که در زندگی می خواهم، این است که انرژیم را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر می خواهم اعتماد به نفسم را بیشتر کنم دنبال راههایی می گردم تا به شخص دیگری کمک کنم اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند. اگر می خواهم احساس امیدواری و مثبتدیشی بیشتری بکنم تلاش می کنم آنها را در زندگی فرد دیگری وارد کنم. اگر موفقیت بیشتری برای خودم می خواهم، سری ترین راهش این است که به فرد دیگری کمک کنم به موفقیت برسد. تأثیر موجی کمک به دیگران و بخشیدن سخاوتمندانه وقت و انرژیت به آنها این است که تو بزرگترین زی نفع این نو دوستی خودت می شوی. لذا به عنوان اولین قدم ساده و کوچکی که دوست دارم در جهت اصلاح مسیر زندگیت برداری از تو می خواهم این فلسفه را در زندگی خودت پیاده کنی. اگر در این کتاب ارزشی یافته ای، اگر به هر طریقی به تو کمک کرده است پنج نسخه از آن را به پنج نفری بده که برایت مهم هستند و موفقیت بیشتری برایشان می خواهی. این افراد ممکن است خیشاوندانت، دوستانت، اعضای تیمت، فروشنده هایت یا کاسب محلت باشند یا کسی که تازه با او آشنا شده ای و دوست داری تغییر مثبت چشمگیری در زندگیش به وجود آوری میدانم که این کار در نظرت به نفع من می آید همینطور هم هست یادت باشد من به دنبال تصدیق نامه‌های موفقیت هستم. هدفم این است که در زندگی میلیون‌ها نفر تأثیر بگذارم، ولی برای انجام دادن این کار به کمک تو احتیاج دارم. اما این را به تو قول می‌دهم که در نهایت تو هستی که بیشترین نفع را از این کار می‌بری. کمک تو به دیگران برای یافتن ایده‌هایی برای کسب موفقیت بیشتر. اولین قدم تو به سوی اعمال آن ایده ها در زندگی خودت هست. همزمان میتوانی تغییر چشمگیری در زندگی شخص دیگری هم ایجاد کنی. این کتاب میتواند مسیر زندگی یک نفر را برای ابد عوض کند و تو میتوانی همان شخصی باشی که این کتاب را به او میدهد. بدون تو حتی ممکن نبود آن را پیدا کند. نام آن پنج نفری را که قرار است پنج نسخه از این کتاب را به آنها بدهی بنویس از اینکه به من افتخار دادی و وقت گرانبهایت را به خواندن این کتاب اختصاص دادی ممنونم چشم انتظار خواندن داستان موفقیتت هستم به امید موفقیت تو دارن هاردی ارزیابی قدردانی سه فرد خارقلاده در زندگی من سه ویژگی عالی بدنم سه ویژگی عالی خانم و محل زندگیم سه ویژگی عالی محل کارم و کاری که برای امرار معاش انجام می دهم. سه موهبت بزرگ از استعدادها و مهارتهای منحصر به فردی که به من عطا شده است. سه موهبت بزرگ از دانش و تجربه‌ای که به من عطا شده است. سه شیوهی که شانس را در زندگیم تجربه کردم. سه موردی که در آنها زندگی من مرفه، قنی و پرونق است، سبت ریتم رفتارهای هفتگی رفتار یا اقدام شنبه، یک شنبه، دو شمبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه انجام شده، هدف، اختلاف مجموع موارد انجام شده تعهد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 تعیین و تنظیم درست آنها یکی از مهمترین قدمها در برگرداندن مسیر زندگیت به سوی بزرگترین اهدافت است. سوالهایی که می به تو کمک می کنند را که حقیقتا در زندگی برایت مهم هستند، ارزیابی و اصلاح کنی. به هر کدام از این سوالها با دقت جواب بده. بعد من کمکت می کنم، ده تا ده تا از برترین ها را برای زندگیت انتخاب کنی. در زندگیم برای چه کسی بیشترین احترام را قائلم؟ ارزشها اصلی او کدامند؟ بهترین دوستم کیست؟ و سه ویژگی برتر او کدامند؟ اگر میتوانستم یک ویژگی خاص را بیشتر داشته باشم، آن ویژگی کدام بود؟ سه چیزی که از آنها متنفرم کدامند؟ برای مثال بدرفتاری با حیوانات، شرکت های ارائه دهنده کارت اعتباری، تخریب جنگل و غیره سه آدم در دنیا که بیش از همه از آنها متنفرم کدامند و چرا؟ دیگران از کدام ویژگی، صفت یا خصوصیت شخصی من بیش از همه تعریف می کنند سه ارزش مهمی که می خواهم به فرزندانم یاد بدهم کدامند؟ اگر قرار بود به فارغ و تحصیلان دبیرستان ارزش هایی را یاد بدهم، که زمین ساز موفقیت در زندگی آیندهشان بشود آن ارزش ها کدام بودند و چرا اگر به قدر کفایت پول داشتم که همین فردا بازنشسته شوم چه ارزش هایی را همچنان حفظ میکردم؟ کردم چه ارزش هایی از نظر من 100 سال دیگر هم معتبرند دوازده ویژگی برتر زن یا مرد ایدئال کدامند حالا نگاهی به پاسخهایی که نوشته ای بینداز. آیا الگوی تکرار شونده ای میبینی؟ با توجه به آنچه در دیگران مشاهده کرده آنچه دیگران در مورد تو مشاهده کرده اند، آنچه برای دیگران میخواهی، یا چیزهایی که برای یا علیهش میجنگی، لیستی از ده ارزش اصلی خودت با هر ترتیبی بنویس. حالا بیانها را به شش ارزشی که از همه برای تو مهمترند تقلیل دهیم. کنار ارزشهایی که در موردشان مطمئن هستی ستاره بگذار. بعد آنهایی را بررسی کن که احساس می کنی مهمند ولی مطمئن نیستی که آن شش ارزش اصلیت هستند. آنها را دو تا دوتا کنار هم بگذار و مقایسه اشان کن. از خودت بپرس که کدام یک مهمتر است و دیگری را حذف کن. به این مقایسه کردن ادامه بده تا موقعی که به شش مورد برسی، اگر برخی از ارزش که لیست کردی فقط دو کلمه مختلف هستند که ایده یکسانی را توصیف می کنند، آنها را هم با هم تلفیق کن. شش ارزش اصلی حالا ارزش های اصلیت را به ترتیب اهمیت اولویت بندی کن و مهمترین آنها را اول از همه بنویس. همگی البته مهم هستند، ولی مهمترینشان کدامند؟ اگر مجبور بودی بین دو ارزش یکی را انتخاب کنی، برای کدامش می یا حتی برای دفاع از آن جانت را فدا می کردی. حالا بگو که سه ارزش اصلی تو کدامند. چیزهایی که ممکن است در نظر تو ارزش تلقی شوند. ابتکار، احترام، استقلال، برتری، برقراری ارتباط، بسیرت، پشتکار، پول، پیشرفت، تأثیرگذاری، تجربه، تشریک مسایی، سبات، جاه طلبی، جدیگت، جسارت، چار اندیشی، چالاکی، چالش، حریم خصوصی، حقشناسی، حقیقت، خانواده، خلاقیت، خوشبختی، درخشندگی، دستاورد، دوستی، راحتی و آسایش، رشد فردی، رفاه، زیبایی، سلامتی، شادی، شرافت، عزت نفس، عشق، قدرت بیان، کیفیت، لذت، محبت، موفقیت، مهارت، وفاداری، همدلی و همکاری. ارزیابی زندگی. با واقعیت زندگیت روبرو شو. هیچ جواب اشتباهی، هیچ نمره منفی، هیچ امتیاز بندی، حتی هیچ تفسیری از پاسخهایت وجود ندارد. هیچ چیز غیر از ارزیابی فکورانه خودت. با خودت رو راست باش. حتی وقتی که جواب صادقانت کمی خجالت آور یا دردناک باشد، باز هم یادت باشد که هیچ کس دیگری قرار نیست پاسخایت را ببیند. و ضمناً فراموش نکن که با فریفتن خودت هرگز موفق نمی شوی. به مواردی که خواهی شنید، از یک تا پنج نمره بده. یک یعنی داشتن کمترین شباهت به زندگی واقعیت. و پنج یعنی داشتن بیشترین شباهت به زندگی واقعیت روابط و خانواده هر هفته حداقل ده ساعت از زمان مفیدم را با خانواده ام میگذرانم. هر هفته حداقل یک بار با دوستانم هستم. هیچ کس در زندگیم نیست که کاملا او را نبخشیده باشم. مدام در تلاش برای یادگیری این مسئله هستم که چطور همسر پدر یا مادر و دوست خوبی باشم. فعالانه به دنبال راههایی برای کمک به پیشرفت و موفقیت دوستان و خانوادهام هستم. وقتی در رابطه هایم های به وجود می آید، مسئولیت کامل آنها را به عهده می گیرم. به راحتی به کسانی که با آنها زندگی و کار می‌کنم، اعتماد می‌کنم. تعهد دادن به دیگران و محترم شمردن این تعهدها برایم آسان است. وقتی نیاز به حمایت و کمک داشته باشم، راحت بیان می کنم و همیشه از دیگران کمک می خواهم. نمره کل وضعیت جسمانی حداقل هفته ای سه بار تمرینهای قدرتی انجام می دهم. حداقل هفته ای سه بار تمرین های قلبی عروقی انجام می حداقل هفته ای سه بار تمرین های کششی و یا یوگا انجام می دهم. در یک روز معمولی بیشتر از یک ساعت تلویزیون تماشا نمی کنم هر روز صبحانه می خورم البته نه فقط قهوه هرگز فستفود نمی خورم هر روز حداقل سی دقیقه از وقتم را در فضای آزاد میگذرانم. هر شب حداقل هشت ساعت راحت میخوابم. در روز بیشتر از یک لیوان نوشیدنی کافین دار نمی نمینوشم. هر روز حداقل هشت لیوان آب مینوشم. نمره کل کسب و کار برنامه هر روزم را روز قبلش می ریزم. هدفهای من مکتوب و جلوی چشمم هستند و مرتب مرورشان می کنم. کاری هستم که انجام می دهم و خوشحالم که هر صبح بیدار می و به سراغ انجامش می‌روم. وجودم پیوسته لبریز از احساس خوشنودی و رضایت از کارم است. مدام نقاط ضعف و قوت هرفعیم را بهبود می بخشم. اگر میتوانستم کارم را بدون گرفتن دستمزد هم انجام میدادم. هر روز سر وقت در خانه کنار خانوادهم هستم. کسب و کار یا شغل فعلیم این پتانسیل را دارد که تا سال بعد به تمام هدفهای مالیم دست یابم. کسب و کار یا شغل فعلیم این پتانسیل را دارد که تا ده سال بعد به تمام هدفهای مالیم دست یابم. و کار یا شغلم احساس مفید بودن به من می‌دهد چون تأثیر مثبتی روی زندگی دیگران می‌گذارم. نمره کل وضعیت مالی. بودجه مفصلی برای دخل و خرجم دارم و همواره بر اساس آن عمل می‌کنم. یک سبد مالی متنوع و به طور حرفه‌ای طراحی شده دارم. هر ماه حداقل ده درصد از درآمدم را پسانداز می کنم. هیچ بدهی بابت استفاده از کارت های اعتباری ندارم. حساب پسندازی برای تامین کل مخارج شش ماه آتیم دارم که دست به آن نمی زنم. احساس می کنم کاملا مطابق با ارزش کارم پاداش می گیرم. یک ویت نامه به و کامل دارم. بیمه و برنامه مالی مناسبی برای خانواده فراهم کردم تا اگر اتفاقی برای من افتاد دوچار مشکل نشوند. برنامه بازنشستگی مفصلی دارم که دقیقاً منطبق بر آنچه است که برای داشتن زندگی مطلوبی بعد از بازنشستگی نیاز دارم. کاملاً متناسب با درآمدم زندگی می کنم و هرگز نسنجیده پول خرج نمی کنم. نمره کل مسائل معنوی خودم را فردی معتقد به معنویت می‌دانم هر روز حداقل 20 دقیقه را صرف مراقبه و فکر کردن به زندگی هم می می‌کنم دیگرانی که با من معاشرت دارند مرا فردی معتقد به معنویت می‌دانند من رابطه شخصی با سرچشمه معنویت خود دارم. هر روز باورهای معنویم را مرور می کنم. هر روز باورهای معنویم را به عمل در میآورم. هر روز باورهای معنویم را به کسی تعلیم می دهم. کاملا مطابق با باورهای معنویم زندگی می کنم. پیوسته از نیروی معنویتم، برای کمک به حل مشکلاتم استفاده میکنم. پیوسته از نیروی معنویتم برای کمک به دیگران استفاده میکنم. نمره کل مسائل ذهنی هر روز حداقل به مدت 30 دقیقه مطلبی آموزشی یا الهام بخش می هر روز حداقل به مدت سی دقیقه به یک فایل صوتی آموزشی یا الهام بخش گوش می‌دهم. کاملا در جریان اخبار حوزه کاریم هستم. هر روز به دنبال اطلاعات آموزشی مربوط به حوزه کاریم هستم. استادی دارم که به او اعتماد دارم. تمام دوستانم تأثیر مثبتی در زندگیم دارند. هرگز به شایعات نمی‌پرضاهم. هر روز هدف های اصلیم را مرور می کنم. هر روز آنچه را که بابت از شکر گذار هستم مرور می کنم. همیشه به درخواستها یا الزام که با هدف و ارزشهای های اصلییم هم خانی ندارند نه گویم. نمره کل سبک زندگی سرگرمی هایی غیر از کارم دارم که از آنها لذت میبرم و حداقل سه بار در هفته آنها را انجام می حداقل دو بار در ماه در رویدادی فرهنگی مثل اپرا، موزه و تئاتر شرکت می حداقل یک بار در سال به سفر می و در آن مدت ارتباط های کاریم را به طور کامل کنار میگذارم. به آن میزانی که می خواهم با خانوادهم زمان میگذرانم به آن میزانی که میخوا با دوستانم زمان میگذرانم. مدام به دنبال ماجراجیییم چیزهای تازه امتحان می کنم و تجربه های متنوع برای خودم خلق می کنم. احساس می کنم در روز فرصت کافی برای انجام آنچه دارم که هم به آن نیاز دارم و هم میخوا که انجامش دهم. هر روزم را تمام مکمال زندگی می کنم. هر روز زمانی را به رویا پردازی اختصاص می دهم. کاملا در لحظه حال زندگی می کنم. نمره کل چرخ زندگی برای مشخص کردن وضعیت تعادل زندگیت نمره‌هایی را که به دست آوردی روی شعاهای یک دایره علامت بزن از مرکز دایره شروع کن و با نقاطی روی شعاع دایره شعاع مربوط به بخش مورد ارزیابی زندگیت وضعیت فعلیت را مشخص کن آنگاه خواهی دید که چرخ زندگیت چقدر متعادل است اگر انحراف های جدی یا نقاط مستهی در آن ببینی، میفهمی که چرا چرخ زندگیت آنطور که در آرزویش هستی، روان نمیچرخد. کلید نمره یک تا پنج، یک نقطه. نمره شش تا ده، دو نقطه. نمره یازده تا پانزده، سه نقطه. نمره شانزده تا بیست، چهار نقطه. نمره 21 و یک تا بیست و پنج، 5 نقطه. نمره ی 26 تا 3 6 نقطه. نمره ی 31 تا 35 7 نقطه. نمره ی 36 تا 40 8 نقطه. نمره ی 41 تا 45 9 نقطه. و نمره ی 46 تا 50 10 نقطه. همین روش را برای خانواده، روابط و سایر بخش ها هم استفاده کن. ارزیابی ها راز جذب آدمها یا نتایج مورد نظرت این است که تبدیل به شخصی بشوی که بتوانی آن آدمها یا نتایج را جذب کنی از این مثال استفاده کن تا عامل جادویی برای رسیدن به هدفهایت را بیابی هدف کسب ست هزار دلار درآمد بیشتر در سال آینده توصیف کلی از کسی که باید بشوم استادی کارکشته در مدیریت زمان هستم. فقط روی فعالیتهایی با بازدهی بالا و بهره‌وری زیاد تمرکز می کنم. هر روز صبح یک ساعت زود تر از خواب بیدار می و هدفهایی را که در اولویت هستند مرور می کنم. بدنم را به درستی تغذیه می کنم و چهار روز در هفته ورزش می کنم تا سر کار پر انرژی و اثر بخش باشم. ذهنم را با ایده ها و الهام هایی تغذیه می کنم که شور و اشتیاقم را پشتیبانی و تقویت می کنند. اطرافم را با همتایان و استادانی پر می کنم که سطح انتظاراتم را بالا می برند و مرا رسیدن به سطوح بالاتری از انضباط رفتاری، تعهد و موفقیت تشویق می کنند. من رهبری باهوش، با اعتماد به نفس و تأثیر هستم. من به دنبال یافتن بزرگی و قدرت در همه اطرافیانم هستم. به مراجعینم عالی ترین خدمات را ارائه می دهم و مدام راه هایی را برای شگفت زده کردن آنها پیدا می کنم تا آنها را به تکرار معامله ها و ارجاعهای بعدی ترغیب کنم. عادات، روشها یا رفتارهای جدیدی که باید شروع کنم. پنج صبح از خواب بیدار شدن. تغذیه ذهنم با مطالب مثبت. هر روز سی دقیقه مطالعه و سی دقیقه گوش دادن به مطلبی الهام بخش و آموزشی سی دقیقه تفکر در سکوت سی دقیقه برنامه ریزی، خوردن صبحانه سالم سرشار از فیبر و پروتین حداقل سی دقیقه ورزش کردن سه بار در هفته تماس با ده مشتری مهم جدید در هفته برقراری ارتباط، ارائه خدمات و توسعه روابط کاری با ده مشتری موجود، برنامه ریزی برای روز آتی در شب قبلش، به یاد داشتن روزهای تولد و سالگرد ازدواج کارمندها و مشتریها، دنبال کردن اخبار، ویبلاکها و اطلاعات بروز شده مشتریان هدف آدت روش ها و رفتارهای سالم فعلی که باید تقویتشان کنم. تقدیر از همتیمی وقتی در کاری موفق می شوند. محول کردن وظایف اجرایی. زودتر حاضر شدن در محل کار. سرعت عمل داشتن. پوشیدن لباس های رسمی و غیره. عادت یا رفتارهای بدی که باید متوقف کنم. تماشای دو ساعت تلویزیون در شب و گوش دادن به اخبار در اتومبیل شرکت در جلسه های بیحاصل و موافقت با پروژه هایی که در تزاد با اولویت های مهم من هستند. قیبت کردن با همکاران، شکل کردن درباره اوضاع اقتصادی، بازار، اعضای تیم یا مشتریان. برقراری تماس های شخصی یا وقت گذرانی در فیسبوک یا سایر شبکه های اجتماعی شخصی هینه کار. غذا خوردن بعد از ساعت هفت و شب. مصرف بیش از یک لیوان نوشیدنی در شب و خوردن نهارهای سنگین. سه تغییر مهم و نحوه اعمال آنها در روال عادی زندگیم. عادت تغذیه ذهن، روش اعمال کردن صبح قبل از هر کاری سی دقیقه مطالعه هین آماده شدن قهوه گوش دادن به مطلبی آموزشی یا الهام بخش در مسیر رفتن به محل کار و برگشتن از آن عادت هر هفته تماس گرفتن با ده مشتری جدید روش اعمال کردن سهشنبه ها دو تا پنج بعد از ظهر چهارشنبه ها ده صبح تا دوازده ظهر پنج شنبه ها یک تا چهار بعد از ظهر. عادت داشتن معاشران حمایت کننده روش اعمال کردن پیوستن و حضور مدام در هم همفکری که هر دو هفته یک بار برگزار می شود. سه هدف برتر هدف شماره یک توصیف کلی از آن کسی که باید بشوم آدتها، روشها یا رفتارهای جدیدی که باید شروع کنم آدتها، روشها یا رفتارهای سالم فعلیم که باید بیشتر کنم آدتها یا رفتارهای بدی که باید متوقف کنم سه تغییر مهم و نحوه اعمال آنها در روال عادی زندگی عادت، روش یا رفتار، اعمال کردن این تغییرها در روال عادی زندگی هم. و به همین ترتیب برای اهداف شماره دو و سه موارد مذکور را بنویسید. تأثیرهای ورودی ها ارزیابی ورودی هایت بیا تمام راههای های بلقوهی را ارزیابی کنیم که از طریقشان ورودیهای مخرب را به ذهنت وارد می فعالیت هایی را که خواهی شنید چند بار در روز، هفته یا سال انجام می و اگر آنها را انجام نمی نمره صفر به آن بده. خاندن روزنامه تماشای برنامه‌های صبحگاهی یا خبری تلویزیون گوش دادن به اخبار رادیو هین رانندگی تماشای اخبار شبانگاهی تلویزیون تماشای اخبار تلویزیون در طول روز انواع شبکه‌های خبری خواندن اخبار وبسایت‌ها خواندن اخبار دریافت شده از طریق فیدهای های اس خواندن اخبار و شایعات وبلاگ‌ها ویب ها و غیره خواندن مجله های خبری خواندن مجله های زرد خواندن سایر منابع خبری، شایعات و تفسیرهای اجتماعی تماشای سریال های تنز یا سایر برنامه های تلویزیونی تماشای فیلم هایی که الهامبخش بخش و امیدوار کننده به زندگی نیستند مجموع نمرات سه راهی را یادداشت کن که با استفاده از آنها می توانی به طور کامل مانع ورود اخبار منفی ترسافرین، نگران کننده و بیاساس یا تفسیرهای اجتماعی اجتماعی اهمیت شوی یا اینکه به میزان قابل توجهی محدودشان کنی. این موارد منفی معمولاً از طریق روزنامه ها، تلویزیون، رادیو، مجله ها و وبسایت ها به ذهنت وارد می شبند. برنامه تو برای تغذیه ذهنت. از چه راه هایی میتوانی فعالانه ذهنت را با ایده ها، اطلاعات یا ورودی های مثبت، الهام بخش، قدرت بخش و شکوفا کننده تغذیه کنی؟ پنج راه را بنویس ارزیابی معاشران فعلیت این بخش مربوط به ارزیابی مقدار زمانی است که با آدم‌های غیر از خانواده‌ات یعنی همسر و فرزندانت و رابطه‌های رسمی کاریت یعنی همکارانت مگر اینکه بیرون از محل کار هم همدیگر را ببینید سپری سپری می می‌کنی سطح موفقیت آنها را در هر کدام از حوزه هایی که می‌شنوی ارزیابی کن نام وضعیت جسمانی وضعیت مالی، کسب و کار، وضعیت ذهنی و نگرشها، وضعیت معنوی و عاطفی، وضعیت خانوادگی، وضعیت رابطه ها، سبک زندگی، میانگین. حالا رابطه های خودت با معاشرانت را به این سه دسته طبقه بندی کن. قطع رابطه، رابطه محدود و رابطه بیشتر. قطع رابطه شاید لازم باشد با شخصی از لیستی که تهیه کردی یا هر کس دیگری در زندگیت که به نحوی با تو در ارتباط هست و از نظر ذهنی، عاطفی، نگرشی، جسمی و غیره تأثیر منفی روی تو میگذارد قطع رابطه کنی اینها افرادی هستند که روی آنچه فکر می کنی می‌نوشی، انجام می تماشا می کنی، گوش می و غیره تأثیر من فی نامه نام آنها را بنویس محدود کردن رابطه با چه کسانی مقدار قابل توجهی از زمانت را میگذرانی که شاید نیاز باشد کمی از آنها فاصله بگیری آنها آدمهای خوبی هستند ولی لزوماً به آنجایی جایی که تو می خواهی بروی نمیروند و آرزوها، انگیزه ها و هدفهایی مانند آنچه تو در زندگی داری ندارند. صرف زمان زیاد با آنها ممکن است تو را را نگه دارد و یا بدتر پایین بکشد. نام آنها را بنویس بیشتر کردن رابطه بر اساس هدفهایت و آدمی که میخواهی بشوی، نیاز داری که بیشتر دوروبر چه کسانی باشی؟ در دایره اطرافیان تاثیر چه کسانی هستند که میخواهی راهی برای گذراندن وقت بیشتری با آنها پیدا کنی. نام آنها را بنویس. بهره گرفتن از استادان افزون بر این به این فکر کن که کجا میتوانی مربی، مشاور یا استادی را برای تقویت مسئولیت پذیریت و شتاب بخشی به رشدت در خدمت بگیری. همچنین می توانی این استادان را در کتاب ها، سی ها و سمینار ها بیابید. نام آنها را بنویس. استراتژی هایی برای تغییر دادن عادت ها. سیستم ریشه کن کردن عادت های بد. یک تغییر دهندگان بازی برای عادت شماره یک، دو و سه شامله، آملها یعنی چه کسی، چه چیزی، چه زمانی و چه جایی تمیز کردن خانه جایگزین کردن آرام آرام پیش رفتن یا ناگهان پریدن سیستم جا انداختن عادت موفقیت تغییر دهندگان بازی برای عادت شماره یک، دو و سه، شامل شرایط را برای موفق شدن خود محیا کن. به اضافه کردن فکر کن، نه به کم کردن. همه را خبر کن. یک رفیق موفقیت پیدا کن. رقابت و تشویق یا تنبیه برای استفاده بهتر از تمرین ها به بخش زمائم کتاب مكتوب اثر مرکب انتشارات پندار تابان مراجعه کنید.